أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين فسیحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزل الكافرين. این سوره نامهاي زيادی دارد یکی از اسمهاي این سوره سوره توبه هست. سوره براءت هست سوره فاضح هست سوره براءت به این خاطر میگویند که در ابتدای این سوره اعلام براءت و بیزاری شده از کفار و از مشرکین براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين از آنها اعلام براعت شده به این خاطر این سوره را سوره براعت می گویند سوره توبه به این خاطر می گویند که بعضی از مسلمانان مسلمانان مخلص در جنگ تبوک کوتاهی کردند نتوانستند حاضر بشند بعدن خودشان خودشان را ملامت کردند و تا روزهای زیادی مشغول توبه بودند مشغول گریه بودند دعا و استغفار بودند تا اینکه در این سوره خدا تعالی آیاتی نازل فرمود که این آ... در این آیات توبه اونها قبول شد و توبه اونها پذیرفته شد به این خاطر این سوره را سوره توبه میگویند چون توبه ممنین مخلصین که چند نفر بودند پذیرفته شد همچنین در این سوره ذکر منافقین می آید و خداوند تعالی با صفات منافقین با عیبهای منافقین و اشکالاتی که منافقین داشتند اونها را رسوا می کند به همین خاطر اسم این سوره سوره فاضحه هست فاضحه یعنی رسوا کننده منافقین و اهل نفاق را این سوره رسوا کرد صفات اونها را و کوتائی اونها را و دروغ پردازی اونها را الله تعالی در این سوره بیان فرمود لذا این نامهای مختلف مختلفی دارد این سوره به این خاطر هم براعت میگویند هم توبه میگویند و هم از به خدمت شما که فاضحه هست اما مناسبت این سوره با سوره گذشته در سوره انفال ماخاندیم جهاد را و اعلام جهاد بود به صورت اجمالی بحث جهاد بود و بحث غنیمت ها بود و اینکه غنیمتها را به مصرف چه کسانی برسانید حالا در سوره توبه یا در سوره براءت باز هم اعلام جهاد هست و اینکه چرا باید جهاد بکنید و با چه افرادی جهاد بکنید اون افرادی که با انها جهاد باید صورت بگیرد محل جهاد را در این صورت بیان کردند اما یک سوالی که همیشه در اول این صورت مطرح میشه اون سوال این است که چرا در اول صورت براعت بسم الله نوشته نشده بدون بسم الله هست. دو تا علت معروف براش ذکر می کنند یکی اینکه السیدنا علی رضی الله تعالی عنہ روایت شده از ایشون نقل شده که علی کرم الله وجہ می فرماید ان امان بسم الله امان هست یعنی به نام خدا وقتی که شروع بکنی نام خدا به تو امنیت میده امان میده و براءت و سوره براءت نزلت بالسيف نازل شد برای کشیدن شمشیر یعنی سوره براءت آغاز می کند که شمشیر خودتون را برای مشرکین در بیارید لذا پس آمان با جهاد با کشیدن شمشیر هم خانی ندارد. به این خاطر اینجا بسم الله نمی نویسند. اما بسیاری دیگه معتقدند که علت بسم الله ننوشتن دلیلی دیگه داره. اون علت شی معمولاً هر آیه و هر سوره ای که بر آن حضرت صلی الله علیه و وسلم نازل می شود آن حضرت صلی الله علیه و وسلم به صحابه می گفت که این آیات را یا این سوره را در فلان جا بگذارید یعنی محلش موقعش بعد از فلان آیه هست یا بعد از فلان سوره است هر جایی که رسول الله اشاره می کردند صحابه اونجا می گذاشتند حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وقتی که قرآن مجید را جمعوری کردند، ترتیب دادن تنظیم کردند، از عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پرسیدن که شما چرا بسم الله را بین سوره براعت و بین سوره انفال ننوشتید ایشون دلیلی و علتی که ذکر کردن این بود که فرمودن چونکه مزامین براعت سوره براعت مطالب سوره براعت با سوره انفال چنان مشابهت داشتند که ما متوجه نشدیم آیا سوره براعت ادامه سوره انفال هست سوره براعت یا هم سوره توبه ادامه سوره انفال هست یا یک سوره مستقلی هست لذا ما اون سوره را بعد از این سوره گذاشتیم اما با یک فاصله ای که از یک جهت فکر می‌کنی که جزی همون سوره است اما بسم الله ننوشتند چون اگر بسم الله بنویسند به صورت اون یک سوره جداگانه میشه می‌فرمودند که ما ندونستیم که آیا جزی این سوره است یا نیست لذا چون شک داشتیم بعد از اون گذاشتیم بسم الله ننوشتیم اللته اصلی هم همینه به همین خاطر اولاما میگویند وقتی که کسی سوره را تلاوت میکند سوره توبه را داره تلاوت میکنه میره میره تا برآت می رسه و بعد همونطور طور ادامه میدهد وقتی که ادامه میدهد دیگه بسم الله نخوند به خاطر اینکه این مضمونم مطالب سوره انفال و سوره توبه یک چیزی هست اگر کسی از از برآت آغاز میکند مثل این که امروز ما شروع کردیم از سوره توبه شروع میکنه تلاوت را خاندن را لذا در این صورت بسم الله بخاند چونکه کلام الله عزوجل آغاز میشه و هر کاری که آغاز میشه برکتش با بسم الله هست با بسم الله آغاز بشه و اگر با بسم الله آغاز نشود برکتی ندارد گرچه قرآن مجید خودش ذکر خدا هست ولی آداب همین ادبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بما آموختند و یاد دادند اینی که با بسم الله کارهای من را آغاز بکنیم لذا به این خاطر این بدون بسم الله است اما آغاز شده با اعلام براءت با اعلام بیزاری براءت من الله و رسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولا ازنذر ترتیب خدمت شما عرض بکنم که یک سد سوره هست که آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شد در ترتیبی که اللامسیوتی بیان فرموده سد و سیزده سوره سوره براعت هست سد و چارده همین سوره سوره اداجه نصر الله است یعنی در اینجا خداوند دستور دادن از این به بعد رابطه هست براءت هست اعلام بیزاری هست و این سوره در ساله نهم هجری نازل شد چون غزوه تبوک که جریان تبوک مفصلا در این سوره بیان شده هم در سال نهم هجری اتفاق افتاد جریان مسجد زرار که من مسجد منافقین بود رسول الله تخریبش کردند هم در سال نهم هجری اتفاق افتاد این اعلام بیزاری و اعلام براءت هم در سال نهم هجری اتفاق افتاد رسول الله صلی الله علیه و سلم در این سال تازه مکه فتح شده بود یک سال پیش فتح شده بود در سال هشتم فتح شده بود لذا یک سال گذشته بود رسول الله خودشون به حج تشریف نبردند صحابه را فرستادند ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه را امیر حج قرار دادند سیدن علی رضی الله تعالی عنه را به عنوان نماینده خود فرستادن که اونجا اعلام کند براعت را لذا صحابه به حج رفتن خود آن حضرت نرفته این سال نهم هجری بود پس تمام جریاناتی که در سوره براعت بیان شده ام از خود اعلام براعت و جریان تبوک جریان مسجد زرار جریان پذیریش توبه و غیره همه در سال نهم هجری همه این جریانات تو این سوره هستن لذا این سوره معلوم میشه که در سال نهم هجری نازل شد ان حضرت صلی الله علیه و فرستادند که اعلام براءت بشه از مشرکین اعلام براءت یعنی چه یعنی از این به بعد ما و شما با هم دیگه ارتباطی نداریم ارتباط سیاسی همکاری تمام ارتباطات قطع چرا ان حضرت صلی علیه و وسلم این کار را کردند دلیلی دارد ما وقتی که پس منظر این اعلام براعت را نگاه می کنیم می بینیم که غدر و خیانت و عهد از سوی کفار بود از سوی مشرکان بود لذا مسلمانان خیانت نکردن مسلمانان فقط اعلام کردن گفتن کفار شما تا چار ماه فرصت دارید تا چار ماه تکلیفتون رو روشن کنید تا این چار ماه ما بر همون معاهده و بر همون قرارداد گذاشته هستیم و بعد از این چار ماه تمامه اگر من بخوام که خیانت کفار رو برای شما توضیح بدم مقداری قبل از فتح مکه باید بریم اولا ما خاندیم و هم می خانیم در سوره حشر خاندیم یهودی ها چطور خیانت کردند میخواستن خود رسول الله صلی الله عليه و سلم را به قتل برسانند که الله تعالی به پیغمبرش گفت رس رسول الله آمده بود پیش یهودی ها که به خاطر دو تا دیه پول جمع بکنه چون اونها هم پیمان بودند با کمک می‌کردند مسلمانان اونها را کمک می‌کردند اونها مسلمانان را اونها میخواستن خیانت بکنن رفتن که از پشت غلعه سنگی بیندازم بران حضرت خیانت کردند. بعض بنو قرعزه انشاءالله در سوره احزاب میخانیم در بعضی سوره ها اشاره آمد که بنو قرعزه هم خیانت کردند با مشرکین همدست شدن در جنگ احزاب مشرکین در سلح هدیبیه با رسول الله معاهده بستند اون روزی که برای عمره نگذاشتن در سال ششم هجری پیمان بستند این پیمان اولین بندش این بود که ما تا ده سال با هم هم پیمان هستیم تا ده سال با هم دیگه جنگ نداریم و یکی دیگر از بندهایش این بود که هر ای که حلیف ما هست با اونها شما جنگ نکنید هر ای که حلیف شما ما با اونها جنگ نمی کنیم دو تا از قبایل بودن با هم مشکل داشتند هر دو مسلمان نبودند هر دو مشرک بودند یکی بنوبکر اینها حلیف مشرکین بودند حلیف قریشی ها بودند یکی بنو خزاعه که اینها حلیف و هم پیمان با مسلمانان بودند خب باید بعد از اون رسول الله بر بنو بکر حمله نمی کرد با اونها نمی جنگید چون هم پیمان قریش است با قریش پیمان بسته قریشی ها هم بر بنو خزاعه حمله نمی کردند چون که هم پیمان رسول الله و مسلمانان بودند باید تعهد را عمل میکردند اما بعد از دو سال چیکار کردند کردن این پیمان را شکستند چطور شکستند یک روزی یک نفر از بنو بکر بود و یک نفر از بنو خزاعه با هم دیگه جر رو بحث کردند اون بنو بکری رسول الله را توهین کرد دشنام داد بعد و بیرا گفت اون خزاعی که هنوز مسلمان نشده بود ولی چون بر رسول الله هم پیمان بودند اون گفت نگو نگو ایشون را ایشون یک شخصیت بزرگی هست و ما با ایشون پیمان دارین لذا اینا با هم درگیر شدن اینها که با هم درگیر شدند بنو خزاه این بنو بکری حمله کرد بنو خزائی را زد بنو حمله کرد اینها را زدن اینها را زیاد زدن بعد از اینکه زدند این بنو بکر با, با قریشیا هم دست شدند و شب حمله کردند تعداد زیادی از افراد بنو خزائی را کشتند اصل جنگ به خاطر رسول الله بود هر دو گروه عرب بودند هر دو گروه غیر مسلمان بودند خلاصه یکی از بزرگانشون به نام امر ابن سالم خوزائی یک گروهی را برداشت رسول الله در مدینه بود خبر نداشتن اون زمان اخبار پخش نمی شد رفتن خدمت رسول الله و گفتند ما هم پیمان شما هستیم ولی به ما ظلم شد شب حمله کردند. چند نفر از افراد ما را کشتند و شما اگر هم پیمان هستی از ما حمایت کنید باوجود که کافر بود باوجود که غیر مسلمان بود اما چون قرارداد داشتند رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمودند که ما انتقام اینها رو می گیریم هم پیمانان ما هستند می جنگیم با اونها رسول الله آمادگی کردند سال هشتم بود همینه که آمدند و مکه شد یعنی مکه را آن حضرت سلّاللله علیه و سلم فتح کردم بدون جنگ و درگیری. تعداد زیادی آمدن خداوند چنان روب وحشتی در میان قریش و بقیه عرب ها که هیچ کس مبارزه نکرد اما یکی از دلایلش ابو صوفیان رضی الله تعالی نهو است قبل از این که رسول الله به مکه بره بیرون مکه بود رسول الل... ابو سوفیان شب آمد پیش رسول الله با رسول الله صحبت که ابو صوفیان همون جا تسلیم شد مسلمان شد مسلمان که شد در مکه پیچید که ابو صوفیان سردار مکه بود مسلمان شده لذا آن حضرت هم اعلام کرد که هر کسی که به ابو صوفیان پناه ببره او ایمن هست به او حمله نمی کنیم بی این تا نکنیم ابو سوفیان هم همین تغاظه را کرد که سعی کنی جنگ نشه و خون ریزی نشه آن حضرت تا اعلام کرد فرمود که من دخل المسجد الحرام فهو آمنون هر کسی وارد مسجد حرام بشه او امنیت داره ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمنون هر کسی کے خانه ابو سفیان داخل بشه او امن هست هر کسی کے خانه خودش داخل بشه و از خانه خارج نشه هم آمن هست یعنی بیرون نی آئیت مامی این مکی را فتمی صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با صحابه با سپه سالارانی صحابه آمدن مکه را فت کردن مکه بدون مقاومت بدون درگیری فتح شد و بعد از مکه جنگ حنین که در همین سوره هم ذکرش می آید لذا این سال هشتم بود اما از آن جایی که کعبت الله مرکز توحید بود و در این مرکز توحید باید از این به بعد شرک و بت پرستی و غیرالله الله پرستی کلا باید ساتش جمع میشد لذا همون روز اول رسول الله دستور داد همه بت‌ها را جمع کردند همه را شکستند اونها برای مشرکین خیلی سخت بود 360 تا از خدایانشون یعنی تحقیر داره داشته میشدن اینا همه جمع شدند بعد از اینکه خانه کعبه را از وجود بت‌ها پاک کردن بعد از اون رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد مسجد الحرام شد وارد خود خانه کعبه شد کلید را گرفتم باز کردن داخل رفت در رکعت نماز خواند لذا مکی فتح شد بعد از اون که مکی فتح شد چون که هنوز ارتباطات بود با قبایل مختلفی پیمان از قبل بود اینجا فقط قریش پیمان را شکست و بنوبکر بقیه پیمانها سرجا رسول الله با مشرکین کار نداشتند مشرکین مرتب می آمدند داخل مسجد الحرام می آمدند داخل مکه می آمدند حرام می آمدند حج هم می کردند یعنی در سال نهم حج فقط مال مسلمانان نبود اینجا که رسول الله خودش نیامد ابو بکر و سیدن علی و بقیه صحابه رفرستاد الان مفسرین نوشتن چرا رسول الله نیامد یکی از دلائل نوشتن که هنوز مشرکین حجمی کردن و لخت حجمی کردن اونا ما قبلا خاندیم که انها اعتقاد داشته این لباسی که ما تو لباس گناه کردیم با این لباس عبادت نکنیم می آمدن خانه خدا را لغت تواف می کردند لیسه رسول اللہ به خاطر این لغتیشون نمی آمد و دستور دادن شما برید اونجا اعلام کنید که از این به بعد پیمانی که ما با شما داریم این پیمان تمامه سی گروه بودن مشرکان یک گروهی که پیمانشون تا کمتر از 4 ماه تمام میشد دو ماه دیگه 3 دیگه تمام میشد گروه دوم دو کسانی بودند که پیمانشان پیمان نداشتن تاریخ نداشتن مطلقاً پیمان بسته بودند عهد بسته بودند با اون با این دو گروه فرمودن که تا 4 ماه ما هم دیگه با هم دیگه همین پیمان را داریم بعد از 4 ماه دیگه تمام هست اون گروهی که پیمانشون منده بود مال بعضی نه ماه منده بود اونها وقتشون تا همون نه ماه هست اون نه ماه که تمام شد پیمان اونها و عادی اونها هم تمامه این اعلام شد و دومین اعلام اینه که از این به بعد مشرکی حق ندارد وارد مسجد الحرام بشه که مرکز توحید هست اینجا فقط یک خدا باید عبادت بشه نه در مرکز توحید میتونه داخل بشه نه در مسجد الحرام نه در حرم امن الهی و نه در مکه میتونه با عقیده شرکیش زندگی بکنه ببینید بزور مسلمانشون نمیکنند چون مسلمان شدن بزور درد نمیخوره اگر میخواد مشرک بمانه از مکه بره جای دیگه اینجا نمیتونه چون این مرکز مرکز اسلام است مرکز توحید است این اعلام شد این اعلام به معنی جنگ نیست اعلام بیراعت به معنی جنگ نیست حتی اعلام به معنی این است که از این به بعد ما با هم دیگه روابط سیاسی نداریم روابط همکاری نداریم رابطه تجاری نداریم اما رابطه تبلیغ بود بعد از همین اعلام الله عزوجل فرمود که شما اونها را تبلیغ کنید اونها را دعوت بدید و همچنین این اعلام فقط با مشرکین حجاز بود سرزمین حجاز سرزمین حرمین شریفین با مشرکین دیگه حتی بعد از این رسول الله پیمان بستند معنیشی نیست که از این به بعد مسلمان نمیتونه با هیچ کافری هم پیمان باشه نه ما امروز میتونیم هر کافری که ما احساس بکنیم منافع ما در پیمان بستن با او هست چکار بکنیم پیمان بوندیم لذا این آیات در واقع در این راستا نازل شدند مباحثی دیگه که خدمت شما عرض می کنم اللہ می فرماید من الله و رسوله اعلام بیزاری هست از جانب خدا و رسولش الى الذین عاهدتم من به طرف اونهایی که شما با اونها احد بشتی از مشرکین از این بعد اعلام براعت هست اعلام بیزاری هست خب تا کی این عهد هست فسیحو فی الارد اربعت اشحر در زمین بگردی چارما تا چارما. حستید و بعد از چار دیگه تمامه وعلمو انکم غیر معجز الله بدون شما خدا را نمیتونی عجز کنی. اگر به فکر توتعه باشید به فکر مکر و نقشه باشید خداوند عز و جل شما را از بین میبره و ان الله مخزل کافرین همانا خداوند رسوا کننده کافران است کافران را رسوا میکند لذا این اعلام را در روز عرفات کردند در روز عرفات کردند اعلام را ببینید حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نهو در, در روز ترویه یوم الترویه یعنی روز هشتم حج یک خطبه ای داد به عنوان امیر حج از سوی رسول الله تعین شده بود در روز عرفات یک خطبه دیگری بیان فرمود در روز دهم یعنی روز عید قربان یک خطبه دیگری سه خطبه از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و بعد از هر خطبه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به نمایندگی از رسول الله بلند میشد و این معاهده را می خاند اول در عرفات البته خاند حضرت علی رضی الله تعالی عنه خواند چون که طرف معاهده خود رسول الله بود و یکی از رسومات مشرکین و عربها این بود که وقتی که طرف میخواد معاهده را تمام بکند بپایان برساند یا خودش بیاد اعلام بکند یا یکی از افراد خانواده درجه یک اعلام بکند به این خاطر آن حضرت صلی علیه و وسلم سیدنا علی را تعین کردند که بره و معاهده را اعلام بکند که قطع ارتباط هست لذا الله می فرماید وا من الله و رسوله اعلام هست از جانب خدا، و از جانب رسولش، اعلام الناس به مردم در چه روز این اعلام هست؟ یوم الحج الاکبر در روز حج اکبر در روز حج اکبر این اعلام است که چی؟ که ان الله بریئ من المشرکین و رسوله همانا خداون بیزار هست از مشرکان و همچنین رسولش بیزار هست از مشرکان الله و رسوله، یعنی رسوله ایزاً بری اون رسولش هم بری هست خب ببینید یوم الحج الاکبر حج اکبر چیه؟ معمولاً عموم مردم فکر میکنند یک تصور نادرستی که دروسی درباره حج اکبر دارن مردم فکر میکنه هر سال که به حج رفتند و روز عرفات مصادف بود با روز جمعه اون سال میگن امسال حج اکبر است در حالی که هر سال حج اکبر است گرچه فضیلت دارد چون دو تا روز مبارک عرفه یک روزی هست که فضیلتش خیلی زیاده جمعه هم یک روزی هست که فضیلتش بسیار زیاده دوتا فضیلت با هم جمع بشه دبل فضائل هست فضیلت ها چند برابر شده ولی حج اکبر به این نمیگویند یوم الحج الاکبر در باره تعین حج اکبر البته بین مفسرین قیل و قال هم هست بگو مگو هست بعضی میگن یوم الحج الاکبر یعنی یوم عرفات. روز عرفات را میگن روز حج اکبر خود عرفه چه عرفه روز چهارشنبه بود چه پنجشنبه بود چه جمعه بود اون روز روز حج اکبر است بعضی میگن روز حج اکبر دهم را میگویند دهم ذی الحجر میگویند یعنی روز عید قربان اون روز روز حج اکبر است چرا چون روز عرفات حج کلا دو تا فرض داره دو تا رکن اعظم داره یکی عرفات هست یکی تواف زیارت هست عرفات در روز عرفات انجام میگیره تواف زیارت در روز عید انجام میگیره لذا بعضی میگن اون حج است بعضی میگن این حج است این دو قول یک قول سووم هست که بیشتر علماء گفتند قول سووم درستره اون اینه که حجت الاسلام همین حج فرضی میگه حجت الاسلام حج اسلامی حج اکبر است و حج فرضی نه حج سنت یعنی عمره حج اصغر است یعنی اگه شما دنبال حج اکبر هستید حج فرضی حج اکبر است اگر دنبال حج اصغر هستید عمره چیه حج اصغر است لذا بیشتر علماء معتقدند که حج اکبر یعنی حجت الاسلام حج فرض و حج اصغر یعنی چی؟ یعنی عمره بالاخره الله تعالی در روز حج اکبر اعلام کردن که از این به بعد براعت است بیزاری است اما ببینید رابطه سیاسی غطه رابطه خیرخواهی و مواسات و همدردی و دعوت و تبلیغ اینا غط نیست؟ بعد از همین رابطه الله تعالی به پیغمبرش میگه شما اونا را تبلیغ بکن چی بگو فا انتبتم فا هو خیر لکم ای مشرکان اگر توبه بکنید این توبه بهتره برای شما بیایید و از شرک دست بکشید اصلا, اصلاً شرک را بذاری کنار و این را خدمت شما ارز کنم که خیلی تک و که مشرک ماندند هر چی زنده مونده بود دیگه برگشتند خیلی که اندکی منده بودن اونها رفتن جاهای دیگه. لذا فان توپ توم ایها اگر توبه کردیدفه خیر و لکم این بهتره اما و انت و لیتم اگر پشت دادید اراض کردید روی گردانی کردید باز هم فعل و غیر معجز الله بدانید که شما خدا رو آجز نمی کنید خدا خداما شما رو معاخه میکنه. هم در این دنیا معاقضه میکنه هم در اون دنیا معاقضه میکنه پس معاذب خودتون باشید پس ببینید اعلام معاهده که تمام شد دیگه جنگ نیست جنگ در صورتی است که اونا خیانت بکنند بعد از اون هم جنگ نشد آن حضرت صلی علیه و سلم رفتم به طرف هنین با حوازن و سقیف با اون قبایل جنگ کردند با قرش جنگ نکردند و بشر الذین کفرو بی عذاب علیم کسانی را که کفر کردن یعنی انهایی که میخواند هنوز به کفر بمانند و اصرار بکنن بر کفر مجده بده اونها را به عذاب دردناک عذاب دردناکی در انتظارشون است پس ببینید اعلام شد تا چند ما تا چار ما البته کسانی که مدتشون بیشتر از 4 ماه موند نه ماه اونها پیمان خودشون را نشکستند مشرکم هستند تا هم نهمه با اونها برید الا الذين عاهدتم من المشركين مگر انهایی که عهد کردید با آنان از مشرکان ثم لم ينقصوكم شيئا پس اونها کوتاهی نکردن در شما هیچ چیزی ولم يظاهرو علیکم احدا وبر علیه شما هم پشتیبانی و حمایت نکردند از احدی فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم شما مسلمانان تکمیل کنید عهد آنها را تا مدتشان مدت نوما هست تا هم نوما تکمیل کنید ان الله يحب المتقين همانا انا الله دوست دارد بندگان با تقوارا ببینید يحب المتقين این متقین به کیا گفته شده اونهایی که تغوارا درباره باره کفار رعایت میکنند. یعنی از خدا بترسید شکنی نکنید حتی با مشرکان چه دین زیبای خدا به ما داده چه دینی که واقعا ظاهرش و باطنش است اول و آخرش صداقت است اون مشرکی که با ما پیمان دارد تا دو سال تا سه سال تا پنج سال ما باید از خدا بترسیم در برابر او یعنی اول اینکه که کافر از حقی دارد بر ما حقش اینه که به او تعرض نکنیم حقش اینه که وقتی او را پناه دادیم جان و مالش را حفاظت کنیم مثل یک مسلمان باید ازش مراقبت و محافظت بکنیم ان الله يحب المتقین خدا دوست دارد متقین را متقین کیا هستن اونایی که عهد نمیشکنند. حتی با کفار عهد نمیشکنند. این غلطه که قبلن هم ارز کردم ما با کفر معامله بکنیم بعد بگیم کلا بذاریم سرشون چون کافر است نه اگر اونجا انسان فریب بده و از طریق فریب مالش را بالا بکشه این انسان مجرم هست این انسان مسئول است این مال براش حرام است یه کافری هست از وام گرفته مثلا صد میلیون وام گرفته الان میگه این کافره چرا بهش بده این صد میلیون برای حرام است مسلمان باید با تقوا باشد و تقوا را نه تنها با مسلمان باید رعایت کنی با غیر مسلمان هم باید رعایت کنی باید صادق و صاف باشی این تعلیم اسلام است این برنامه تربیتی اسلام برای من و تو است از. از من و تو می‌خواد این گونه باشیم اما وقتی که 4 ماه گذشت و ماهای حرام هم گذشتند و این مشرکین به دشمنی ادامه دادند اونها را بزنید الله می‌فرماید فاذا سلخ الاشهر الحرم زمانی که ماهای حرام گذشت زمانی که ماه حرام گذشت فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم ببین اینا همون مشرکین هستند که این مشرکین پیمان شکن هستن مشرکین را بکشید هر جا یافتید اونها را و بگیرید بجرید وحصروهم زندانشون کنید وقعدو لهم كل مرصد هر کامیگاه برایشون کمین بشینید این مشرکینی که دیگه جنگ با اونها داریم، فانتابو تابو، ببینید تا چند سویت که جنگ را ما متوقف می کنیم. یک اسلام بیاره. اگر مسلمان بشه باش جنگ نداریم. دو اسلام یا تسلیم، تسلیم بشه، تسلیم بشه یعنی نیче. یعنی نهی که مسلمان بشه. به همون کفرش می ولی قانون ما را چیکار می قانون ما را غبول می قانون ما را می پذیره. مثلا هر قانونی که اسلامی هست در رابطه با تمام احکام نه اینکه احکام را عمل می کنے درباره تمام احکام قوانین اسلامی را می پذیرت خب اون وقت ما هم بهش امان می دیم پس یکی اسلام یکی تسلیم و دستورت صورت تسلیم یکی از قوانین چی هست جزیه هست یعنی باید ما وقتی که از مالش از جانش از ناموسش حفاظت می اون بدل به ما بده عوض بده ماهانه یک چیزی تایم میشه، اون را باید بده لذا تنها راه راه شمشیر نیست یا شمشیر یا اسلام یا تسلیم یا معاهده اگر معاهده بود بود پیمان بود اگر باهم دیگه به توافق رسیدیم به معاهده عمل می کنیم. الله می فرماید: و این احدم فا، این تابو و اقیم الزکات، اگر تو بکردند از کفر و شرک نماز را برپا پا داشتند و الزکات دادند، فخلو سبی راهشان را بزارید. راهشان را چی؟ آزاد بزارید. یعنی باشون کار داشته نواشید در آیه دیگه میاد ف اخوان فی الدین برادر دینی شما میشن چون ما با اونها از نظر برادری مشکل نداریم ما از نظر دینی با اونها مشکل داری. ان الله غفور و رحیم بدون شک خداوند اززا و جل غفور و رحیم هست هر چی که در گزشته اونها قدر و خیانت کردن خدا میبخشد اما یک صورت دیگری اینه که اگر یک کافری بخواد میگه من میخوام با شما صحبت کنم مذاکره بکنیم هم ما ما هیچ وقت برای جنگ راضی نخواهیم بود هر ای برای پایان جنگ باشد که در اون عزت ما باشد ما راضی خواهیم بود لذا خداوند میفرماید و این احد من المشرکین از اگر یکی از مشرکان از شما پناه بخواهد فا اجیر او را پناه بده ورا را پناه بده حتی یسمع کلام الله حتی که کلام خدا را بشنود یعنی چه؟ یعنی پیام خدا دین خدا اسلام هرچی که لازم هست در مذاکر با او گفته بشه بشنود بعدن وقتی که گفت نه من مسلمان نمیشم من تصریب نمیشم بعدن هم او را نکش سم ابلغ و مأمنه ببر او را به همون جای امرش برسان. ببین چه, چه دینی هست مشرکم حقی داره کافرم حقی داره او از اونجا بلند شده اینجا آمده پیش تو که با تو مذاکره بکنه بعد از اینکه به نتیجه نرسیدی ببر به همون محل امن او را برسن گرچه با هم دیگه جنگ دارید دی. ولی تا زمانی که اونجا به سنگرش نرفته شما اجازه جنگ ندارید سم ابلغ هم امنا زالک به قوم الله یعلمون چرا با اینها بشینیم چون خداوند میفهمه اینها قومی هستن که نمیدانند دین خدا را از دین خبر ندارند دین را بهش معرفی بکن لذا ببر برسان اورا كيف يكون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله حال خداوند از زوجل میفرماید که مشرکان که عهد ندارند چون مشرک پایبند نیست. مشرک نه عهد را پایبندی میکنه نه قرابت را پایبندی میکنه. در گذشته ثابت شده رسول الله از نزدیکترین فرد افراد اونها بود. از یا برادرزاده بود یا پسرعمویشون بود یا فامیل دیگه بود. بالاخره اونها رسول الله صلی الله علیه و وسلم را بیرون کردند. بر علی رسول الله توطعه کردند و بعد بعداً در حدیبیه با رسول الله پیمان بستند پیمان را هم شکستند پس چطور با این مشرکین پیمان بسته بشه چطور ما برقرار بمانیم بر تا ابد تا ده سال لزمه خودشون شکستند خودشون خیانت کردند البته اونهایی که کنار مسجد حرام با شما پیمان بستن تا زمانی که اونها بر پیمان خودشون پای بند استن شما پای بند باشید کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله چگونه برای مشرکین اهدی خواهد بود نزد خدا و نزد رسول خدا ایلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام مگر اون قبائلی که شما با اونها اهد بستید نزد مسجد حرام دوتا قبیله بودند بنو زمره و بنو کنانه خب فما استقامو لكم فاستقیمو لهم تا زمانی کنها استقامت کنم بر آهد خودشان شما هم استقامت بکنی بر وفا وفادار باشید غدار و خائن نباشید بازم خدا میفرماید، ان الله يحب المتقين خدا اهل تقوا را دوست دارند این تقوا و خدا ترسی تقوا و خدا ترسی هست که شما به خاطر دشمنان خدا از خدا می ترسید یعنی با اونها خیانت نمی کنید پس چند بار این تقوا رعایت میشه معلوم میشه که ما مسلمانان در باره رفتار با کفار هم باید تقوا را در نظر بگیریم و بعد خداوند فرمود که چطور این میتونه عهدی داشته باشند در حالی که خودشون لحاظ نمی کنند کیفه این اعاده ای لبعد العهد کیف کیفه یعنی اون عهد چگونه خواهد بود در حالی که و این یظهرو علیکم اگر مشرکان بر شما غلبه کنند لا یرقبو فیکم الا ولا ذمه در شما لحاظ نمی کنند نه رشتداری و خیش را ال یعنی رشتداری خیشاوندی نه را رایت میکنن ولا زمه و نه پیمان را مگر شما پیمان ده ساله نبستید چرا بعد از دو سال شکستن مگر شما خیشاوندشون نبودید چرا شما را نگذاشتن مسجد الحرام؟ پس نه خیشاوندی سرشون میشه نه پیمان اینها در واقع موقعیت خودشون را نگاه میکنن این خصلت خصلت همه کفار است. همه مشرکین ہیں هم. اما ما مسلمانان مثل انہا نباشی ما کہ ما مثل انہا باشیم فرق ما با اونها چیه ما دین داریم کتابی داریم آئینی داریم حَمے امروز کشورهای کفار را کشورای اروپا ایران آمریکا را نگاه بکنی با خیلی کشورها معاهده داره، قرارداد داره. ولی همین کمی می‌بینید که این کشور وضعش خراب رهايش میکنه، به حال خود فرار میکنه. لذا اینها هم هم پیمان نیستن اینها همه دروغ های سیاسی هستن اما ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم پیمان داشت با یک قبیله مشرک با بنو خضاعه به خاطر اونها از مدینه بلند شد چون پیمان داره تعهد داره مسلمان باید اهل تعهد باشه اهل پیمان باشه لذا خداوند می اونها آنها رعایت نمی کنند لا يرقبو فیکم الا ولا ذمه رایت نمیکنند در شما نخی شاوندی را و نه پیمان و اهدرا. یورو نکن بیا افواهیم شما را با دهانشون راضی میکنند با زبان راضی میکنند. کشورها امروز هست انسان نگاه میکنین کشورهای اروپایی بعض با کشورهای اسلامی دوست هستن فقط دوستیشون با دهان است در عمل نیست. وقتی که خطر باشه پشت را خالی میکنند هم پشت خودشون را خالی میکنند هم پشت مسلمانان را خالی میکنند لذا یردونکم افواهیم شما را راضی میکنن با دهانشون با زبانشون و با قلوبهم دلشون انکار میکنه نمی اون چیزی که به زبان میگن دلشون قبول نمیکنه با زبان میگن ما کاملا با شما هستیم ولی دل میگه نه نیستیم امروز حاکمان مسلمان باید بیدار باشند این حاکمان مسلمان بی خود اعتماد میکنن به یهود و نصارا بجایین که با اونها به اونها اعتماد کنند با اونها پیمان ببندند با اونها دوست بشند با خودشون دوست بشند چرا کشورهای اسلامی الان چند گروه هستند چند گروه هستند با هم دیگه مشکل دارند لذا یک طرفش ایران هست یک طرفش عربستان هست یک طرفش ترکیه هست همه اینها ادعای اسلامی بودن را دارند همه اینها ادعا دارند که پرچم اسلام را به دست دارند و هر یکی بنوع خدمت میکنه ولی چرا با هم دیگه مشکل دارند با دیگران ارتباطشون خوبه لذا این دیگران کفار چه آمریکا باشد، چه اروپا باشد، چه روسیه باشد، اینا هیچی کی پیمان ندارن کافر کافره، الکوفر ملتون واحده. کفر همه ملتش ملت واحده هست الله که اینها را خلق کرده و میشن آسد بهتر از ما اون رب میگوید که یردونکم بی افواههم اینا با زبان و با دهان شما را راضی میکنند و تأبا قلوبهم دلهایشون انکار میکن این چیز را و اکثرهم فاسقون اکثر اینها شرور هستن اهل شرارتند تا زمانی که منافعشون ایجاب بکند در کنار شما هستند تا زمانی که پول نفت شما را بالا بکشند و هزینه های خودشون را از طریق شما تکمیل بکنند در کنار شما هستند هر وقتی که منافع ضعیف بشه پشت شما را خالی میکنن اصلا قربان خدا برم گویا شرایط امروز را الله عز وجل در نظر گرفته و این آیات را برای ما بیان می فرمائد. لذا الله تارا دلیل شرارتشون را میگه این دلیل شرارتشون چیه دلیل شرارتشون پوله اینا منافعی خاندینا دلسوز نیستند اشتروا بی آیات الله ثمنن خلیلا اینا خریداری کردن در مقابل آیات الهی یعنی کفر را انتخاب کردن پول اندکی فصد و عن سبیل به خاطر بعض آمدن در از راہ خدا انهم سا اما كانوا عملون اما انها بسیار بد رفتار میکنن بد عمل میکنند لذا الله تعالی مجدد می فرماید اینها دوست شما نیستند لا يرقبون في مؤمنن الاه ولا زما انها رعایت نمیکنن، کنن لحاظ نمی کنن در هیچ مؤمنی درباره هیچ مؤمنی الا خیشاوندی را ولا عهد و لازمتن اهد پیمان را خیشاوندی و اهد پیمان سرشون نمی فقط پول و دلار را می شناسند این اینا متجاویزان هستند لذا اینها وقتی که این طور هستند اخلاقشون خصلتشون، صفاتشون اینه پس قابل اعتماد نیستند نباید مسلمانان به اینها اعتماد بکنند و بدتر از اون دردنادتر از اون با هم ناجور باشند چونکه پشتشون این باشند نه این ها به درد نمیخورند با هم بشینند خودشون مشکلات خودشون را حل کنند خودشون سعی صدر نشون بدند و نه از این ارباب خط بگیرند نه از اون رضا الله میفرماید بعض هم همین کفار و مشرکان اگر توبه کردن بعض هم شما هستن معلوم میشه که دشمنی ما با افراد نیست با با در واقع اون دین و آین کفری هست همون غیر مسلمان اگر مسلمان بشه میشه برادر ما فا انتابو و اقامو الصلاة و آتو الزکات. اگر توبه بکنن توبه بکنن از شرک نماز برپادارم زکات بدن یعنی مثلا احکام دین را اجرا کنن فا اخوانکم فی الدین برادران الدينية شما حسنا ونفصل الآيات لقوم يعلمون إن آيات را ما تفسير وار بيان ميكنيم وروشان وآشكار بيان ميكنيم براء قوم كي ان قوم يعلمون مستفيدين من الآيات باشا آيات را بدعمل وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و الطعن في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر الله عزوجل وجل می فرماید که اگر اینها عهد را شکستند و طعنوا في دينكم در دین شما طعنه زدند یعنی نسبت به دین توهین کردند تمسخر کردند شما بجنگید با ائمه کفر یعنی با سردارانشون بجنگید با حاکمانشون بجنگید با ملت چرا نه چون ملت گناهی ندارد کسی که عهد را مشکنت کی هست همون سردمداران هستن همون رؤسا هستن با اونها بجنگید اینجا قرآن گفته وَتَعْنُوا فِي دِينِكُمْ در دین شما اگر اینها چیکار کردند تانه زدن یکی از صورتهای تانه توهین به قرآن هست چنانچه امروز انجام میدهند کفار کشورهای کف و همچنین توهین به رسول الله صلی الله علیه وسلم است. اگر کشورهای کفار این کار را کردند دیگه این عهد را با ما شکستند بین ما و اونها عهد تمام شد باید چیکار بکنیم؟ باید رابطه را قطع بکنیم باید رابطه قط بشه چون ما هر چه از همین دین داریم نباید حاکم مسلمان اینقدر بی‌غیرت باشه سرش را پایین بگیره اونجا داره بر علیه قران توتے میشه اونجا داره بر علیه قران توهین میشه نسبت به رسول الله بدترین کارها میشه فلم و کارتون درست شه کاریکاتور درست میشه حاکم مسلمان بخاطر مسائل اقتصادیش ارتباط رغت نمی کنه به بخاطر وارد کردن کالا صادر کردن کالا برای فروش گاز و نفت اینها ارزش نداره در مقابلی اون چیزی که اونها دارن میکنند باید اگر کسی مسلمان است بوی از مسلمانی دارد باید قط ارتباط بشه مگر اینکه به قول امام اعظم امام ابو نی فرحمه الله اونها معذرت خواهی بکنند از کاری که کردن معذرت خواهی بکنند علنی بگم ما اشتباه کردیم دوباره از این اشتباهات نمی کنیم اون وقت قابل بخشش هستند به غیر از این نیستند اما یه مسئله دیگری گاهی اتفاق میفته الان در پاکستان یک جنجالی هست روی همین که اگر در داخل ما یک کافری آمد و توهین کرد مثلا در پاکستان مسیحیان زیاد هستند، در ایران هم هست یهودی هست مسیحی هست اگر یکی از اینها آمد به پیغمبر به رسول خدا توهین کرد بد و بیراه گفت تعنو فی دینکم همینه یا آمد به قرآن توهین کرد بعضی ها قرآن را گاهی زیر دست و پاشون میکنند تو خونه ایشون بعضی تو فضای مجازی ام اینها را باید پیدا کرد امام ابو انیس رحمه الله میفرماید که به اینها اولم امام ابو نرمتر میگه میگه به اینها مهلت بدید توبه بکنند معذرت خواهی بکنند از جمع معذرت خواهی بکنند بعدا هر تنبیحی که حاکم مناسب می دونه را برایشون برایش انجام بده اگر تنبیه حتی تنبیه در حد قتل باشه به نتیجه برسه که این باید از بین بره تا برای دیگران عبرتی باشه قاضی می این تصمیم را بگیره بقیه علماء می گویند اولین چیزی که بشه شهروندی را از او سلب بکنند ببین تا زمانی که شهروند ماست ما نباید پیمان شکن باشیم تا زمانی که شهروند ماست لذا ما به او تحفظ دادیم به او امان دادیم جان و مالش باید محفوظ بمانه خب الان توهین کرد توحین که کرد امام ابوانیفه میگه شهروندی را از او سلب نکنید تا آخر نمیتونی شهروندی را سلب بکنید چرا؟ به عنوان تنبیح میتونه حکمی صادر بشه اما بقیه علماء میگن نه اولی چیزی که هست شهروندی از سلب بشه یعنی حاکم رسمن حکم صادر بکنه این آغا به بعد شهروند ایران نیست شهروند کشور پاکستان نیست هر کشوری کی بود بعد از اینکه شهروندی سلب شد اون امنیت هم خود بخود چی میشه؟ سالمی دیگر رازم بیستی که غازی ہو کنه بعد از اون حقش کشتنے چونکه به اسلام توہین کرد بے رسول اللہ توہین کرد لذا اگر طن تان وطنوا فی دینكم در دین شما تان زدم زدن فقاتلو ائمه الکفر باین با ائمه ای کفر بجنگید انهم لا ایمان لهم برا اینها هیچ اهدی نیست پیمانی نیست بجنگید لعلهم ینتهون تا از کفر و شرک باز بیایند بجنگید با اونها بس ببینید بعضی اعتراض کردند که چرا باید جنگ بشه جنگ چیزی خوبی نیست الله عز و جل می شما فساد اون طرف را هم نگاه کردید خباست اون طرف را هم نگاه کردید اگر انسان بر یک ظالم رحم بکنه ظالمی که مظلومین را کشته ظالمی که مظلومین را شکنجه داده بر این ظالم رحم بکنید در واقع تو به این مظلومین ستم کردی لذا شما اون طرف دیگری قضیه را هم نگاه کنید اون طرف دیگری سکر هم نگاه کنید اینجا قرآن مجید به اون سمت دیگه توجه مارا برده فقط اعتراض میکنه اسلام چرا جنگه چرا جنگه خب آیا احوال کفار را ہم نباید در نظر بگیریم اللہ می فرماید اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا اَيْمَانَهُمْ آیا شما نمی جنگید با اون قومی کے پیمان را شکستان اولین خیانتشون پیمان شکستند دومی دو و همو هم به اخراج رسول و اینها قصد کردن اخراج رسول را و رسول الله را از شهرش مکه بیرون کردند و سومی سو و هم بدعوکم اول مره و اونها آغازگر فتنه بودند آغازگر جنگ بودند بار اول اونها آغاز کردند بعضا با اونها نمی جنگید می اتخشونهم آیا این کفار و مشرکینی که این همه فساد دارن این همه خیانت دارن آیا از اونها ترسید نترسید فالله احق و انتخشو اللہ سزاوار ترس از اون بترسید این کنتم مؤمنین اگر شما مؤمن هستید از خدا بترسید از مشرکان نترسید و خدا تعالی اینجا فرمود با اونها بجنگید این البته در رابطه با قبل از مک فتح مکه است که میخوام فتح بکنند کسی اعتراض کرد که خب ما با معاهده ده ساله داشتیم می فرماید شما معاهده ده ساله داشتید ولی اینها آغاز کردند اونها پیمان شکستند الان با اینها باید بجنگید لذا می میفرماید قاتلوهم با انها بجنگید یعذبهم الله با ایدیکم اللہ انها رب دستان شما عذاب می ويخزهم و یخزهم اللہ انها را رسوا می کنے و علیهم و غلب بر آنان شما را نصرت می و یشف صدور قوم مؤمنین و هم دل مؤمنین را یک قومی از مؤمنین یک گروهی از مؤمنین را دلشون را خدا خونک میکنه دلشون خونک میشه دیگه این همه ستم با اونها شده بهترین افراد مؤمنین را نکشتند حمزه را شهید کردند مصعب ابن عمیر را شهید کردند بقیه بهترین یاران رسول الله را شهید کردند بالاخره با اینها که حسلیم نمیشم بجنگید تا دل مؤمنین خنک بشه نوبت اونها که بود جنگ اشکال و ایب نذاشت الان که نوبت شماست جنگ ایب داره و یشفی صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم و غیظ قلوبشان اماز بین زائل می رضائل میکنه خداوند و یتوب الله علی من یشا اشاره به این است که بعضی ها بعدن ایمان میارن ازمی مشرکین خدا رجوع میکنه بر هر کسی که بخواهد یعنی چه؟ یعنی انها به خدا رجوع میکنن ایمان میارن خدا هم به انها رجوع میکنند توبیشون را قبول میکند والله علیم حکیم خداوند هر چیز را داناست و کارهای خدا با حکمت است حکیم است ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذين جاهدوا منكم اینجا بحث اینه که چرا جهاد اللہ تعالیٰ می فرمد جهاد و بعضی از تکالیف شاقه و مشکلی که برای شما می آید خدا می خواد مومن مخلص را باون مؤمن ظاہری مشخص بکند نمایام بکند شما باید برای سختیها خودتون رعایت کنید. یه روزی شاید بیاد نص الله العافیا. از خداوند همیشه عافیت و امنیت میخوایم. ولی یه روزی اگر بیاد که جهاد لازم باشد، خدا میخواد اونجا بدونه که چکسی ترسو هست زندگیش را دوست دارد. و چه کسی برای خدا و دین خدا و برای دفاع از کیان مسلمین جانانه می جنگد لذا اللہ می فرماید ام حسب ان انتو ترکو آیا شما می که شما می حال خود رہا می ولما و الله الذين جاهدوا منكم. جاهدو هنوز مشخص نکرده خداوند انهای رکی از شما جهاد کردند و جهاد می هنوز اونا مشخص نیستند مجاهدین راستین باید مشخص بشند ولم و لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولیجا هنوز مشخص نشدن اونهایی که نگرفتند به غیر از خدا و به غیر از رسول خدا و بغیر از مؤمنین دوست دلی و دوست صمیمی بسیاری هستن که دوست دلی و صمیمی اونها کیه مؤمنین هستند رسول الله است الله است یعنی دلداده اینها هستن دلداده کفار نیستن اونای که دلداده کفار هستن دوست ندارن با کفار بجنگن چون اگر بجنگن اقتصاد اونها خراب میشه تجارت و معامل اونها به هم میخوره سفرهای تجاریشون کنسل میشه لذا بعضی ها منافع مادی را در نظر میگرن بعضی ها دین را والله خبیرون بما تعملون خداوند خبر داره بی اونچه که شما عمل میکنید ما خانه للمشرکین ان يعمروا مساجد الله ببین بعد از اینکه اعلام براءت شد مشرکین میگه ما خانه خدا رو تعمیر میکنیم الله میفرما نه برای مشرکین نیست تعمیر کنندگان خانه خدا مساجد باید مسلمانان باشند غیر مسلمان نمیتونه باشه ببینید مسلمان مسجد را تعمیر میکنه به چه هست دو معنا داره یکی تعمیر مسجد با عبادت در مسجد با حضور فعال و با رونق شما در مسجده همین که ماشاءالله شما میایید در این مسجد برای نماز جا میشه شما این مسجد را آباد دارید شما تعمیر دارید این دلیل ایمان است میگه کسانی که مساجد را تعمیر میکنند آباد میکنند البته همیشه نه فقط در یک ماه کسانی که مساجد را آباد میکنند اینا به خدا ایمان دارند به همین دلیل هر کسی از همسایه‌ ها همسایه‌هاتون دیدید که پنج وقت به مسجد میره شما میتونید بر اساس این آیه قرآن بگید این مومن است چون خدا گفته هر کسی که مسجد را آباد میکنه کنه اون مومن است می آیش را پس یک معنی تعمیر اینه معنی دوم تعمیر تعمیر فیزیکی هست ساخت و ساز هست مشرکین اللہ می فرماید ما کان للمشرکین برای مشرکین نیست ان یعمرو مساجد اللہ اینکه مساجد خدا را تعمیر بکنند در حالی که از یک طرف میخواه اونجا تعمیر بکنه شاهدین علی انفسهم بالکفر در حالی که بر خودشان گواهی کفر میده یعنی از یک طرف کفر میکنه از یک طرف پول خرج میکنه مسجد میسازه از یک طرف شرک میکنه از یک طرف مسجد میسازه نه خود مسلمانان این کار را بکنند مشرکین را نگذارند اولئک حبطت اعمالهم اینها اعمالشون برباد است و فی النار هم خالدون در آتش همیشه ماندگارند ببینید مساجد را پس چی کسی تعمیر باید بکند الله می فرماید انما یعمرو مساجد الله جز نیست که تعمیر می کند مساجد خدا را من آمن بالله والیوم الاخر اون مسلمانی که ایمان دارد به خدا آن مومنی که ایمان دارد به خدا و ایمان دارد به روز آخرت روز جزا و اقام الصلاات. اون مومنی که نماز را برپا می دارد و آت و اون مومنی که زکاة می و اون مومنی که ولم یخش ایلال الله بغیر از الله از هیچ کسی نمی ترسد نه از بت می ترسد نه از طاغوت می ترسد فعسى اولئك ان يكونوا من المتدين اگر مؤمن این صفات را داشته باشد فعسى یعنی وعده خداست اولئك این گروه ان من المهدین انها از هدایتی یافتگان باشند یعنی به با کجا هدایت میشن هدایت میشن به سوی بهشت هدایت میشن اینا را خدا راهنمایی میکنه بریم به بی بهشت اینا را خدا وعده کرده مؤمنی که داره این صفات باشه خب ارز کردم مراد است تعمیر آبادی هر دو آبادی مراد است حالا سوال این است که اگر یک مشرک یک کافر بیاد مسجد را آباد بکنه پول خرج بکنه پول خرج بکنه و ما بعدا میبینیم که مسجد را درست کرده چیکار کار بکنیم مسجد را دوباره خراب بکنیم نه خیر اصل اینه که شما مسلمانان خودتون بکنیم نیاز بیوم کافر و مشرک نباشه اما اگر یه وقتی او پول خرج کرد دیگه اون مسجد تخریب نشه بذار خدا تعالی گاهی از کافر هم کار میگیره مگر بیت الله را مشرکین درست نکردند در زمانی که رسول الله هنوز پیغمبر نشده بود گفتند بیارید پول حلالتون را همونطور که مشرک بودند معتقدم بودند گفتن ما حرام زیاد داریم از پول حرام برای بیت الله خرج نمی کنیم بیارید پول حلالتون را های حلالشون را جمع کردند بیت الله را باستان حتیم هم جز بیت الله است نیم کار ماند به خاطر اینکه بیشتر پول نداشتند همین قدر که امروز ماند همین قدم هست همین قدر ماند لذا بعد از اینکه مکیفت شد آیا رسول الله در همون جنی ماسخاند یا نه همون جنی ماسخاند بنای مسجد بنا از پول مشترکی بود ساخت مسجد از پول مشرکیم بود حتی رسول الله دوست داشتم به ام المومنین عایشه گفتند ای من دلم میخواد که خانه کعبر که قوم تو این را ساختند تخریب بکنم دوباره از همون اول بر بنای ابراهیم بنایش بکنم حتیم را هم کامل بکنم چون این در را که یک غدینا بلند کرده بودند این در را بیارم پایین تا هر کس راحت بتونه داخل بشه قریش که متولی بود و قریش که ارز به خدمت شما کلیدار خانه کعبه بود اینا می گفتن هر کسی نمیتونه داخل بره باید از ما اجازه بگیره ما اجازه بدیم لذا از طرف خود زمانی که درست کردند یک قد در ربالا گذاشتند که هر که باید اینا اجازه بدن نردوان بگذارن بله بالا از اونجا نردوان بذارن بید پایین پس رسول الله گفت: ای عایشه من دوست دارم به همون بنای اول ابراهیم ببرم این در را بیارم پایین تا مردم راحت بتونند اما چون مردم تازه مسلمان هستند دوست دارن که بالاخره در دلشون شک و شبهه تردیدی جان نشه لذا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله به این خاطر خانه کعبه را خراب نکردن گذاشتن بر همون بنایی که خود مشرکین داشتند این حدیث را حضرت ام المؤمنین عایشه برای خواهرزاده عبدالله ابن زبیر گفت عبدالله ابن زبیر فرزند حضرت زبیر رضی الله عنهما مادرش اسما هست اسما دختر ابو بکر اسما خوهر بزرگ عایشه هست عبدالله بن زبیر زاده عایشه هست این حدیث را از خاله شنید بعدن در زمان یزید وقتی که یزید اعلام خلافت کرد در شام عبدالله بن زبیر گفت من بیعت نمی کنم بعد از وفات معاویه رضی اللہ تعالی عبدالله بن زبیر آمد مکه را تصرف کرد و اعلام خلافت کرد گفت که من خلیفه هستم لذا خلیفه مسلمانان شد بعد از چیکار کرد عبداللہ بن زبر چون این حدیث را شنیده بود ها در زمان عبداللہ بن زبر درگیری شد سپاہ یزید که بعد از یزید سپاہ عبدالملک بن مروان بود چون یزید زیاد نمان زود مرد در زمان عبدالملک بن مروان حجاج بن یوسف از طرف عبدالملک بن مروان فرمانده بود فرمانده جنگ بود وق توپخانی زدند بخشی از خانه کعبه خراب شد و غلاف خانه کعبه سوخت عبدالله ابن زبید دست نزد وقت حج شد به مسلمانان گفت ببینید چیکار کردن اینات خودشون را مسلمان میدانند میخواست که بر علیه ها تحریک بکنه بالاخره عبدالله ابن زبید گفت شما چه مشوره میدید چکار بکنم؟ همین را اصلاح بکنم، مرمتش بکنم یا از ابتدا خانه کعبی را تخریب بکنم از اول شروعش بکنم بعضی ها گفتند که بیت بزار بماند به همون بنایی که مردم اون زمان ایمان آوردن تا یادگاری بماند بعضی گفتند که از اول درستش کن. و از یک شایه شده بود که اولین کسی که بیاید خانه خدا را تخریب بکند از از آسمان میاد اون را از بین میبرد. این یک شایه در میان مردم بود. الله بن زبیل گفت پس من سه روز استخاره میکنم بعدا تصمیم میگیرم هرچی خدا به دلم داد. بعد سی روز تصمیم گرفت گفت نه این خانه را هم اون حدیث بیادش بود که رسول الله دوست داشت خانه کعبه مقدار بیشتر حتیم هم جز خانه کعبه بیاد و هم در را بیارم پایین و ارتفاع بیشتر بکنم همه اون چیزی که آرزوی رسول الله بود اونها را گفت که من بجا میارم لذا دستور داد که تخریب بشه مردم همه میترسیدن میگفتن نکنید یک نفر رفت بالای خانه کعبه شروع کرد تخریب اول یک سنگی را انداخت دیدن چیزی نشد عذاب نیامد بعدم بقیه مردم کمک کردن خانه کعبه را تخریب کردن از اول بنایش کردن از اول ساختن به همون صورتی که تمنای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود به همون صورت خانه کعبه را چیکار کردند؟ ساختند وسیعش کردند در را پایین آوردند هر کسی راحت میتونست چکار بکنه وارد خانه کعبه بشه اما بعدن خلاصه جنگ و درگیری ادامه یافت آخر عبدالله بن زبیر این صحابی رسول الله را گرفتند شهیدش کردند اعدامش کردند تو مکه سپاه حجاج ابن یوسف اعدامش کرد حجاج خیلی ظالم بود و بعدن دوباره خانه خدا را تخریب کردن مثل اول در آوردن چون اونا این حدیث به سمعشون نرسیده بود و اون خلیفه اون زمان در را دوباره بالا گذاشت مثل همین امروز دوباره گذاشت بعد گفتن که عبد الله ابن زبیر از طرف خودش این کار را کرده یک نفر دیگه همینجا بود در همون جلسه خلیفه گفت نه منم از ام المامین شنیدم عائشه گفت که رسول الله آرزوش این بوده که در پایین باشه بعدن این خلیفه پشیمان شد گفت کاش من قبلا این حدیث را می شنیدم من فکر کردم عبد الله ابن زبیر از خود این کار را کرده به این خاطر دوباره من جابجا کردم به همون شکل اولی در آوردم خلاصه بعد از این که دولت اموی ها تمام شد اباسی ها سرکار آمدند یکی از خلفاء سالح اباسی هارون الرشید بود و علماء و ائمه تمام مشاورانش بودند هارون الرشید گفت که من میخوام با امام مالک مشوره کرد امام مالک ابن انس امام دار الحجرہ با اون مشوره کرد گفت من میخوام دوباره خانه کعبه را تجدید بنا کنم در را بیارم پایین چون این حدیث حدیث درستی است از رسول الله اما این زمان امام مالک مشوره نداد گفت خلیفه بعد از این دیگه خانه کعبه بازیچه دست خلفا میشه هر خلیفه بیاد دوباره خراب میکنه وقتی با خلیفه اول مخالف باشه دوباره در رمی بر بالا باز میاره دوباره در رمیاره پایین هی ای دیگه اینجا بجا میشه بازیچه میشه بسیار بیشتر حرمت حفظ بشه حرمت ارعت بشه هارون الرشید خدا مغفرتش بکنه مشوره را قبول کرد بعد از اون دیگه خانه کعبه به همون صورت ماند خلاص این تاریخی بود در تخریب خانه کعب دور رفتم فقط میخواستم این را اثبات کنم که اون چیزی که مشرکین ساخته بودند رسول الله صلی الله علیه وسلم بر همون ماند نماز خاند در همون مسجد نماز خواند لذا مال مشرک اگر مسرف بشه برای مسجد ایرادی نداره همین مسجدی که شما درست میکنید یه کافر بیاد یه مشرک بیاد اعتقاد داشته باشه معتقده من اینجا پولم را مصرف بکنم به هدر نرفته میگه من میخوام اینجا پول مصرف بکنم بده به شما میتونید گنجایشش هست پولش را بگیرید مسجد را درست بکنید اما بهتر اینه که خدا میگه خود مسلمانان بکنند خود مسلمین بکنند لذا الله می فرماید که مسلمین تعمیر می کنند تعمیر را هم عرض کردم دو معنی دارد یکی آبادی با عبادت یکی آبادی با ساخت و ساز هر دو را شما مسلمانان انجام بدهید اجعلتم سقایت الحج و عمارت المسجد الحرام ببین مشرکین خودشون را بعضی از کارهای خودشون افتخار می کردند بعضی وقت انسان فهمش کوتاه باشه یک کار کوچیکی که انجام داده این کار خودش را بزرگترین کار میداند از طرف دیگر بزرگترین جنایت و خیانت را میکنه فکر میکنه که اصلا بی اون بودش فکر نمیکنه اون بودش فکر نمیکنه مثلا یه آغاای هست یه آغاای هست به یک فقیر ده هزار تومن داده این را برای خودش افتخار میدونه اما از طرف دیگر کل مال یتیم را بالا کشیده. اون را نمی بینه، اینم می بینه. مشرکین گندهایی که داشتند، اشکالاتی که داشتند، اونا را نمی دیدند. اشکالشون چی بود؟ شرک بود، غیرالله پرستی بود. زمانی که حاجیام می میامده یک لیوان شربت میداد همین را برای خودش ای کفتخار میدانست. گاهی انسان یک خیلایی میده، یک لیوان شربتی میده، یک کاسه آش میده. اما بررسی نمی کنه اشکالات کار من دیگه کجاست اونها رو برو اصلاح کن این شربتت این لیوان آبت به حاجی ها این پیشکش باشد برو خودت را اصلاح کن عقیدت مشکل داره لذا الله می فرماید اجعلتم سقایه الحاج آیا شما قرار دادید آبدادن حاجیها را و عمارت المسجد الحرام و عمارت مسجد را تعمیر کردن مسجد الحرام را کمن آمن بالله والیوم الآخر مثل اون کسی کی ایمان به بخدا و روز آخرت و جاد فی سبيل الله در رای خدا جهاد می کند این ها باهم مثل همستن نخیر لا يستبون عند الله نزد الله این برابر نیستن اونی که مشرک هست هر چی میده اون ارزشی نداره سات تا کعبت الله بنابو کن ارزشی نداره چون مشرک است هر چی نظر و خیرات بده ارزشی ندارد. باید خود ایمان خودش را درست کنه اما این کسی که ایمان داره به خدا روز آخرت جهاد میکنه، این پیش خدا ارزش داره لا يستهون عند الله والله لا یهد قوم الظالمین الله هدایت نمی‌کنه توفیق هدایت نمیده قوم ظالم را مشرک را الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله بأموالهم وأنفسهم چون یک نوت مقایسه بود تقابل بود تقابل مال یک مشرک کہ خانه خدا رب تعمیر کرده پول خرج کرده هر سال برای حاجی ها سویق و ستو خرج شربت درست میکنه، آب می دے، و یک طرف کسانی کے ان توفیق مالی را نداشتن پول خرج نکرده اما در خدا مال داده در رای خدا جهاد کرده مال داده اسب داده شطور داده اینها را اللہ بشارت میده اینها صحابه هستن اینها محاجرین انصار هستن اللہ میفرمه الَّذِينَ آمنوا، آنهای کی ایمان و وحاجروا وحجرت کردن وجاهدو فی سبیل اللہ و جهاد کردن در راه الله بی اموالهم و انفسهم با مالشان با جانشان جهاد کردن مثل صحابه مثل خلفاء مثل مهاجرین مثل انصار اعظم و درجتا عند الله این از نظر درجه اعظم هستن بیشتر و برتر هستن نزد خدا از کی از اهل سقایه و علی اماره ایما را از مشخصه اونای که آب میدادند و تعمیر میکردند. و اولائک هم الفائزون انها اینها انسان های ها فائز رستگار هستند. خدا این ها را خوشخبری هم میده. یبشروهم ربهم بررحمت من. مجدمیده آنها را رب شان با رحمتی از جانب خودش و رضوان و رضایی. چقدر زیباس. که خدا اونا را به رضای خودش میده یعنی ای بندگان من من از شما راضی هستم و جنات این رحمت الرضا رضا این چیه؟ این نعمت معنوی و روحانی هست و جنات نعمت جسمانی هست یعنی خدا هم جنت جسمانی میده هم جنت روحانی میده و جنات لهم فیها نعیم مقیم و جناتی که برای انها هست فیها دران جنات نعیم مقیم نعمت های همیشگی هست نعمت های دائمی هست نعمت چهار سال و هشت سال نیست همیشه عبدالعباد لذا اللہ تعالی می فرماید که پس برای جهاد برای جهاد برای حجرت آماده بشی۔ تا این جنات را کسب بکنی ببین بعضی وقتها مانعی میشه چنانچه امروز هم خیلی موانع وجود دارد موانع برای رای خدا وجود دارد برای جهاد وجود دارد بعضی وقت مثلا بعضی افراد میخواستن هجرت بکنند مرد میخواد هجرت بکنه زن میگه من نمیام. زن دوست داره هجرت بکنه مرد میگه من اینجا کار دارم درآمد دارم خب ایمان شما در خطره یا مثلا پدر نمیگذاره یا مثلا برای جهاد می بره زن نمیذاره پدر نمیذاره نمی فک و فامین نمیذاره برادر نمیذاره اون وقت جنت این طور مفتگی گیر نمیاد که شما هیچ چی نکنی بعدن انتظار بهشت را هم داشته باشی لذا الله می فرماید با پدران و برادرانی که مسلمان نشودند، غیر مسلمان ها معنی می شدند مسلمان نشودند، با اونها اینقدر سمیمی نباشید که اگر اونها نگذاشتن جهاد شما هم نروید يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم نجيرد پدرانتان را و برادران را أولیاء دوست سمیمی. إن استحبوا الكفر على الإيمان. اگر آنها کفر بر ایمان پسندیدن ترجیدادن و می تولهم میکنند. هر کسی با آنها سمیمیت داشته باشه دوست باشه. خدمت بلی ولی تهد دل نه فاؤلایک هم از غالیمون این افرادی هستن غالیم هستن و بعد بعد ازین الله تهدید میکنه قل این كان آباء اکم اي محمد صلى الله عليه وسلم بإنهابك اگر پدران شما وأبناؤكم وفرزندان شما وإخوانكم وبرادران شما وأزواجكم وهمسران شما وعشيرتكم وقبيلي شما قوم شما وأموال اقترفتموها وأمال هايك شما كسب کرديد أنهارا مثلا پاساج های شما ساختمان های شما و تجارت و همچنین تجارتی که تخشون کسا اون تجارتی که شما می ترسید از کساد اون تجارت از بیرونت بودن اون تجارت و مساکن ترضونها وهمچنین اون ساختمان هایی که شما دوست می دارید اون اون ها اون آپارتمان ها اون ویلا ها اون که شما دوستشون دارید و نمیخاید از زیر کولر و سپیلتش خارج بشید نمیخواید جای برید فقط همین جا بمانید اگر اینها احب ایلیکم من الله محبوب تر باشند برای شما از خدا و رسوله از رسول خدا و جهاد فی سبیلیه از جهاد در راه خدا اگر اینها محبوب تر باشند و شما خدا را خدا را دوست داشته نباشید یعنی حکم خدا را اطاعت نکنید دستور رسول الله را اطاعت نکنید به جهاد نروید فتربصوا منتظر باشید حتی یاتی الله بأمره حتی که خدا امرش ربیارد یعنی چه یعنی عذابی که بر ترک جهاد میارد اون عذاب ربیارد برشه دقت بفرمایید زمانی که جهاد لازم میشه و شرایط ایجاب میکنه مسلمانان برند به جهاد مؤمنان برند به جهاد در مقابل کفار بجنگند کفار اشغالگر را بیرون کنند اما مسلمان تجارتش نمیذاره خانهش نمیذاره زنش نمیذاره پدر نمیذاره اون وقت خدا میفرما منتظر عذاب من باشید عذابی که بر ترک جهاد خدا میاره چیه؟ ذلت است مثل بنی اسرائیل چهل سال در میدان تی سرگردان بودند هیچ جایگاهی نداشتند هیچ عزتی نداشتند نعمت های خدا را از دست دادند در همون میدان موسی سلام السلام وفات کرد هارون وفات کرد اینها هم مردند در همون میدان بعد نسل جدید آمد به پیغمبرشون گفتن شما خودت تو بقره ما جهاد میکنیم جهاد کردن بعدن خدا عزت داد پس اگر جهاد نکنید جهاد لازم باشد و جهاد نکنید اون وقت منتظر امر خدا باشید والله لا يهدي القوم الفاسقین اللہ عزوجل ہدایت نمیکنه یعنی توفیق ہدایت نمیده قوم فاسقرا اگر جهاد بکنید اللہ تعالی شما را فتح و نصرت میده همون طوری که شما را در حنین نصرت کرد و در معرکه های دیگر البته در حنین ابتدا یک آزمایشی آمد بعدا خدا نصرت کرد جریان حنین بعد از جریان فتح مکه اتفاق افتاد بعد از فتح مکه از به خدمت شما که جریان حنین بود جریان حنین چی بود؟ از کنم خدمت شما که رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام به طرف هنین رفت اونجا دو قبیله بسیار جنگجو بودند یکی بنو سقیف و یکی حوازن اینها مردان جنگجویی بودند اینها از قبل قبل از اینکه رسول الله برسد بس مسلمانان اینا سنگر گرفته بودن کوها را جاهای مهم را سنگر گرفته بودن یکی از دلائلی که قرآن میگه شما اینجا ابتداء شکست خوردید صحابه یک مقدار عجب آمد غرور آمد چطور عجب آمد؟ چون که در بدر سیصد نفر بودند مشرکین سه برابر بودند در اون بدر مشرکین را چیکار کردن شکست دادند اینجا جماعت صحابه دوازده هزار نفر بود ده هزار نفر وقتی آمدن مکه را فت کردند بعد از فتح مکه رفتن به طرف هنین دو هزار نفر از این نوع مسلمان ها هم با اونا همراه شد بعضی از سران مکه حتی بعضی از سرداران قریش هم همراه شد نزدیکان رسول الله همراه شدن رفتن دوازده هزار نفر رفتند خب جمعیت زیادی داشتند همه اسلحه را داشتند مشرکین چند نفر بودند هشت هزار نفر بودند یعنی چار هزار جمعیت مسلمانان چی بود؟ بیشتر بود وقتی که رفتند به اون تنگه رسیدند اطراف کوه بود یک تنگهی بود اونجا که رسیدند اونها قبل از قبل منطقه مالی اونها بود تمام از کنن بالا و پایینی منطقه را می شناختن سنگر خوب گرفته بودن شروع کردن تیر زدن به مسلمانان مسلمانان را چنان تیر زدن که مسلمان اصلا نمی این تیر از کدوم طرف میاد جنگ ناجوان مردانه بود اونا مخفی شده بودن جنگ تن به تن نبود روبرو نبود لذا مسلمانان به هر طرف فرار کردند نمی دونستا. این طرف هم کو این طرف هم کو این طرف می رفتن تیر می زدند این طرف می آمدن تیر می زدند و رسول الله تنها ماند البته چند نفر با رسول الله ماندند حضرت عباس اموی رسول الله در کنار رسول الله بود حضرت فضل بن عباس پسر عمویش بود و حضرت یا ابو سفیان بن حارث پسرموی پسر رسول الله بود حارث و عبدالله با هم برادر بودن در کنار رسول الله بود حضرت ابو بکر بود بعضی از صحابه تقریبا ده دوازده نفر بیشتر نبودند و بعد رسول الله همین جا که در وسط میدان بود بلند گفت انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب شما مسلمان چرا فرار میکنیم من نبی هستم نبی خدا دروغ نیست من فرزند عبد المطلب هستم بیایید و به عباس گفت عباس صدایش خیلی بلند بود بلندگو بود به عباس گفت که شما صدا بزن عباس صدا زد صحابه داشتن دور میشدن بیایید به طرف رسول الله همین صدا زدن باعث تقویت شد دوباره برگشتن برگشت اطراف رسول الله را گرفتند و شروع کردند به حمله کردن به طرف مشرکان دیگه بعد از اینکه شروع کردند دیگه مشرکان را از دم تیغ می‌گذراندند زدند زدند بسیاری را کشتند بقیه مشرکان فرار کردند رفتند به طائف رفتند دیگه اینجا حنین فتح شد حنین که فتح شد اینقدر خدا غنیمت در حنین داد بیش و ماف که بعضی از همین نومسلمان ها را تازه تازه مسلمان بودند رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر نفری ست تا شطور داد یک نفر را ست تا شطور شما فکر بکنی چقدر یکی از شاعران عرب بود و از جنگجویان خطرناک بود به او پنجا تا شطور داد رسول الله اسمش عباس ابن مرداس بود تو صحیح مسلم آمده روایت شعری گفت گفت من این پنجات را نمی مگر من از فلانی فلانی بعضی از دیگر از های خودش نه همه تازه مسلمان بودن من از اونها چی کم دارم که به اونها ست تا داده به من پنجات تا داده نه پدری اونها از پدری من بالاتر بودن نه خودی اونها از من بالاتر هستن چرا 25 پنج تا برسید 100 تا یعنی در قالب شعر گفت رسول الله خندید و صد این را هم کامل کرد یعنی به هر نفر 100 تا شطر بعدن به مهاجرین زیاد دار ولی سبحان الله اینجا یک امتحان بزرگی بود برای انصار مدینه به انصار رسول الله هیچ چی نداد انصار مدینه به اونها رسول الله هیچ چی نداد ولی به مهاجرین هم داد به تازه مسلمان ها هم داد یک جوان انصاری یا بعضی از جوانان با خودشون گفتند گفتند که اون زمان که روز سخت بود ما بودیم الان که غنیمت هست به خودشون میدند اینجا این خبر به رسول الله شنید رسید رسول الله جام کرد انصار را جام کرد و علت را گفت که چرا و در واقع یک امتحانی برای انصار بود که انصار برای غنیمت نجنگیدند علت را گفت که چرا من به شما ندادم به آنها دادم و یکی این, یکی این گفت چون مکه فتح شده بود شهر رسول الله بود دیگه تازه فتح شده همین سفری شد یک علت یک ارز کنم احتمال میرفت که الان که مکه فتح شده دیگه رسول الله به مدینه نیاد همینجا مکه خونه خودش بشینه اما رسول الله این کار را نکرد گفت انصاری ها یه خبری به شما بدم بقیه مردم با مال برمی به خانه های خودشون شما با رسول الله برمی مال شما چیه؟ رسول خداست و بعد فرمود من شما انصاری ها را به اندازه دوست دارم که اگر مردم از یک وادی برند و انصار از وادی دیگه برند من از اون وادی میرم که انصاری ها میرند وقتی که رسول الله این را گفت سرداران انصار. با شهامت گفتی یا رسول الله بعضی ها که نادان بوده اینه گفتن ما کاملا راضی هستیم ما رسول خدا را داریم همه چیز داریم ما نمی ما مال غنیمت اینجا از شما نمی انتظار نداریم لذا به انصار چیزی ندادند به بقیه دادن حکمتی بود اینها خانه داشتن کاشان داشتن زمین داشتن همین چیز داشتن مهاجرین همه چیزی خودشون را از دست داده بودند خب اون طلقا نو مسلمان ها برای تعلیف قلبشون که در اسلام استوار بمانند اما مهاجرین در مکه خونه هاشون را از دست داده بودند فروخته شده بودند باغشون لذا نیاز به یک زندگی مجدد داشتند لذا الله می فرماید لقد نصرکم الله في مواطن كثیره همانا یاری کرد اللہ شمارا در مواطن زیاد در جاهای زیاد مثل بادر خندق و یوم حنین در روز حنین بالخصوص اللہ شمارا یاری کرد اذ اعجبتكم کثرتكم زمانی که شمارا در شگفت انداخت و در عجب انداخت کثرت شما خداوند گاهی با یک خیال و کی کوچی کوچیکی هم ناراض میشه و یک ضربه میزنه الله علت را فرموده شما عجب کردید که شما زیادید شما چرا به من توکل نکردید اذ اعجبتکم کفرتکم زمانی که شما را به عجب انداخت کثرت شما فلم تغنی عنکم شیئا این کسرت از شما چیزی را دفت نکرد دور نکد مشکل شما را حل نکد دیدید با وجود کسرت چقدر زر بخوردید و ضاقت علیکم الارضو بما رحوبت و تنگ شد زمین بر شما با وجود وسعتش با وجود فراخیش زمین بر شما تنگ شد شما جایی نداشتید که برید ثم مولیتم مدبرین سپس شما پشت دادید برگشتید پشت درهنده پشت ندید فرار کردید گریختید اما بعدا خدا لطف کرد بر شما ثم انزل الله سکینته على رسوله سپس الله نازل کرد سکینه خودش را یعنی فیض غیبی را بر رسولش و علی المؤمنین بر قلب مؤمنان الله سکینه نازل کرد آرامش نازل کرد و بعد خدا فرشته فرستاد فرشته گفت بری شما بکمکه مومنین من و انزل جنود الّلم الله نازل کرد از آسمان فرشتهایی که شما نمی دیدید آنها و عذب الّذين الله عذاب داد شکان جدّاد شکاس داد كسانی را که جزاء جزاء جزای کافران اما بعدا الله می فرماید ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء اشاره می کنم بعد همه اینا مسلمان شدند همه اینها مسلمان شدند رسول الله صلی الله علیه و دو کار کردند زنهاشون را اسیر گرفتن به عنوان کنیز مالهاشون را بین صحابه تقسیم کردند بعدا که مسلمان شدند گفتن که مال شما رفته زنهاشون را به اونها از اون حالت بردگی خارج کردند ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء سپس رجوع کرد الله بعد از این بر هر کسی که بخواد رجوع میکنه یعنی توبش را قبول میکنه توفیق اسلام میده والله غفور الرحیم خداونده عز و جل بخشاینده و مهربان هست بالاخره اینها بعدا رفتن طائف رسول الله رفت تایف را هم کرد در قلعه تایف مقداری مبارزه کردند اهل تایف همونا بودن که با سنگ پذیرایی کردند در ابتدای اسلام وقتی رفت دعوت داد هر سردار یک مسخری که وقتی که برگشت همه سنگ زدند بچه را گفتند او باشه را گفتند بزنید چنان زدند که بدن رسول الله و کفش رسول الله پرخون شد لذا اونجا جبرائیل آمد که دعای بد کنید رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم دعای بد نکرد گفت که شاید از نسلشون نسلشون مسلمان بشه الان همه اون نسل هست نسل همون هستند همون بنو حوازن هستند بنو سقیف هستند همون قبایل گزشته هستند که امروز هم بل در اونجا ساکن هستم ولی همه مسلمانن الله می فرماید بعد از این یا ایها الذين امنوا انما المشركون نجسون بحث مساجد گذشت اما بحث مسجد الحرام فرق میکنه ببین مسلمان آیا کافر میتونه وارد مسجد بشه اینجا یک کافر میخواد تو مسجد شما بیاد اجازه داره علما میفرمایند که اشکال نداره به دلیل اینکه در مسجد النبی بسیاری از وفود می آمدند می آمدند با رسول الله ملاقات می کردند ما در سوره آل عمران خواندیم نصاره نجران آمدند نصاره نجران خب کافر بودند مشرک بودند و در مسجد با رسول الله چند روز بحث کردند مذاکره کردند بنو سقیف ایمان آورده بودن آمدن تو مسجد تو مسجد مشرک میتونه بیاد ولی نیاد بهتره چون مسجد جای عبادت و مشرک الله تعالی در همین آیه فرمائی نجس است این ناپاکی شما اگر مهمانی دارید سعی کنید تو مسجد نیارید خونه ببری پذیرایی بکنید اما اگر بیارید گنجائشش هست اما این حکمال مسجد الحرام نیست مسجد الحرام یا مراد از مسجد الحرام خود مسجد الحرام نیست کل حرام هست اون حدودی که عزیزانی که رفتم میدونن تابلو زده که از این حد به بعد حرام شروع میشه تو اون حدود حرام اونها نمیتونم بیام. چرا در واقع اینجا خدای از به اون حرام احترام بیشتری داده اینقدر احترام داری که هر کسی که به خدا ایمان نداره اجازه نداره حتی وارد بشه و علت دوم اینه که شناعت کفر و شناعت و قباعت شرک خدا میخواد نشون میده که شرک چقدر بده که حتی مشرک خدا اجازه ندیده نزدیک خانه خدا بره در اون حدود بره لذا اللہ انجا همینمی فرمید یا ایوہا الذين آمنوا ای مؤمنان انما المشركون نجسون جز این نیست نجس هستن فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا نزدیک مسجد الحرام نی بعد از این سال از امسال ببعد از این سال نوم دیگر نزدیک نی مانشیه یعنی فلا یحج و لا یعتمرو، کما کانو یعتمرو نفل جاهلیا. از این اجازه حج ندارند، اجازه عمره ندارند. همان گونه که در جاهلیت میکردند، عمره الان دیگه نمیتونند. حج قدغن مال مشرک، مال غیر مسلمان، عمره قدغن دیگه نمیتونه بره. و الله از زوجال فرمود و این خفتم عیله تن ببینید مشرکین را بعدن کلا از جزیره العرب خارج کردند اما یک ضرری بود اون زرر این بود که بزرگترین تاجرها همین مشرکین بودند اینا میرفتن از شام از یمن اون روز اموال تجاری زیادی می آوردن در موسم حج به فروش می‌رساندند لذا در صورت نگذاشتن اونها یک ضربه اقتصادی بزرگی خواهد بود دیگه اینها وارد نمی اجازه ندارن تجارت هم نمی کنن الله عزوجل فرمود و این خفتم عیلتن اگر شما از فقر ترسیدید خدا به صورت دیگه برای شما جبرانش میکنه. چطور خدا جبران کرد؟ بعضی از قبائل بودن تازه مسلمان شدند قبائلی مثل قبائل اهل نجد اهل قباله اهل جرش یا جرش اینها مسلمان شدند و اینها برای اینها یک فرصتی خوبی شد بعد از این اینها می رفتند کالا می گرفتند جنس می گرفتند هرچی که مورد نیاز اهل مکه بود می آوردند اینجا فروش می رسند فراوانتر شد از اول بهتر شد از اول گاهی همین دغدغه در مسلمان ها هست که اگر ما رابطه خودمون را به خاطر فلان موضوع با فلان کشور تیره بکنیم خب وقت با کمبود جنس مواجه میشیم مثلا امروز یکی از بزرگترین وارد کنندگان کالا کشور چین است هر صادر میکنه، به هر کشوری ما مثلا بیشترین واردات داریم بقیه کشورای همجوار همه اونقدر که از چین وارد دارن از هیچ کشوری ندارد خب مثلا همین که چینی ها ظلم کردن بر مسلمانان مسلمانان اکثرا سکوت کردن نمیخواستن روابط تجاری را غط بکنه اگر غط میکردند کردن دیگه با, با بحران مواجه می شدن ما باوریمون این هست با توجب این آیه که خدا مند راه دیگری را درست می کرد، خودمان روزنامه دیگری را باز می کرد، ولی مشکل ما مسلمانان امروز اینه که ما به ظاهر نگاه می کنیم، ما به اسباب نگاه می کنیم، به رب به اسباب توجهمون کمتر است. این همه آیات که ما می خانیم الله عزوجل همینو می فرماید که شما نظرتون به رب اسباب باشه به من باشه هرچی که بنده توکلش به بی الله بیشتر باشه تدبیرم بکنه برنامه هم بکنه تلاشم بکنه نیست که دست بالا دست هرچی که شما توکل و اعتمادتون به بی من بیشتر باشه من بهتر مشکل شما رو حل می‌کنم. لذا الله می فرما و ان خفتم عائله اگر شما از فقر ترسیدید فسوف سوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان قریب خدا شما را مستغنی می کند از فضل خودش اگر بخواهد یعنی خدا بخواد در دیگری از رزق باز می کند ان الله علیم حکیم بدون شک الله عزوجل هر چیز را داناست و کارهای خدا با حکمت است و باز اللہ تعالی مدعا اینجا انجا دوباره مطرح میکنه یعنی برای کافر و مشرک لحاظ نکن نترس قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بجنگید با انهایی کی ایمان ندارن بخدا و روز معاد ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله و حرام نمی کنن ان چیزی خدا حرام کرده ولا يدينون و همچنین بدین حق متدین نمی شوند یعنی به اسلام نمی آین با انها بجنگید کیا هست انها؟ من الذين اوتو الكتاب اونای که اهل کتابند یا غیر اهل کتاب با همه بجنگید تا که بجنگید تا مسلمان بشند بنده ارز کردم مسلمان شدند اجبار نیست حتی یعتو الجزیت عنیدن و هم ساغرون تا این زمان تا این که اونا با دست خودشون جزیه بدند با دست خودشون به شما پول بدند انیدین یعنی تسلیم میشن و هم ساغیرون یعنی منقادون علی حکم الاسلام ساغیرون ببینه زلیل اینجا نیست یعنی حکم اسلام را بپذیرند فیصله کشوری مسلمان را بپذیرند هرچی که شما تعیین کردید به شما بالاخره مالیات بدند به شما جزیه بدند به شما پرداخت بکنند اون وقت شما یعنی حکم شما را قبول بکنند قرارداد شما را تسلیم بکنند در این صورت هم میتونید که با اونها نجنگید لذا اسلام آوردن و ایمان آوردنشون لازم نیست البته اگر ایمان آوردن اون جزیر از اونها نمیگیریم جزیر از اونها برطرف میشود وقالت اليهود عزیرون ابن الله وقالت النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو و سبحانه عما عم در آیات گذشته که مبحث اصلی مبحث جهاد بود خداوند عزوجل در فرمانی و دستوری فرمودند که شما با کسانی که ایمان به خدا ندارند و روز آخرت ندارند و حرام خدا را حرام نمی دانند و به دین حق آنها بر گردند و اونها بجنگید تا اینکه که جزیه بدهند کیها هستند اینا چه مشرکین چه اهل کتاب من الذین اوت الکتاب حالا اشکال انجا هست که آ آیا اهل کتاب جز کفار حساب می شوند؟ آیا اینهاي که به خدا ایمان دارند، به پیامبران خدا ایمان دارند، به کتابهای آسمانی ایمان دارند؟ آیا اینها کافرند؟ آیا با اینها هم باید جهاد بشه؟ الله از زوجال در این آیات خباست اهل کتاب را فساد اهل کتاب را که چقدر فاسدند و چقدر در شرک و کفر از دیگران چند قدم جلوتر رفتند بیان می فرماید اون چیه وقالت اليهود و عزیرون ابن الله یهود می گوید عزیر فرزند خداست وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارا می که مسیح فرزند خداست این کفر بزرگی هست از این کفر سنگینتری تر می باشه که خدای اززوجل خدایی که لم یلد و لم یولد هست هر کسی هر کسی را دوست داشت برای او فرزند خدا ذکر بکنند. اما بحث اینی که آیا امروز هم یهود و نصاره همین عقیده را دارند در باره نصاره شکی نیست نصاره امروز هم ادعا دارند که مسیح فرزند خداست و خداوند عزوجل را به خداوند یکی از القابی که می دهند لقب پدر میده پدر به اعتبار عیسی مسیح است اما یهودی ها بر اساس تحقیقی که علمای ما علمای معاصر امروز کردند یهودی ها امروز این نظر را قبول ندارند عزر علیه السلام, و السلام را به عنوان فرزند خدا نمی دانند الان نمی دانند در اون زمان بودند گروه از یهود همه یهود نه ما خاندیم که یهود با هم اختلاف دارند دسته از یهود اوزیر را فرزند خدا میگفتند الان نیست کسانی که این اعتقاد را داشته باشند اوزیر علیه السلام پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل هست که در تورات در کتاب های در کتاب های یهودی ها از او به ازرا نام برده یاد شده ازرا او را می گویند و یهود عزر و السلام را بزرگترین محسن و بزرگترین کسی که بر آنها مننت دارد میدانند به دلیل اینکه بعد از اینکه پادشاه ظالم مینا به نام ناصر بر بیت المقدس حمله کرد و بیت المقدس را با خاک یکسان کرد تمام نسخه تورات که در بیت المقدس بود همه را سوخت همه را آتش داد و هیچ نسخه از تورات باقی نمانده بود یهودی ها عملا کتابی نداشتن بسیار بر یهودی ها سنگیم بود این پیامبر حضرت عزیر که اذرا ازش نام گزاری یادآوری شده یاد این تحریراتی داشت یاد داشتهایی داشت و چیزهای در تحریراتش و چیزهای در حافظهش بود دوباره تورات را بازنویسی کرد از اول نوشت و دوباره تورات را تقدیم کرد یهود بیش از حد خوشحال شد و راضی شدند و این را به عنوان محسن خودشون میدانستند لذا میگفتن که بزرگترین احسان را بر دین یهود کرده یا ازرا کرده بلاخره الله تعالی میفرماید که ذالک قولهم بافواههم ان کن پیامبران الهی را انها فرزند خدا و فرزندان خدا میدانند به زبان میگویند به دهان میگویند و این سخنشون مشابهت دارد با سخن مشرکین یضاهئون قول الذين كفروا من قبلهم مشابهت دارد و مناسبت دارد با قول کسانی که کفر کردند قبل از اینها یعنی با قول چه کسانی؟ با قول مشرکین مشرکین هم در خدا همینو گفتن اونا می گفتن دختران خدا هستن یعنی یکی برای خدا وقتی خدا را نشناختند یکی برای خدا دختر ثابت میکنه یکی پسر ثابت میکنه قاتلهم الله الله تعالی اینجا اینها را نفرین میکنه اینها را دعای بد میکنه قاتلهم الله یعنی مرگ بر اینها اینها را خدا بکشد انا یعفکون به کدام سمت سو اینها منحرف میشن و برگردانده میشن که اینها در باره خدای عزوجل خدای بینیاز چنین کلمات کفری نسبت میدن پس یکی از کفر یهود و نصارا این عقیده هست و این گفته هست علاوه از کفر یهود و نصارا و شرک یهود و نصارا، اینجا خدا چیزهای بیان می فرماید که من قبل از اینکه آیه را بخوانم، یاداوری می‌کنم متاسفانه این مریضیه که الان قرآن یاد میکنه این مریضی را بعضی از مسلمان نماها هم دارند این مرسی مرسی هست؟ الله تعالی می فرماید که انها علماء خودشان را و دراویش خودشان را به عنوان اله انتخاب کردند به عنوان معبود انتخاب کردند یعنی همون اعتقادی که به خدا دارند همون احترامی که باید برای خدا بذارند برای علماء خودشان آخنده خودشون و هم برای دراویش خودشون، برای پیرهای خودشون می گزارند. اونها هم رکو می کنند اونها را هم سجد می کنند از اونها هم دعا می خواهند از اونها هم نیاز می خواند. پس ببینید بندگان خدا را هم سطح خدا قرار دادن کفر دوم یهود هست و نصاره هست و اشکال دومشان هست که الله اینجا ذکر می فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله یهود و نصارت چیکار کرد؟ اهل کتاب چیکار کرد؟ انتخاب کردند و گرفتند علماء خودشون را احبار جمع حبر هست حبر عالم بزرگ را میگند و روحبان هم روحبان خودشون را روحبان جمع راهب هست راهب درویش را میگن، ظاهد کسی که بظاهر خودش را از دنیا یک گوشه می کشد از دنیا و از لذات دنیا و از شیرینی های دنیا کنار می کشد و میگه من تو غار عبادت میکنم من یه گوشه می ذکر و خدا را یاد میکنم نه مثل بقیه مردم در لذت هست نه در نعمت هست با زهد و با قناعت و با ملنگی و درویشی زندگی می کند اون را میگه راهب لذا مسیحیان چیکار کردند یهودیان چیکار کردن هم علما و هم درویش ها اونها گرفتند ارباب من دون الله به عنوان رب غیر از خدا رب به عنوان رب و به عنوان معبود چی کار می کردند تفسیر جمل گفته وکانو یسجدون لهم کما یسجدون همون همونطور که برای خدا باید سجده کرد برای اینها هم سجده می کردند و در روایت دیگه هست که حضرت ادی ابن هاتم حضرت عدی ابن هاتم یک صحابی است که قبلا مسیحی بود بعدا مسلمان شد این آیه را وقتی شنید گفت یا رسول الله در زهود در, در مسیحیت اینها را مثل خدا عبادت نمی کنند چطور قران گفته اتخذوا احبارهم و رهبانهم من دون الله رسول اکرم صلی الله عليه و فرمود آیا چیزی که اینها از طرف خودشون حرام میکنند ملتمون را حرام میدانه یعنی گفت بله گفت چیزی که اینها از طرف خود حلال میکنند ملتمون می یعنی را حلال میدانه گفت بله گفت پس عبادت همین یعنی چیزهایی را اینها از خود حلال و حرام میکردند ملت هم به عقیده داشت اینکه گفت حلال دیگه حلاله ولی اینکه خدا بگه حرامه اینکه گفت حرام دیگه حرامه ولی اینکه خداوند بفرماید حلال است پس از اینها چنان تبعیت می که یک مسلمان از خدا تبعیت می کنه اتخذوا احبارهم و رهبان من دون الله نه تنها انها را و ابن مریم مسیح ابن مریم را هم به عنوان رب به عنوان خدا انتخاب کرده بودند و مسیح ابن مریم را از او هم کمک می ببینید من در جلسات گذشته بار بار عرض کردم شرک تنها نام بت نیست نام سنگ پرستی نیست بعضی میگویند که شما ما را با مشرکین چرا مقایسه میکنید مشرکین اگر فریاد میزدند لات و عزات را صدا میزدند ما که دوستان خدا را صدا میزنیم ببینید اینها هم دوستان خدا را صدا میزدند مسیح ابن مریم پیغمبر خدا است اونا از مسیح ابن مریم کمک میخواستن اجازه نداری نه از سنگ کمک بخای نه از پیغمبری کمک بخای از مسیح ابن مریم اجازه نداری کمک بخای کمک فقط از یک الله بخوا الله میفرماید و ما امروا الا ليعبدوا اله واحد اینها امر نشده بودند مگر اینکه الا لیعبدوا الها واحده مگر اینکه باید عبادت کنند معبود گانرا را و معبود یگانه‌ای که لا الہا اللهو هیچ مابودی بیژد هو نیس اودار ایبادت یه گانه است سبحانو او اوباقه است اما یوشریکون از اونچیکینها شریک میگیرم با او مردم با خدا شریک میگیرن چقدر مردم زالم هستند بعضیها صالحین را شریک خدا قرار می دن بعضیها فرشتگان را شریک خدا قرار می دن بعضیها انبیا و اولیاء و امامان را شریک خدا قرار می دن بعضیها خورشید را ماه را ستاره را فرق نمی غیر غیراللہ پرستی غیراللہ پرستی شرک شرک چه کسی خورشید را عبادت کنه، چه کسی آتش را عبادت کنے چه کسی بنده صالح خدا را عبادت کنه همه غیر خداست خدا میفرماید لا اله الا هو اخب الله دیگه معبودی که لایق عبادت باشد نیست سبحانه و ان ذات پاک است اما یو شرکون از اون چیزی که مردم شریک خدا قرار میدن الان فرق نمی کنه بعضی ها شریک در ذات قرار میدهند مثل زرتشتی ها که میگن دو خدا هست یکی یزدان یکی اهریمن یکی خدای خیر یکی خدای شر یکی خوبی ها را درست میکنه، یکی بدی ها را بعضی ها در ذات قرار میدن بعضی در صفات میگن نه خدا یکی هست اما اینها فقط علم الغیب هستند اینها رو میشه سجده کرد خدا میگه یکی هست این سجده میکنی پس این چه کاره هست این هم تو خدا قرار دادی ابتخذو احبارهم و رهبانهم همینه لذا الله می فرماید اینها با شرک خودشون می خان چکار کنند یریدون ان یطفئو نور الله. الله می فرماید که اینها اراده دارند که خاموش کنند نور خدا را بی افواهیم با دهانشون با اعتراضات شرکیشون خیلی ها هستند که بر توحید و بر عقیده توحید اعتراض میکنند هي شبهه ایجاد میکنند هي یک سری شکوکی و یک سوال یک سری سوالات که این سوالات شک ایجاد میکنه درست میکنند و یریدون ان یطفئوا نور الله می که خاموش کنند نور خدا را به افواهیم با اعتراضاتشان اما ویا الله ایلا ان یتم منوره خدا نمی پذیرت انکار می کند مگر اینکه خدا نورش را تکمیل کند ولی او کاری هال کافران گرچه کافران نخان نپسندد نور خدا تکمیل میشه منظور از نور خدا چیه تمام مفسران نوشتن نور خدا یعنی دین خدا نور خدا یعنی دین خدا کفار مشرکین یهود نصارا با یک سری اعتراضات پوچ با یک سری سوالات میخواهند که دین خدا را بی تاثیر کنند مردم دیندار نشوند مردم دیندار نشوند در همون زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودی ها هی تو گوش مشرکی می خوندند بریم بپرسید که ذوالقرنین کیه از کجا تا کجا فت کرد بریم بپرسین که روح چیه حقیقت روح را برای ما بیان کن این سوالاتی بریم بپرسین در باره اون چند جوانی که رفتن بغار اینها کجا رفتن چند سال رفتن فکر میکردن رسول الله آجز میمانه ولی الله وحی بی فرستاد همون زمانی اینها سوال می اینا شبهات مطرح می اینا شکوکی را مطرح می کردند لذا الله می فرماید یریدون ان یطفئو نور الله با افواهیم اینها با اعتراضات خودشون امروز هم دنیای کفر همینه در این شبکه های مجازی در فضاهای مجازی در این محوارها شب روز کسانی هستند نشستند تبلیغ می کنند بر علیه اسلام بر علیه قرآن بر علیه احکام دین، و احکام دین را به بعد مسخره می گیرند و بعضی از مسلمانان سست و ضعیف که اطلاعاتشون نسبت به دین ضعیفه هم گاهی تماشا می کنن برنامه را و متأثر می شوند یک سری اعتراضات بر خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم غافل از اینکه اون احکام حکمت دارند اون احکام علت دارند دلیل دارند خب خبر ندارند لذا امروز هم همین همین فرزندان یهود و نصارا هستن که میخواهند دین خدا را با اعتراضات خودشون با فوت کردن خودشون این چراغ را میخوان خاموش کنند ولی شاعر واقعا خوب گفته که چراغی را که بر فروزد هر کس که پف کند یا فوت کند ریشش میسوزد یا ریشهش میسوزد ریشهش میسوزد اما اسلام ان الله روز بر روز ریشش مستحکم تر میشه قوی تر میشه شما نگاه کنید در گذشته مگر دشمنان کم توطئه کردند الان که الحمدلله اسلام قوی شده همون زمانی که مسلمانان بسیار ضعیف بوده از نظر قدرت ولی خب از نظر ایمان اون زمان قوی الان نظر زلی ایمانی ما ضعیف هستیم اون زمان یهود و نصارا اعتراض میکردند ما در سوره आले عمران خاندیم که مسیحیان نجران هفتاد نفر بودن تمام آخندها و ملا آمدند و همیشه اعتراض همیش شبهات چرا به میگن روح الله خب چرا به عیسی گفته کلمت الله معلوم میشه که عیسی ابن الله است روح الله است کلمت اللہ هست را رسول اللہ پاسخ دادن در سور آل عمران آمد چرا پیش مریم بدون موسم میوه گذاشته می شد غذا گذاشته می شد چرا عیسیٰ می توانست که کور مادرزاد را بینا بکند چرا عیسیٰ می توانست که مریضی پیس را شفا بدید این کارای خدا اصلا. از این شبهات که همی را قرآن جواب داد همه را پاسخ داد چنا پاسخی که اونها تونستن جوابی بدن آخر گفتن باشه ما تسلیم میشیم ما به شما جزیه میدیم در حکومت شما زندگی میکنیم جزیه به شما میدیم پس مسیحیان نجران اعتراض کردند یهودیان همیش سوال همیش اعتراض همیش میفرستادن و علاوه از این تنها به این اکتفا نکردند اینقدر توتعه کردن اینقدر پروپکنده کردند که تمام مشرکین را، تمام قبائل را در جنگ خندق جمع کردند، خواستند که برای همیشه فاتحه اسلام و مسلمین خانده بشه. هرچی چه توطئه کردند، الله از زوجهل در مقابل توطئشان روز بر روز اسلام را ترقی میداد. اسلام بپیش میرفت. امروز هم امروز ما مسلمانان هنری نداریم متاسفانه ما چنان ایمان قوی نداریم ولی کتاب خدا قرآن مجید تاثیر خودش را دارد امروز شما ببینید شرق و غرب بر علی مسلمانان هست همه جا توتعه بر علیه مسلمانان اینقدر حجوم هست اینقدر اعتراضات هست اینقدر تمسخور هست بر علیه مسلمانان می در چشم اونها از مسلمان ها دیگه امیدی ندارن که اینا بیان یهودی و نصرانی بشند اونا از مردم خودشون میترسن که این کارها را میکنند لذا کاریکاتور رسول الله را میکشند کارتونک فیلم کارتون درست میکنند قرآن را بر برعلیق قرآن توتعه میکنند ولی اگر شما بررسی بکنید تحقیق بکنید هیچ روزی نیست هیچ ماهی نیست هیچ سالی نیست که جمع بزرگی از مسیحیان از کفار دنیا به ثبت اسلام نیاد جوانانشون از قرآن متاثر هستند قرآن را دنبال می کنند مساجدی که در غرب و در اروپا روز روز رونق بیشتر می گیرد وجود این همه حجمه باوجود این همه حمله معلوم میشه که قرآن تا قیامت موجوده خودش را دارد. از کردم ما مسلمان اون مسلمانی که الله انتظار دارد نیستیم قوی نیستیم، اما دین دین حق است. این دینی که ما داریم، این دین حق است. اگر ما به این دین عامل بشیم ما از فرشته‌گانم کمتر نمیشیم. لذا الله می‌فرماید. یریدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ان هاميهم خاموش کنند نور الله را دین الله را اباد دهان نشان و يقبل الله الا ايت من نوره الله انکار می کند الله نمی پذیرد مگر اینکه نورش را یعنی دینش را کامل می کند تمام دنیا باید زیر پرچم دین اللہ قرار بگیرد اون زمانی که هیچ جا نبود دین خدا چطور با همت مسلمانان واقعی صحابه رسول الله، پروانهای شمع نبوت خلفای راشدین سپہ سالاران اسلام مجاهدان اسلام تمام دنیا را گرفت نشقی مندو نغربی لذا اللہ می فرمایت وَيَعْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ اللہ نمی پذیرت انکار میکند، کند مگر انک نورش را دینش را کامل بکند ولو کره الكافرون گرچه کافران نپسند این را قبول نکنند اما الدین همه جامیره هو الَّذی ارسل رسوله بالهدى این نمونه ی جوتم نور را چطور تکمیل می کند؟ الله آن است کے ارسال رسوله رسول خودش را همراه با هدایت فرستاده یعنی همراه با قرآن هدایت همین قرآنه. اگر رسول الله درمیان ما نیست قرآن درمیان ما هست رسول صلی اللہ صلی الله علیہ وسلم فرمود: ای مردم من درمیان شما دو چیز می گذارم تا زمانی که شما متمسک بشید و چنگ بزنید به این دوتا شما گمراه نمیشید فرمود اون دوتا چی از کتاب الله و سنتی کتاب خداست و سنت و احادیثی من هستند لذا الله می فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى الله عزتی از کہ رسول اشرا همرا با قران فرستاد همرا با هدایت فرستاد و دین الحق همرا با دین حق یعنی دین اسلام فرستاد لیظهره على الدين كله تا کہ ان را غالب بگرداند بر ادیان بر همه دین دیگر بقیه دین ها گرچه دین موسی باشه دین ایسا باشه تاریخ مصرفش تمام شد باید اون دین بر کنار و الان این دین حاکم بشه ولو کریه المشرکون گرچه مشرکانی را نپسندند برای اونها ناگوار باشد ولی این دین بالاخره غالب میشه ببین غلبه دین اسلام از چه نظر هست آیا از نظر فیزیکی و از نظر نظامی هست یا از نظر عقل و منطق و از نظر استدلال اولا از نظر اقل و منطق است ببینید اون چیزی که در قرآن هست مطابق با علم روز هست تمام چیزهایی که دانشمندان امروز تحقیق میکنند به نتایجی میرسند قرآن از قبل پیشگویی کرده اونها را هم در باب عالم فلکیات هم در باب علم و دانش هم در باب پزشکی یعنی چیزهایی هست که قرآن گفته اون زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدوم دسگاه را داشت دسگاه سونوگرافی بگیم یا دسگاه های دیگر که معلوم کنے که هر جنین وقتی که در شکم و در رحم مادر درست میشه چند تا مرحله چهل روزه داره چهل روزش نطفه هست بعد از چهل روز بعد از اینکه چهل روز نطفه تمام میشه چهل روز دیگه به صورت لخته خون هست بعد از اون لخته خون تبدیل به گوشت میشه بعد از گوشت استخان میاد اینا چهل چهل روز هستند اینها را را قرآن گفته قلقكم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه همه مراحل را امروز علم فیزیک بھی همین نتیجه رسیده گفتین درستی این این دلیل نبوت است دلیل حقانیت قرآن پس اون چیزی که مطابق علم مطابق از کنه از نظر علم و استدلال قرآن درست میگه، اون چیزی که مطابق با اقل هست قرآن با او هماهنگ است، با فطرت هماهنگ است، موافق با حکمت و مسئله هست هر چیزی که بالاخره خیر دنیا هست قرآن همین رو میگه. الان چقدر حکمت ها؟ گرچه ما به دنبال اینها نیستیم دانشمندان میگن وضو گرفتن چقدر فواید داره. همین که انسان وضو میگیره این عزارا میشوره، پاها را میشوره، این چه منافعی داره؟ سجده کردن هر روز چه منافعی داره؟ بل خصوص انسان نیم شب بلند بشه. همون طور که خوابالو دست وضو بگیره و نمیدونم بره سجده بکنه نماز بخونه این اصله این انسان سکته نمی کنه از سکته محفوظ میمانه و چند دین فواید دیگه فوایدی که در مسواق بیان میکنند بالخصوص این مسواک چوبی ای چه منافع داره چه فواید داره و چه حکمت داره شما مطالعه بکنید به این نتیجه می رسید که هر دستوری که قرآن داده هماهنگ با اقل است هم با مصلحت انسان است هم با علم و دانش روز است مسائلی که درباره فلکیات درباره خورشیده، درباره ستاره ها است درباره ماه است مثلا درباره آسمان است هر چی که قرآن میگه علم امروز به همون نتیجه رسیده لذا معلوم میشه که از نظر عقل و منطق این غالب است بر همه غالب است و هم از نظر استدلال امروز ادیان دیگه بیان یهود و نصارا چی دارند که اسلام نداره ولی اسلام چیزی داره که اونها نداره اونها هر چی دارن ما قبولشون داریم کتاب تورات اصلیش باشه کتاب انجیل ولی خودشون از هر یکی ده ده نسخه دارن نمیدونه این تورات عمل بکنه به اون تورات به از کنم که تورات فلان ارتودکس عمل بکنه و هم به اون طوراتی که دست کاتولیک هست عمل بکنه سرگردان هستم ولی قرآن ما را ببین از مدینه گرفته تا چین قرآن یکی هست تا اروپا و تا افریقا قرآن یکی هست ولی اونها دهان نسخه دارند خودشون سرگردان هستم هرچی که در دین اونها است ما قبول داریم ولی هرچی که در دین ما است اونها قبول ندارند اونا بهشون ایمان ندارند پس از نظر دین ما غالب هستیم ما برتر هستیم در همون تورات هست در همون انجیل هست که پیانبر خاتم می آید هجرت می کنه به یسرب میره. یهودیان یهودی تمام جمع شده اطراف مدینه و اینا آخر به تعصب گرفتار شدند ایمان نیاورده هرچی که از نظر استدلال باشه اونا کم میارن. پس از نظر استدلال ما غالبیم از نظر فیزیکی چی؟ در میدان نبرد چی؟ در نب... میدان نبرد لازم نیست مسلمان گاهی شکست میخوره گاهی پیروز میشه اما اگر مسلمان این وعده هست و انتم الاعلون این کنتم مؤمنین اگر مسلمان به اقتضای ایمان عمل کند غالبه مسلمان در مسیر قرآن و سنت باشه هوا پرست و نفس پرست و شهوت پرست و اختلاف و پست و ریاست و این ها مدنظر نباشه با هم اختلاف نکنه مسلمان غالبه هر وقت اینها ها مدنظر باشه یعنی مسیر خودش را گذاشته اون وقشی کس میخوره شما میبینید در همین زمان مسلمانانی که وقتی که در مسیر درست قرار میگیرند در مسیر قرآن و سنت قرار می گیرند در مسیر جهاد قرار می گیرند تمام ابرقدرت ها را با استقامت خودشون شکست میدند. آخر اونها فراری میدند لذا در میدان جهاد از نظر فیزیکی باوجود اینکه مسلمان نه امکاناتی داره، نه قدرتی داره، نه تکنولوژی داره، نه صلاح هسته‌ای داره، نه بمبهای خوشاید داره، ولی باز هم مسلمان غالبه. پس الله از وجل این که پیشگویی فرموده این پیشگویی امروز هم حق درسته اولا از نظر استدلال منطق و غلبه بر ادیان دیگر و دوم هم از نظر فیزیکی و جنگی میدانی هم اگر مسلمان مسلمان واقعی باشد هم غالب شما تاریخ را نگاه کنید جنگ هایی که مسلمانان انجام دادا بالخصوص مسلمانان راستین سبحان الله ما هر وقتی که میخوایم یک آیه را درست تفسیر بکنیم باید بریم به زندگی صحابه بدون زندگی صحابه ما قرآن را نمیتونیم تفسیر بکنیم ما می‌خايم قرآن درباره مسلمانان اصلی و واقعی میخواد بگه ما می‌خايم الگو نشون بدیم مسلمانان قرن 21 را به عنوان الگو بگیم که وقتی می بینی نمی دونی که این مسلمان یا ای غیر مسلمان از نظر شکل و ظاهرش از نظر آداب زندگی از نظر رسوم زندگی از نظر اینکه هیچ با مسجد ارتباطی نداره این مسلمان بیا الگوی ما باشه یا اون مسلمانی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم آنها را مستقیما تربیت کردند لذا اون مسلمانان چی داشتند امکانات چی داشتند قدرت چی داشتند مال چی داشتند اما در مدت بسیار کوتاهی سبحان اللہ در مدت بسیار کوتای، اون زمان امکانات امروز نبود این روز شما با هواپیما در یک لحظه سوار میشید دورترین نقطه دنیا میرید اون وقت جایی یکی میرفتید یک یک ماه با اسب با میدویدی تا به جای می در اون زمان سی سال طول نکشید بعد از رسول الله صلی الله علیه و وسلم تمام کشورها فتح شد یمن گرفته تا مصر و تا عراق و تا لیبی و تا شام و اردن و فلسطین و بیت المقدس قبله مسلمانان با اقتدار عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چطور در ہم شکست کمر اهل کتاب یهودیت و مسیحیت شکست اون زمان مسیحیت یکی از ابرقدرتا بود حرف اول را زد روم پایتختش بود ایتالیا امروز و تمام این کشورهای عربی مثل شام مثل مصر اینا تحت سیطره رومی ها بود ابرقدرت دوم ایران بود و آتش پرستان بودند اونها مسیحی بودند اینا آتش پرست بودند این آتش پرستان یک دو در دنیا اینا حکومت می‌کرده عراق تحت سیطره اینها بود یمن تحت سیطره اینها بود ولی صحابه در مدت کوتاهی هم اون را شکست دادم هم این را شکست دادن کدوم صحابه همونهایی که قبلا میگفتند جاهلیت زمان قبل از اسلام را چی میگن زمان جاهلیت جاهل بودند این افراد زمان جاهلیت آمدند خیر القرون شدند الان ما از اونها به چی یاد میکنیم؟ به خیر قرون اینها شرق و غرب را بزانو در آوردند پس این که لیوظهرهو علد دین اگر میخواهیم بگین که بر همه ادیان غالب شدند هم مسیحی مغلوب شد هم یهودی مغلوب شد هم آتش پرست مغلوب شد همه که کسانی که غیر الله را میپرستیدند هرچی را میپرستیدند همه شکست خوردند و خداپرستان غالب شدند موحدان غالب شدن مجاهدان غالب شدن لذا این مصداقش را اگر میخوایید اول از اونجا شروع کنید بعد بیایید تا زمانهای دیگر در هر زمانی که مسلمانان واقعا مسلمان راستین بودن مسلمانان خوب هنر از خودشون نشان دادن لذا الله میفرماید هو ارسل رسوله رَسُولَهُ بِالْهُدَى اللہ آن ذاتی هست که رسولش را همرا با هدایت فرستاد و دین الحق حد دین اسلام فرستاد لیظهره على الدین کل تاکہ ان دین را غالب بگردانت بر همه ادیان ولو کری ها المشرکون گرچہ مشرکان ان را نخاند یا ایوها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان بحث بحث یهود و نصارہ بود بحث مللہ و آخندھائش ہم بود اللہ تعالی انجا عیوب انہارا رزق فرمائے دی و این هم یکی از دلایل جهاد است چرا با اینها که اله کتابم جهاد کتاب انجام کنیم اینها را ببین عمل کردشون را الله میفرماید ای مؤمنان همان بسیاری از احبار رهبان علما و دراویش الان خاندیم احبار علما را میگن رهبان دراویش را میگن بسیاری از علما و دراویش لا یاکلون اموال الناس بالباطل مال مردم را از طریق باطل می و بعض مالشون را میخوردن کاش کاری می کردن دین را بهشون می دادند اما ویسدون عن سبیل الله از راه خدا هم بعض می دارند یعنی مال مردم را بالا می کشند و بعض نمی گزارند که به سمت خدا، به سمت رسول الله، به سمت اسلام بیان. هی شبهات میگن بله در تورات ذکر پیغمبر آمده ولی ایشون نیست. اون پیغمبر به ناس از خود ما باشه، از فرزندان اسرائیل یعقوب نبی باید باشه. اون بنی اسرائیلی هم باور میکنه، منتظره که اون کی میاد. هنوزم یهود منتظرند که پیغمبر آخر زمان میاد. و از خود یهودی هم لذا الله عز و جل می فرماید بسیاری این از احبار و روحبان هستند که لیاکلون اموال الناس اموال مردم را می خورند و یسدون عن سبيل الله و از راه خدا باز می دارند. ببین صورتهای مال خوری متاسفانه احیانا درمیان این امت هم دیده میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود شما بر روش های گذشتهگان وجب به وجب و متر به متر دنبال می کنید همون طور مثل اونها آخر میشید خیلی هستند امروز هم مال مردم میخورند و دین حق را به مردم نشان نمی دهند اونا چطور مال مردم میخوردن؟ خوب توجه بفرمایید خودیتون بفهمید بعدن اونا رشوه میگرفتن از مردم و بعد احکام را طبق میل مردم و طبق هوای مردم چکار میکردن؟ تفسیر میکردند. از مردم پول میگرفتن مثلا یک کسی گرفتار میشد میگفت که این مقدار اگر بدهی بعد مشکلت حل میشه و مردم برای اونها هدیه می بردند توفه می بردند هدیه و ای که می بردند چه کار می بعدا دین را طبق میل مردم تفسیر می کردند. دین را طبقی میل مردم مثلا یکی از اگر از اونها مرتکب زنا می شد خب زنا حکمش در کتاب تورات هم ما خاندیم که سنگسار بود اونها میگفتند نه این حکم را کتمان میکردن چون طرف از سرمایدارها بود میگفتند دستورش اینه که چهرهش را سیاه بکنید روی اولاغی سوار بکنید چند ضربش علاق بزنی حکمش همینه یعنی اون سنگسار و اون رجم را تبدیل به این میکردند بقیه قضایه که مردم داشتند اختلافاتی که مردم داشتند سعی میکردن رشوه بگیرند و به نفع کسی که بیشتر میداد به نفع او فیصله بکنن اینا چیزای جزی هستن حتی حتی از مردم در این زمان آخر چرا مردم اروپا لاز دینشون بیزار شدند حتی در این زمان آخر کلیسا چه کار میکرد؟ مغفرت خدا را میفروخت میگفت می, می هر که بخواد بخشش میخواد بیاد اینجا پرداخت بکنه ما بهش سناد میدیم سند بخشیده شدن را کلیسا سناد میداد مردم را هنوز هم کلیسا همین کار میکنه به یک مسیحی مسیحی آلام اکثرم به کلیسا اعتقاد ندارم به خاطر همین کارهای احبار و رحبانشون آخندها و دراویشیشون میگفتند که شما بیایید هرچی گناہ کردی هرچی جنایت کردی هرچی فساد داشتی بیا یک مبلغی اینجا به حساب کلیسا واریس کن در بیست و پنج دسامبر کے سپتامبر کے ولادت ایساس یا دسامبر یا سپتامبر من فراموش کردم در اون روز اینجا حاضر شو دیگه تمام پرونده پاک تو دیگه بخشیده شدی بعضی همین طور هستن در میان ما هم ب... از مردم پول میگیرند و بعدا برای اونها راهی درست میکنن راهی که اونها بخشش بشند کفاره کفاره برایشون بشه لذا به این صورت مردم را وقتی که فریب دادن مردم کلنگ کلیسا را رها کردند ترک کرده الان کلیسا منزوی شده افراد خاصی تکو که اکثر مردم به همون دین خودشون هم اعتقادی ندارند چرا چون که این علمایشون دنبال مال رفتند و مال رب بنام دین الان کسی کسب کار بکنه و خدمت دین بکنه اشکالی نداره بر تجارت بکنه امام ابو انی رحمه الله پارچه میفروخت بزرگترین تاجر هم بود بزرگترین فقیه و مجتهد هم بود امور مردم را هم رسیدگی میکرد بره خودش کار بکنه اما بنام دین از مردم بگیره بخوره و بعد دین را وارونه به مردم تحویل بده دین را تحریف کنه به مردم تحویل بده این برایشون بد س... شد الله عزوجل و یا ایوه الذین آمنوا ای مؤمنین ان كثيرا من الاحبار والرهبان بسیاری از علماء و دراویش بودن که لیأکلون اموال الناس میخورن مال مردم را بالباطل بباطل می سبيل خودش و یسدون عن سبیل الله و با شبهات خودشون از خدا باز میدارن یعنی نمیزارن که مردم بسوی اسلام بیایند و خداوند اینها را میگه اینهایی که این طور فقط مال را اندوخته میکنند البته این آیه درباره زکات هم هست کسی که مال را اندوخته بکنه و نده در رای خدا مال که باید بدیم اما به مستحقینش بدیم در همین سوره میخانی خوانیم مستحقین کی هستند الله می فرماید والذین یکنزون الذهب والفضه ان که زخیره می کنند و نغردها و لا ينفقونها فی سبیل الله و خرج نمی آن را در راہی الله فبشرهم بی عذاب علیم را خوشخبری بده بی عذاب دردناک الله نجات بده کسی که حق مال را نده وعید سختی هست تا زمانی که ما حق مال را ندیم چه هفت طبق زیر زمین باشه چه روی زمین باشه چه تو بانک باشه اسمش کنز و خزانه هست اما وقتی که حق مال را دادیم هر چیگه زیر زمین دفنش بکنیم اون خزانه نیست اون مال پاکت هست لذا الله میفراند کنز در صورتی که انسان حقش را نمیده وَلَا يُنْفِقُونَا فِي سبیل الله اینهایی که خرج نمیکنند کنند فبشرهم به عذاب علیم اینها را به عذاب دردناک خوشخبری بده اون عذاب دردناک چیه؟ یوم یحما علیها فی نار جهنم روز داغ میشه همون تلا همون نقره در آتش جهنم فتکوا بها جباه هم سوزنده میشه داغ داده میشه جباه پیشانی اونها و جنوب و بدن اونها کناره بدن اونها راستو چپ اونها و ظهور هم و پشت اونها و به اون انسان گفته میشه هادا ما کنز تم لی انفسکم ای انسان این اون از که تو خزانه کردی برای خودت تو بچه هایت بس برای خودتون خزانه کردی فزوق ما کنتم تکنیزون بخورید اون چیزی که خزانه کردید لذا عزیزان اصلش چطور از این مسئله علماء یهود رفت به طرف کسانی که زکات نمی دهند چون اونها هم دنبال مال بودند علماء یهود که دین را تحریف کردند و خدای عز و اونها را بترین انسان ها میگوید و فرمود که فبشرهم بعذاب علیم اونها هم دنبال اندوختن مال بودند بیش از حد مال را دوست داشتند مال را همه دوست دارند ولی به خاطر مال حق را کتمان کردند باطل را چرا چطور به خاطر مال حق را کتمان کردند ببینید اونا هر یک یک مرجع بود هر یکی یک مفتی بود، هر یکی یک مجتهد بود، مردم دوربرشون جمع بودند، لذا این مرجعیت را، این پوست را و همچنین این دکان را، این دکان درامتشون بود، مردم می آمدند برای هر نیازی ازشون پول می گرفتند، این را نمی خواستن از دست بدن، اگر می رفتم مسلمان می شدم دیگه درامت بسته می شد، به این خاطر انها به خاطر اندوختن مال این کار را کردند و همچنین کسانی که زکات نمیدهند هم اینها فکرشون همین اندوختن مال است الله روز قیامت بهشون میگه این مالی که جمع کردی و ریالش را به فقیر ندادی زکاتش را ندادی این مال العمار میشه و مار میشه در حدیثی میات ما اون حدیث را قبلا خواندیم که اجدهائی تمام مال انسان به شکل اجدهائی میشه و بگردنش میپیچه و دو طرف لبهاش را میگیره میکشه و میگه انا مالک انا کنزک من مال تو هستم من همون خزانت هستم که مخفی کردی تو بانک ها داشتی و به کسی نمیدادی الان من خدا بر تو مسلط کرده لذا الله میفرماید فذوقو ما کنتم تکنیزون بچشید اون چیزی که شما ذخیره کردید شما خزانه کردید ان عده شُهُورِ عند الله ثُنَا عَشَرَ شَهْرًا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. خداوند در این سوره هم در باره مفاسد یهود و نصارا و هم در باره مفاسد مشرکین مکه سخن میگوید یکی از بزرگترین مفاسد و وجه مشترککی شور اینه که به خاطر منافع خودشون دین را جابجا میکرد دین را تغییر میدادن، الان خااندیم که یهودی مصسیحی چطور دین را تغییر میدادند. الان میخواانیم که مشرکین چطور تغییر میدادند؟ ببینید در دین ابراهیم ماه های حرام بود چهار ماه ماه حرام است یکی رجب هست، و یکی زیقاده هست، یکی زیهججه هستی که محرم هست. سه تا اینها کنار هم هستند و یکی رجب که قبل از شعبان و رمضان بیاد. اینها ماهای حرام بودند. در این ماها جنگ کردن جایز نبود، درگیری جایز نبود. لذا اونها نمی جنگیدند. اما مشرکین که خیلیها نان می خوردند از راه همین. جنگ کردن نان می خوردن از راه کاروان زدن از راه رازنی دزدی. زمن که دزدی می کردن پایبند همون شریعت خودشون بودند شریعتی که می گفتن شریعت ابراهیمی چه کار می کرد یک سال مثلا هم, شو... هم زیقاده هم زیحجه و هم محرم سه ماه پشت سر هم نر کاروانی نزند دزدی نکند از کجا بخورد؟ پس چیکار میکردن دو ماه کمی گذشت ماه زیقاد و زیحج محرم میگفته گفتن امسال ماه حرام منتقل شده از محرم رفته به سفر از محرم منتقل شده به کجا رفته به سفر رفته لذا در محرم می رفتن کار خودشون را می کردن بعض ماه سفر که می آمد ماه سفر را می این ماه حرام است یعنی حلال و حرام را اونها با بر اساس نیازهای خودشون تغییر می دادند همون تحریفی که خیلی از ملا نماها چکار می حلال و حرام را بر اساس نیاز و بر اساس هوای نفس و بر اساس ضرورت این چیز حلاله بله میشه. اما بعدن فردا می بینید حرامه چون منفعتی توش نیست لذا الله تعالی این رسمشون را بیان می فرماید. الله ابتدا می فرمان این شهور عند الله اسنا عشر شهرا تعداد ماها پیش خدا دوازده ماه است فی کتاب الله یعنی در احکام شرعی که خدا نازل فرموده یوم خلق السماوات والارض از روزی که خداوند آسمان و زمین را آفرید، منها اربعت حرم از این ماها چارتا ماها حرام هستند. و بعد الله می فرمان ذالک الدین القیم این دین دین مضبوط است که این چارما ما چار حرام هستند فلا تظلموا فيهن انفسكم در این ماه ها خودتون ظلم نکنید اما اگر مشرکین در این ماه با جنگی شما جنگید شما بجنگید اونا که رعایت نمی ما ماه حرام برای دو طرف است نه برای یک طرفی و قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافه با مشرکین کامل به بجنگید همانطور کنها با شما کامل می وعلم وعلمو ان اللهم المتقین این وعده نصرت الله است باور کنید یقین کنید که خداوند همرا با متقیان است یعنی کسانی که به حکم خدا عمل میکنند. اما اینکه ان اونها تاخیر می دادند حرام را به ماه بعدی الله می فرماید انما نسیع و زیادتون فی الکفر تاخیر دادن زیادت در کفر اونا از قبل کافر بودن اینم سرش یکی دیگه از کفر که ماه حرام را چیزی که خدا حرام کرده همون را باید منو تو حرام بدانیم نه اینکه چیزی که حلال از اون را حرام بدانیم و اونی که حرام از را حلال بدانیم کفر همینه دیگه انما النسی و زیادت فی الکفر تاخیر دادن بیشتر در کفر یضل به الَّذین کفرو بوسیلین گمره میشن کفار گمراه میشن مشرکین گمراه میشن یحلونه عاما و یحرمونه عاما یک سال حلالش میکنند یک سال حرامش میکنند به خاطر اغراض نفسانی خودشون به خاطر شهوات نفس خودشون چرا خب چرا یک سال حلال یک سال حرام لیواتو عده ما حرم الله تا که موافق باشه با اون تعدادی که خدا حرام کرده لذا از محرم میبری سفر چون اگر بگه محرم ما حرام نیست ما حرام شده تا شدند با تا بشه لذا سفر را حرام میکنه تا با اون چیزی که خدا حرام قرار داده موافق بشه چرا این کار را میکنند الله میفرما زیین لهم سوء و اعمالهم اعمال بدشان برای اونها آراسته کرده چنین چیزی را اعمال شنیشان قبیهشان و در واقع منافع مادیشان منافع شکمشان والله لا يهدي القوم الكافرين خداوند هدایت نمی فرماید قوم کافری را خب تا اینجا بحث مشرکین بود قبل از اون بحث یهود و نصارا بود یا ایوها الذین آمنوا مالکم از اینجا تا آخر سوره تقریبا موضوع یه چیز هست موضوع جهاد هست و اونم جریان تبوک جریان تبوکی که از جنگهای مهمی هست که امتحان بسیار بزرگی بود برای مسلمانان بسیاری از اینجا معلوم شد که مومن مخلصاً بسیاری معلوم شد منافق خالصاً نفاق منافقین هم در تبوک ظاهر شد و جریان تبوک واقعاً جریان سختی بود چرا؟ چون که بعد از که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه رفتند، سال هشتم مکه مهجری در رمضان مکه بودند مکه رفت کردند. بعد از مکه رفتند، حنین حنین رفت کردند. شما دیروز خاندید. بعد از که از حنین برگشتند و به مدینه رفتند، تازه تازه به مدینه رسیدند. سال نهم شد. شنیدند که هراکل روم داره بر علیه مسلمانان سپاه جمع میکنه لشکر جمع میکنه از کردم مرکز اونها در روم بود اما اینها در تبوک تبوک جزء شام هست از مدینه طیبه شما میخواید به تبوک امروز برید 550 کیلومتر با ماشین هست لذا در تبوک اینها جمع شدند چون شام جز رومی ها بود عرض کردم تحت سیطره اونها بود اونجا تمام مسیحیان را هم جمع کرد تمام قبائل عرب را که اونجا زندگی می کردند هم جمع کرد و لشکر بسیار بزرگی تشکیل داد تقریبا هزار نفر چرا چون مسیحیت کم کم از اسلام می ترسید مکه شد هنین فت شد طائف شد مسلمانان قوی شدند اینا را که قبلا عرب های پالخت و سرلخت می نامیدند الان اینها دارند روز به روز کارشون به پیش میره غافل بود از اینکه ان این کار کار عرب نبود این کار کار دین بود اسلام بود عرب بدون اسلام جایگاهی نداره لذا انها هر چی که مردم بودن انجا بسیج کردن بسیج عمومی اعلام شد از طرف حرقل که باید به مدینه حمله بکنیم کار اسلام را یک سر بکنیم اینکه اللہ می فرمه لیوظهره علی الدین کل ببینید در اونجا باوجود توت ها اللہ دین اسلام غلبه می دے. لذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلام کرد که تمام مسلمانان باید بیانت نفیر عام اعلام شد چون ۳۰۰ هزار نفر دیگه حرف فی ساده ای نبود جمعیت کمی نبود دستور دادند در مدینه و اطراف مدینه هر چی مسلمان هست جمع بیشند لذا جمع شد نزدیک ۳ هزار نفر جمع شد اونجا ۳۰۰ هزار نفر اینجا ۳ هزار نفر الان این جنگ تبوک واقعاً جنگ سختی بود غزوه تبوک چرا چون یکی تازه از حنین برگشته بودند خسته بودند در حنین هم خسارت و زیان زیاد دیدند شهید دادند زخمی دادند دیروز عرض کردم چطور از بالای کوه اونها حمله شد بعد گرمی هم گرمی شدید بود خیلی گرم بود هوا گرمی مدینه بعضی گرفتند دیدند چقدر سوزان هست و بعض از مدینه به طرف شام اون بیابان تمام آتشی هست و سوم زمان برداشت خورما هم بود کسی که باغدار و کشاورز باشه می دونه یعنی چه امید زندگی یک سالشون را در همون یک ماه باید چیکار می کردن میکردن می کردن. امید زندگی یک سالشون همین برداشت و چیدن خورما ها بود از طرف دیگر دشمن هم عبرقدرت بود دشمن معمولی نبود یک عبرقدرتی که تمام دنیا از اسمش میلرزید همه اینها را در کنار هم بذاره ببینی واقعا رفتن چقدر سخته اما دستور خداست فرمان رسول الله است همه باید برند الان اینجا بعضی ها کردند از اینجا به بعد در باره اونها شروع میشه که عرض می کنم الله می فرماید ایها الذين امنوا ما لكم ای مؤمنان و غنسابه صحابه کی صحابہ شده این امتحانات را سپری کردن گذراندند خدا برای ما سختی و امتحان نمیاره اگر ما باشیم همون یک روزه انسان دیگه رحم کنه عرض کنم دین را و اسلام را و فرار بی کنه نجات میده خودش زن را اگر این حکم صادر بشه الله می فرماید یا ایها الذين امنوا ای مؤمنان ما لكم تشد شماره اذا قيل لكم فوا في سبيل الله هرگه به شما گفت میشه بروید در راه الله اثا قلتم الى الارض شما سنگین میشه به زمین اصلا سنگین میشی اصلا زمین نمیتونه بلند بشی اراضيتم بالحياه الدنیا من الاخره الله می آیا شما راضی هستی به زندگی دنیا بدل آخرت من الاخره یعنی بجای آخرت بجای آخرت به زندگی دنیا راضی فما متاع الحياه الدنیا فِي آخرت إِلَّا قَلِیل نیست کالای زندگی ای دنیا در مقابل آخرت مگر اندک هست خیلی اندک شما چرا راضی هستید این زندگی و اون زندگی ابدی و سرمدی را ترک کردید رہا کردید اللہ می فرماید اگر نروید عذاب خدا هست الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما چندتا تهدید میکنه خدا تهدید اول خدا شمارا را عذاب میده عذاب دردناک تهدید دوم ويستبدل قوما غيركم و شما را عذاب میکنه ربای قومی غیر از شما دیگه مردانی میارت که اونا جهاد بکنه همون طور که بنی اسرائیل جهاد نکردند اونا تار ذلیل شدن تا مردند نسل بعدی آمد جهاد کرد شما اگر جهاد نکنید خدا جابجا میکنه شما رو با قوم دیگر ولا تدره شی واذا نروید به جهاد به خدا ضرر نمی رسانید والله على كل شيء قدیر خداوند بر هر چیزی قادر است ببین خدا فرمود که به خدا ضرر نمی رسانید به خودتون ضرر می رسانید خدا قادر است نمونه قدرتش را ببینید. پیامبر خدا وقتی که هجرت کرد اینجا خدا من اشاره به داستان هجرت کند پیامبر وقتی که هجرت کرد تنها بود یک نفر فقط در کنارش بود ابو بکر سیدیق رضی الله تعالی هم خدا چطور نصرتش کرد؟ الله نصرت میکنه شما اگر در کنار پیامبر من نباشید الله عز و جل او را نصرت میکنه پیغمبر تنها غالب میشه همون که اون صحابی حضرت حاتاب بن ابی بلتعنه نوشت به مردم مکه که پیغمبر با لشکری داره میاد که مثل سیل خروشان از میاد و سوگند به خدا اگر باو هیچ که یاد تنها به میدان بیاد هم بر شما پیروز میشه چون خدا با اوست لذا الله فرمائے الا تنصروا اگر شما اورا یاری نکنید فقط نصرہ الله همانا الله اورا یاری کرد اللہ اور کمک کرد اذ اخرجوا الذين كفروا زمانی کے اورا بیرون کردند کسانی کے کف کردند کفار اورا از مکہ بیرون کردند کفار نقشه کشیدن کہ رسول الله مجبور شد بیرون بشے مجبور شد و اگر می به او حمله می کردن وقتی که او را بیرون کردن در حالی که ثانی اسنین از دوتا دومی بود یعنی دوتا بودن اولی کسی دیگه از دومی رسول الله بود ثانی سنین دومی بود از دوتا ادھوما فی الغار زمانی که آن دوتا در غار بودند زمانی که اندو در غار بودند هما سیغه تصنیه است اد یقول لصاحبه تشریح نصرت ببین خدا چطور نصرتش کرد اد یقول لصاحبه زمانی که رسول الله گفت به صاحبش گفت به صحابیش گفت صاحب و کسی که باو همراه بود صحابیت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از نس قرآن ثابته هر کسی به عنوان صاحب و صحابی قبولش نکنه باید درباره ای ایمان به این آیه تجدید نظر کنه اون پس این آیه را قبول نداره این آیه میگه وقتی رسول الله به صاحبش گفت به همراهش گفت چی گفت لا تحزن ان الله معنا لا تحزن غم مخور بعضی اینجا ایراد می بر بر بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کو که ترسید ولی اینها با زبان عربی آشنا نیستند نه ترسید جوش میزد غم داشت ببینید یکی از ترس یکی از غم ترس و خوف اونه که انسان برای خودش می‌ترسه که به من آسیبی نرسد غم اینه که انسان برای دیگری غم میخورد ترس فرق ترس و غم را بفهمیم یک مادر همیشه غم دارد برای بچه‌اش. همیشه غمگین است که ما بعدا بچه من تصادف کنه ما بعدا دشمنی بیو حمله بکنه. ما بعدا چینین بشه چنان بشه این مادر ترس داره یا غم داره غم داره لذا به قرآن کلمات قرآن حساب شده است رسول الله نگفت لا تخف نترس هیچ چیت نمیشه ابو بکر خودش نمی ترسید ابو بکر اگر از همون مکه نمی آمد هم هیچ کسی با او کار نلاشت هدف اونها رسول الله بودن تعقیب هم رسول الله را بی کردن نه ابو بکر لذا ابو بکر برای رسول الله ناراحت بود پس رسول الله چی فرمد لا تحزن غم مخور ان الله معنا الله با ماست ببین کلمات قرآن الله جزای خیر بده مفسران را که بعض دقایق و باریکی ها را چطور دقت میکنن مفسرین نوشتن ببینید اینجا رسول الله در خطر بود اونجا موسی در خطر بود بنی اسرائیل به موسی گفتن که ای موسی فیران آمد ما دسکیر شدیم موسیٰ چیه گفت کلا ان معی ربی نخیر رب با من است نگفت با ماست چون بغیه در جائگاهی نبودن که اونها را با خود همراه کند ان معی ربی رب با من است کسانی که عربی بلد است معی یعنی تنها با من اما رسول الله به ابو بک نگفت ان معی ربی گفت ان الله معنا خدا با ماست پس معیت خدا تایید خدا همراهی خدا تنها با رسول الله نبود با رسول الله و بکر بود با هر دو بود لذا گفت لا تحزن ان الله معنا نتس الله با ماست غم نخور الله با ماست پریشان نشو الله با ماست هیچ غمی به خود راه نده یعنی خدا تعالی ما را حفاظت میکند اونجا خدا چطور نصرت کرد چطور حفاظت کرد به وسیله فرشتگان حفاظت کرد الان تو داستان ها آمده که انکبوت آمد اونجا تار بافت و از کنم کبوتر آمد تو کتاب ها تو تفاسیر هست حس این هم هستن ولی همه اینها به واسطه ای فرشتگان بو که الله اونا به فرشتگان دستور داد از رسولش محافظت بکنند حتی ابو بکر صدیق رضی اللہ الله عنہ می ما پایین غار بودیم اونا بر دهنه بودند اونها این طرف اون طرف نگاه کرد اگر پایین را نگاه میکردند ما را می دیدند ولی خدای عزوجل چشمهای اونها را منصرفو منحرف کرد لذا الله از می فرماید که فانزل الله سکینته عليه خداوند سکینه را بر او نازل کرد بر کی نازل کرد؟ عليه اینجا یک نفر است بر اون یک نفر بعضی میگن بر رسول الله ولی این تفسیر زیاد درست نیست. مگه کی پریشان بود؟ اونجا سکینه نازل میشه که اونجا پریشانی باشد رسول الله که دلش قرص بود به ابو بکوف لا تحزن. ان الله معنا رسول الله نیازی به سکینه نداشت. رسول الله پریشان نبود، فانزل الله سکینته علیه یعنی علی صاحبه، اون صاحب رسول الله، اون صحابی رسول الله، اونی که بر رسول الله جوش میزد و غم میخورد، بر اون سکینه نازل شد، علیه یعنی علی ابی بکرین ابن قال علما هنا وهو الاقوى الله ابن العربي ميگه كه قوی ترين قرين فانزل الله سكينه ته عليه يعني یعنی على ابي خدا سكينه را بر ابوبكر نازل كرد چرا لانه خوف على النبي من القوم شو بر براي خودش نميترسيد او جوش ميزاد غم ميخورد بر رسول الله فانزل الله سكينه ته عليه بتامين النبي رسول الله به او اطمینان داد نگران نباش. پس وقتی که رسول الله امنیت داد و به او اطمینان داد، الله هم بر کل بیشی نازل کرد، سکینه نازل کرد. فسکا نجاآشوه و ذهب روعه وحصل الامن. تفسیر قرطبی میگه این لرزش دلش رفت و اون غمش اون پریشانیش از بین رفت و امنیت حاصل شد قرار گرفت راحت شد فانزل الله سکینته علیه نازل کرد الله سکینش را بر او یعنی بر اون صاحبی که اون غم می خورد و به بجنود لم تروها الله پیغمبر خودش را تایید کرد کمک کرد به وسیله فرشتگانی که شما نمی دیدید به وسیله ملائکی به وسیله لشکریانی یعنی از ملائکی که لم تروها شما نمی دیدید بیمین خدا چطور کمکش کرد؟ و جعل کلمت الذین کفر و قرار داد کلمه کسانی را که کفر کردند یعنی کفار مکره کلمه‌ی آنها را الله پایین قرار داد یعنی اونها چی کرده بودند؟ اونا تصمیم گرفته بودند که رسول الله را دستگیر کنند. و کلمه اللهی هی العلیا و تدبیر الهی، اون نقشه الهی هی العلیا برتر شد، او اول شد، اون به نتیجه رسید. و الله عزيز، حكيم، الله غالب هست و الله با حکمت است. پس ببینید این مسئله هجرت زمنان آمد این مسئله هجرت زمنان آمد خداوند تعالی به عنوان نمونه در تبوک فرمود که ای, ای مسلمانان اگر شما پیغمبر مرا نصرت نکنید خدا به تنهایی را نصرت میکنه همون که 9 سال پیش وقت هجرت چطور نصرتش کرد الانم خدا نصرتش میکنه لذا شما نصرتش بکنید تفسیر روح المانی رسول الله صلی الله علیه وسلم در همین جریان ابو بکر خطاب کرد گفت یا ابا بکر ما ظنک با اسنین الله صالحهما ای ابوبکر نظر تو گمان تو عقیده تو درباره اون دوتا چیه اون دو نفری که دو نفرند ولی سومیشون خدا است این وقتی که بکر دغدغه داشت لذا بکر آرام شد خب بعد از این نمونه این نمونه از نصرت خدا رسول مکرمش را بعد از این الله تعالی در ادامه می فرماید که ای مؤمنین شما به جهاد برید به غزوه تبوک برید انفرو خفافا و ثقالا بروید سبک بار و سنگیم بار سبک بار و سنگیم بار یعنی چه خیلی تفسیر کردم بعضی گفتن به هر حال برید سبکبار یعنی اسلحه خوب دارید خوب نداری سلاحی آنچنانی نداری هم برو و سلاحی خوب داری هم برو بعضی گفتن سبکبار یعنی یک یک نفر دو دو نفر هم برو گرو گرو جنب جنب هم برو بعضی ها حتی تفسیر کردن بعضی مریض بودن ضعیف بودند گفتن که شما اگر در حالت مریضی هستید هم برید در حالت تندرستی هستید هم برید خفافاً و سقالن امر ابن جموع یک صحابی بود که لنگ بود چهار تا پسرش در جنگ همراه بودند ولی گفت من خودم میرم هر هرچی گفتن نیا پدر تو نیا گفت خدا فرموده انفرو خفافم و سقالاً خفاف منم سقال شما هستید لذا من میرم و جاهدو بی اموالکم و جهاد کنی با مالتون با جانتون در راه الله زالکم خیر لکم این کنتم تعلمون این بهتر اگر بدانید این داشته باشید که همون طور که ارز کردم جنگ, جنگ تبوک و غزوه تبوک که از غزوات سخت بود خداون هم اینجا بر منافقین زجر و سرزنش بیان می فرمد اللہ می فرمد لوکان عرضا قریبا اگر کالای بود منظور همون ارز کنم که آمادگی برای سفر قریب هست آمادگی برای سفر قریب وسایل کمی می خواد کمی می خواد. پول کمی میخواد لذا اگر کالای نزدیک بود یعنی قریب الحصول بود و سفرا قاسدن و یک سفر متوسط بود لتبعوک همه طور پیروی میکردن همه منافقین با تو میامدن ای پیان من ولیکن بعدت علیهم الشقه اما مشقت طولانی شد مشقت یعنی رنج سفر رنج سفر طولانی شد که از اینجا باید تبوک 20 روز در راه بودند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقط 20 روز در مسیر بودند خیلی سخت بود و انها می قسم می خوردن منافقین و سیحلفون بالله لو استطانا به خدا قسم خوردن که اگر ما می توانستیم لخرجنا معاکم با شما خارج می شدیم ولی نمیتونیم توانی را نداریم الله میفرمه با این دروغ هایشون یهلکون انفس خودشون را حلاک میکنند خودشون را نابود میکنند خدا میدانه اینا دروغ میگفتند دروغ میگفتند خب از این آیه به بعد در واقع اتاب هست بر منافقین وقتی که رسول الله گفت همه باید بریم به تبوک چند گروه بودن یک گروه که نرفتن اینا میگن متخلفین یک گروه منافقین بودند که اینها همراهی نکردند یک گروه دیگه از صحابه مخلصی که اونها هم نرفتند عذر نداشتند معذور نبودند اونها هم تنبلی کردن کوتاهی کردند نرفتند بعض این صحابه دو دو گروه هستند یک گروه همون روزهای اول گریه کردند و زاری کردند و توبه کردند خداوند زود توبهشون را پذیرفت یک گروه دیگر کمی درنگ کردند تاخیر کردند امروز فردا کردند آخر توبه کردند توبهشون پذیرفته نشد تا پنجه روز تا پنجه روز رسول الله دستور در باینا غط رابطه کرید در پایان ذکرشون میاد بالاخره تا اینکه که توبه اینها قبول شد به همین خاطر این سوره را الله عز و جل سوره توبه نامگذاری کرده که توبه این مخلصان پذیرفته شد حال منافقین وقتی که میخواستند شرکت نکنند پیش رسول الله صلی الله علیه و وسلم آمدند و خیلی های معمولی یکی میگفت که من مثلا فلان عذرا دارم یکی میگو فلان عذرا رسول الله هم میدونن که بعضی عذرا عذر نیستند ولی رسول الله بسیار اخلاق کریمانه ای داشت رو در بایستی داشت اونا که می اومدن یا رسول الله به من اجازه بده میگفت باشه به من الله تعالی اینجا پیغمبر را تذکر داد اما قبل از تذکر الله میفهمه عف الله خدا تو را معاف کرد خدا تو را بخشید اما لی ما از چرا اجازه دادی؟ تو اجازه نمی دادی. چرا اجازه میدادی به اجازه نمی دادی. نه خودشون نمی آمدند. اگر تو می گفتی نباید بیای بی بازمونا نمی آمدند. ولی مشخص می شد که منافقند الان میگه من اجازه گرفتم. الان نفاقش ظاهر نمیشه لذا الله می فرماید عف الله عنك الله معاف شما را لما اذنت لهم چرا اجازه دادی انهاره حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى واضح بشي برائ الشما كسانی که راس میگویند و تعلم الكاذبين وتعينك شما بداني دروغيان را بدونید دروغیان اجازه نمی داید تا مشخص بشه راست میگه یا دروغ میگه راستی راستی اجازه میخواد یای نه به دروغ لا ذنو الذین يؤمنون بالله والیوم الآخر الله تعال اینجا تعریف میکنه از مخلصین از صحبه اونایی که مخلصه هیچ چوق بر اجازه نمیاند لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر اجازه نمیگرند از شما آنهاي که ایمان دارن به خدا و روز آخرت اين يجاهدو با اموالهم اجازه انفسهم اجازه از اين که جهاد کنن با مالشان و جانشان و الله و الله عليم بالمتقين الله عزوجل نسبت به این متقیان خوب آگاہ و عالم هست خدا خوب میشناسد این بندگان متقی خودش را اینا کیا بودند همون صحابه مخلصی که نه آمدند اجازے اجازه گیرند کی اجازه می گیرند انما یستعذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر جزئینیس کے که می گیرند از شما برای نشستن در خانے کی اجازه می الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر انهای ای ایمان نہ دارن به خدا و روز یعنی منافقین وانهای کی ورتابت قلوبهم دل های شک دارد مرض اول ایمان نداشتن به خدا مرض دوم ایمان نداشتن به روز آخرت مرض سوم نفاق ورتابت قلوبهم دل‌های آنها شک دارند فهم فی ریبهم مترددون آنها در شکشان تردید دارند یعنی تردید یعنی شک در شک اینقدر آنها تردید و شک دارند که در شک خودشون هم شک دارند یعنی این شکش مضاعف و چند برابر خوب الله تعالی می فرماید اینا هیچ عذری ندارن یکو میاد میگه که بچه‌م مریض شد یهو میاد زنم فلان شد خب از چند روز پیغمبر اعلام کرده که باید برای تبوک بریم اگر شما واقعا قصد رفتن داشتید تا این چند روز شما آمادگی می‌کردید هیچ آمادگی نکردید شما چرا تعالی تعالی آمادگی نکردی, نکردی. الله می فرماید ولو اراد الخروج اگر اینها اراده خروج با تو داشتند لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً آمادگی می کردن برای او آمادگی کردنی عصبی زرهی سپری شمشیری چیزی آماده میکردند. ولی از همون اولینا خودشون را اماده نکردن ولیکن کریه اللهم بعاثهم اما خدا نخواست سوینا منافقند دلشون نفاق داره خدا نخواست بلند شدن اینها را برای جهاد فثبتهم مانع آنها شد خداوند جلویشان را گرفت قیل عدو مع القاعدین و به آنان گفته شد که بشینید با کسانی که نشستن کی نشسته؟ معذور نشسته زن نشسته پیرمرد نشسته شما بامونا بشینید لذا خدای از وجل اجازه رفتن نداد به اونها و دیگه اگر اینا می چیکار میکردند؟ کار می کردند اینا بغیر از اینکه که شما را پریشان بکنند غیر از فساد غیر از اذیت کردن کاری دیگه ندارند لو خرجو فیکم اگر اینا خارج بشن در میان شما ما, ما زادوکم الا خبالا ها در شما نمی افزایند مگر فساد را ولا در میان شما زدن برای شما فتنه را یعنی تو شما هم میخوانند شما را هم منصرف میکردند یعنی بقیه مجاهدین را و فیکم و خداوند می فرماید در میان همین ها هم بعضی جاسوس هستند همین منافقین جاسوس کیا هستند مشرکین هستند والله علیم بالظالمین همون طور که در گذشته و والله علیم بالمتقین صحابه الله متقین گفت اینا را ظالمین خداوند هم متقین را میداند هم ظالمین را میداند لقد ابتغوا الفتنة من قبل این شرارت شرارت جدیدی نیست از قبل اینها طالب فتنه هستند از قبل میخواستن که صفحه بر علیه مسلمانان باشد میخواستن شرائط بر علیه مسلمانان باشد وقلبو لك الامور و بسیاری از امور را برای تو وارون جلو دادن برعکس گزارش دادن حتی جا الحق و ظهر امر الله حتی که حق آمد و دستور خدا ظاهر شد یعنی خداوند افشا کرد دروغ هایشان را از قبلنا هر دروغی میگفتند خدا افشا می کرد و هم کاریون در حالی که انا نمی پسند دیدن اون آیات را اون آیاتی که دروغ های اونها را افشا کرد هر دروغی که منافقین میگفتند و برای رسول الله سوگند می خوردند برای رسول الله می می‌خوردن خدای عزوجل افشا می کرد لذا الله می‌فرماید تمام دروغها اینها افشا شد یکی از اونها اینه که در آیه بعد می خانیم بعضی از منافقین پیش رسول الله آمدند فردی بود به نام جد ابن قیس جد ابن قیس گفت یا رسول الله من اجازه بده من نیان باشم رسول الله گفت چرا شما میخوایی نیایی؟ گفت من یک مریضی دارم که زن جماعت را ببینم حالم خراب میشه گرفتار زنها هستم و بالخصوص اونجا بیام زنهای سفید پوست و زرد پوست رومی ها و اروپایی ها را که ببینم نمیتونم خودم را کنترل بکنم من بزار من نیام تفسیر قرطبی نوشته: قال جد ابن قیس جد ابن قیس به رسول الله گفت قد عرفت قومی قومی من هم میدونند که انی مغرمم بالنسا من گرفتارم بازن ها این مریضی تو من در وجود من هست و انی اخشا من می ترسم این بنات بن الاسفر اگر اون زنهای زرد پوست را ببینم شکلشون زرد نه سابر وازن لي في من اونا را ببینم نمیتونم سبر بکنم لذا فلا تفتنی و اززن لی فی القود یا رسول الله مرد تو نه نگه نیانداز و بمن اجازه بده من نیان باشم. از طرفی میترسی دیم بدبخت بزدل می ترسید ولی این بحان را آورد الله می فرماد ومن هم من یقول ذلی بعضی از اینها انها اجازه بده به من واللا تفتنی مرت تو فتن نانداز ال می فتن ک کد فتن حین که تو افتادی ال ف فنت سقطتو خبردارینا در فتنه افتادا فتن همینه که خلاف دستور الله انجام میدی خلاف دستور رسول الله انجام میده خدا میگه برو تو نمیری. تو تو فتنه هستی وچی چیزی این انها را اسلاح می کند و می فرمد وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُم بالکافرین برای انو کافرین جہنم کافی ہے کی احاته می کند انها را انها را از هر طرف جہنم میزند. زند احاته شم از هر طرف میسوزاند. سو زند انت سبک و انغادر انها با شما مشکل دارند با شما اناذ و زد دارند که انت صبک حسنه تسؤهم اگر به شما نعمتی برسد خوبی برسد فتحی موفقیتی غنیمتی تسؤهم اونها را ناگوار میشه تسؤهم یعنی چه یعنی ناراحت میکنه اونها را که چرا مسلمانان پیروز شدند ببین منافق همیشه خصلتش اینه شما امروز ببینید هر جا که مسلمان در جبهی پیروز میشه منافقی ناراحت میشند هر کسی که از پیروزی مجاہدین ناراحت میشه تجدید نظر بکنه اون منافقه می میفرماید که اگر شما را به شما خیری برست اینا ناراحت میشند پس علامت نفاق در زمان ما همینه خیلی کشورها هستن مثلا همیشه اسلام اونجا هستند فعالیت اسلامی میکنن اینها وقتی که مثلا حکومتی را میخوان به بگیرند مسلمانان خیلی از حاکمان دنیا ناراحت میشند که چرا به دست اسلام گراها افتاد مثلا حکومتی ترکیه چرا به اسلام دست اسلام گراها افتاد حکومتی مصر چرا به دست اسلام گراها افتاد قبلان که افتاد حکومت از کنم تونس قبلن هم به دست اسلام تمام کشورای مسلمان ناراد شدند معلوم میشه این سران مسلمان که ناراد شدند اینا همون منافقن منافق اصلی همینا هستند چرا مسلمان ناراد بشه که اسلام گرابیت پیروز بشه لذا جای اگر مجاهدین پیروز میشند موفق میشن میگن تیروریستان آمدند دنیا دیگه نام میشه این اینا در واقع این علامت نفاق است علامت نفاق را برای زمان خودمون یاد بگیریم ان تصبک حسنه تسوهم اگر به شما حسنه ای برسه فتح موفقیتی ناگوارشون میشه و ان تصبک مصیبته اگر مسیبتی به شما برسه از میگم ما, ما اول گفتیم به همین خاطر ما همراه نشدیم یقولو قد اخذنا امرنا من قبل ما از قبل برای امر خودمون برای کار خودمون برنامه و تدبیر کردیم و یتولو و بر میگردن در حالی که تو دلشون خوشحالند که ضربه شما خوردید شکست را شما خوردید الله عزوجل جواب میده اگر برای ما مسلمانان ضربه و شکستی بیاد هم به نفع ماست چون مولای ما خواسته اگر پیروزی بیاد هم به نفع ماست ما گاهی شکست ها برای ما هم خیر است باعث بازسازی میشه باعث تجدید نظر میشه باعثی میشه که ما از سر نو خودمون را بسازیم روی ایمانمون فکر بکنیم روی سیاست هایمون فکر بکنیم هر جا کارمون با, اش... با اشکال است، اشکالات را رفت بکنیم خیلی شکست ها به نفع ما تمام میشه لذا الله می فرماید قل لن یصيبنا بوگو هرگز به ما نمی رسد الا ما كتب الله لنا مگر آنچه که الله برای ما بنویسد هو مولانا آن الله مولای ان پشتیبان نماز او حمای نماز و علی الله فلیتوکل المؤمنون فغت وغت بر الله باید توکل بکنن مؤمنان مومنان باید توکلشم بر الله باشه و بعد ای پیانبر به این منافقین بازم اعلام بکن قل هل تربسون بنا الا احد الحسنین شما برای ما انتظار نمی کشید مگر یکی از دو خوبی را ما در جنگ بریم جهاد بریم هر چی بیاد برای ما خیر است یا شهید میشیم به جنات فردوس میریم هم خیر است یا پیروز میشیم و خدای عزیز و جل ما را غالب میکنه هم خیر است لذا شما منتظر چی هستید شما که انتظار میکشید فردا یا خبر شهادت امامیات هم ما به بهشت رفتیم یا خبر پیروزی امامیات هم ما غالب شدیم اما شما چی میدونید که ما برای شما انتظار چی را میکشیم ما انتظار می کشیم کی عذاب خدا بیاد شما را بگیره شما منافقین را شمای که با اهل حق مخالفت می کنید قل هل تربسون بنا الا احد الحسنيين بگو شما انتظار نمی کشید برای ما مگر یکی از دخوبی و زیاد زیبایی را یا شهادت یا فتح وونحن ننتسو ب اما ما انتظار میکشیم برای شما ان یسی بکم الله من عنده. خدا به شما برسانت اذای از جانب خودش او به عیننا یا به دست ما به ما دستور بده اجازه بده که ما سرهای شما را بزنیم که اینقدر سنگاندازی میکننی در راہ جهاد بله فطرسو ان معک متربسون. شما, خرج کن، شما منتظر باشید ما هم با شما منتظریم بعضی از این منافقین آمدن بحانه کردند گفتن یا رسول الله ما نمیتونیم بیاییم فلان عذر را داریم ولی میخواستند که چون میترسیدند از مرگ میترسیدند از سختی اما از یک طرفی میترسیدند که نفاقشون آشکار بشه یه پولی چیزی کمک میدادم گفتم ما نمیایم ولی این پول مال ما را بگیر در رای جهاد مصرف کن که چی؟ پیغمبر فکر بکند که اینها اینها واقعا عذر دارند اگر اینها منافق بودن. پول خرج نمی کردند الله عز و جر کرد ارز کردم اسم این سوره سوره فاضحه هست که این هر هر کاری منافقین کردن خدا رو زوایشون کرد اللہ می فرماید قل انفقو بگو خرج کنید توعا او کرحا با خوشی چب غیر خوشی لن تقبل منکم هرگز هرگز قبول کرده نمیشه از شما چرا انکم کنتم قوم فاسقین چون شما قومی هستید فاسق فاسق یعنی خارج از ایمان خارجین عن ایمان خب حالا تفصیل این اجمال چرا خدای از و پولشون را قبول نمی کند صدقشون را که در راه خدا می دند قبول نمی کند الله می و وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم چیزی دیگر مانع انها نیست که قبول بشه نفقاتشون مگر اینکه ان اینها کافرند الا انهم كفروا بالله و برسوله به بخدا و بررسول کفر کردند خب کسی بگه اینا به نماز میان چطور کف کردن اینا میشه در صفحه نماز الله اللہ میفرمه وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ به نماز نمیان مگر با کسالت میان یعنی خیلی سنگین نماز برایشون به خاطر نشان دادن میان بای الله اصلا نمیخوام بیاند پس ببین یکی دیگر از علائم منافقین اینه که نماز برای انها باری هست بدوش اونها سنگینی نمیتوانند اللہ نجات بده ما مسلمان ها همین طور هستیم نماز سنگینه خیلی برایشون نماز چیه سنگین خیلی ها بگم خود ما ها. برای ما نماز سنگینه و همیشه از علماء سوال میکنیم نماز احکام نماز را وقتی که به ما یک فتوه سبکتری بدن زوغ زده میشیم بعضی میگم مثلا من همیشه تو سفرم نماز سفر بخانم بله بخواند همیشه تو سفر باشی اشکال ندار نماز باز نماز سفر بخوان درکت بخوان یکی میپرسه که سنت بخوانم وقتی که کسی بگه نه سنت نخوان از خوشحالی نمیدونه چی کار بکنه گویا که نماز یک باری هست برایش نماز وقتی که نمازش تمام میشه بگه راحت شدم در حالی که رسول الله راحتیش در داخل نماز بود وقتی که وارد نماز میشد لذا الله عز وجل می فرماید ولا یاتون الصلاه الا وهم كسالا بنماز نمی آین مگر اونها کسلان مگر اونها بسیار سنگین نماز بر اونها ولا ینفقون الا وهم کارਿਹون اونها در راه خدا هم خرج نمی کنن مگر نمی پسندند خرج کردن را یعنی با اکراه خرج می کنند، با زور اجبار خرج می کنند. چونکه اعتقاد نداره کسی اعتقاد داشته باشه به خوشی خرج میکنه لذا این از کنم که خصلت دیگری از منافقین بعضیا هستند که پول نمیدند در راه خدا اما گاهی بخاطر یک شخصیت پول زیادی هم میده اما تو دل سینرات این همه پول من چرا بدم این همونه ولا ينفقون الا وهم کارحون. اینا خرج نمی کنن مگر اینکه که نمی پسندن خرج کردن را خب سوال اینجاست که منافقین اگر منافق هستند و از نظر خدا مطرود و مردودند چرا وضعشون اینطور خوبه؟ اونها هم از نظر جسمی هم از نظر مالی هم سرمایدار بودند هم قوی حیکل هم خوشتیب همه چیز ہمین چیزشوں برابر بود اللہ می فرمائے فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم شما در شگفت نین اندازت مالو مال و اولادشون مال زیادار اولاد دارن واش اینما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا جو نیست کے اللہ اراده دارت اللہ می عذاب بده به وسیله همین مال و در زندگی دنیا مال اولادشون را خدا چنان آفت میاره که عذابی برایشون میشه و تزحق انفسهم و هم کافرون و انها تزحق انفسهم خداوند نفسشون را میگیره در حالی که و هم کافرون اونها چیند کافر هستند یعنی جانشون را میگیره بدون ایمان میمیرند و وقتی که شما از تبوک برگردید این, این را خدمت شما کنم که همه این آیات در مسیر تبوک وقتی رسول الله برمیگشت نازل شد هنوز نیامده اینا پیشا پیش خداوند پیشگویی میفرماید میگوید ای پیامبری من ویحلفون بالله انهم لمنکم یعنی اذا رجعت الیهم هر وقتی شما به مدینه برگردی اینا میان سوگند میخونند که یا رسول الله من ما از شما هستیم یکی از علائم منافقین سوگند غلیزش هست این قد سوگند می خورد این قد چرب زبان هست که به طرف بقبولاند که من از شما هستم سوگند می خورد که انهم لمنکم آنان از شما هستند در حالی که الله می و ما هم منکم اونا از شما نیستند پس چرا این قد قوم سوگند می خورد ولیکنهم قوم یفرقون اما اینها قوم ترسوی هستند یفرغون فرغون یه خافون می بزدلند لذا میترسن که اگر بگن از شما نیستن شما به اونها ضرر نرسانید و خداوند می اینقدر اینها این از شما تنفر دارند و از شما نیستند که لو یجیدون ملجان اگر پناهگاهی بیابند او مغارات یا غاری ببینند او مدخل یا سوراخی یعنی یک جایی که از پیش شما فرار کنند اینقدر از شما تنفر دارند لولو الیه پشت میدن سوی اون و هم یجمحون در حالی که میگوریزند جموح سرکشی را هم میگند فرار و گوریختن را هم میگند تون تون میروند لذا ای پیامبر شما اینها را بشناس با سوگندهای اینها را باور نکن اینها به شما دروغ میگویند و بالاخره خدای عزوجل اسامی منافقین را به رسول الله اعلام کردند که اینها منافق هستند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکسی نگفتند صحابه بعضی از صحابه جلالی بودند احساساتی بودند اشدع الکفار بودند ایمان قوی داشتند نمیتونستن خودشون را کنترل بکنند مثل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خالد ابن ولید لذا اگر گفته میشد اینا سرهاشون زده میشد فقط به یک صحابی حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ اسامی منافقین را رسول الله گفتند به همین خاطر به می حذیفه صاحب سر صاحب السر رسول الله کسی که رازدان رسول الله راز فقط به او گفت لذا الله می فرماید و منهم من یلمزک من فی الصدقات بعضی از همین منافقین کسانی هستند که شما را در صدقات تانه می زنند رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم صدقات را تقسیم می کرد بین صحابه بین فقرا. این آمد به این هم مقداری داد این به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم این کی بود زلخوه سره می گویند در حدیث آمده زلخوه سره یعنی شکم کوچیکی داشت آدم قد کوتا توپل و شکم کوچکی داشت. این آمد به رسول الله گفت: الا الله بالله ویلک عادل. ویلک به معنای هلاکت است. عادل عدالت کن چرا ظلم می‌کنی؟ چرا به من کم دادی؟ رسول الله گفت: ویلک. من یعدل عادل ایلم اعدل. اگر من عادل نکنم پس کی عادل می‌کند؟ چه کسی میتونه عادل باشه تو به من میگه که عدل نمیکنم. به رسول اللہ گفت اعدل اون ابتدا گفت اون ویلک کلمه رسول اللہ است رسول اللہ به اون گفت که اگر من عدل نکنم دیگه کی عدل می کند و بعد همین بود حضرت عمر فاروق گفت یا رسول اللہ گردنش را بزنم گفت نه. بعدن مردم میگویند که از نزدیکان خودش را میزنه. اما از نسل این رسول الله فرمود از نسل این قومی پیدا میشه که با مسلمانان می جنگند از جماعت مسلمانان خارج می شوند و با مسلمانان می جنگند و قرآن را میخواند. اما از حلقومشون رد نمیشوند و از اسلام خارج میشوند. همان طوری که تیر از کمان خارج می شود لذا بعدن در زمان سیدن علی رضی الله تعالی عنہ خوارج ظهور کرد و خوارج از نسل همین زل زلخوی سره بود لذا اینها از جماعت مسلمانان خارج شدن که اینها می گه خوارج و همه مسلمانان را تکفیر می کردند هم علی را تکفیر کردند هم معاویه را تکفیر کردند هر دو گروه را تکفیر کردند لذا الله تعالی اینجا در مورد این فرد میگه و من هم من یلمزک فی الصدقات بعضی از اینها هستند که در صدقات شما را طعنه میزنند فین اعتو منها ردو اگر داده بشه صدقه داده بشه راضی میشه و الا لم یعتو منها اذاهم یسخطون اگر داده نشه دری هنگام ناراضی میشه دری هنگام خشم میکنه ناراضی میشه. الله تا لامی فرماد. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله و اگر آنان راضی میشودند بر آنچه که خدا داده به انها و رسولش به انها داده و به جای این الله وقالوا قالو الله حسب الله گفت اون وقت سياتينا الله من اگر پیغمبر به من کم داد خدا از فضل خودش به من زیاد میده سياتينا الله من فضله ورسوله ورسولش به من میده بعدن میده انا الى الله راغبون ما بسوی خدا بر می گردیم رغبت میکنیم به سوی خدا توجه میکنیم اگر اینطور می گفت برش بهتر بود اما این بیچاره اعتراض میکنه میگه ادالت کن میگه چرا ظلم میکنی تو الایاذ بالله لذا الله عزوجل اتاب دیگری و سرزنش دیگری برای منافقین فرمودند بعد از این الله تعالی درباره صدقات ببینید چون بحث صدقات آمد هنوز بحث منافقین ادامه داره چندین گروه دیگر از منافقین بودند که رسول الله را اذیت کردند اما قبل از اون درباره صدقات الله تعالی بیان میفرماید که مسارف صدقات چی کسانی هستند. ببینی مراد صدقات اینجا زکات هست و صدقات فرضی هست هشت گروه را الله تعالی ذکر کرده که این هشت گروه را شما صدقه بدهید کیا هستند انما صدقات للفقراء جزی نیست که صدقات را به فقرا بدهید و المساکین به مساکین بدهید بین فقراء و مساکین چندین فرق گفتند ولی من یکی را میگم فقیر اون که مال دارد کمکی دارد مثلا ارز که منزلی دارد ماشینی دارد اما مال زیادی ندارد یا مثلا میره صبح کار میکنه بعد از زور میاد دویست هزار تومن گیرش میاد اون شب میخوره بلاخره کی دارد یک مقداری شاید پسنداز دارد ولی پسندازش کمه به اندازه نیست که بش زکات داد کمکی دارد مسکین اونه که هیچ چی ندارد والمساکین، چون چونکه قرآن شما در سوره لاقسم خان دید در سوره بلد او مسکین زامتربه او مسکین زامتربه یعنی چه مسکینی که خاک دارد خاک دارد یعنی چی تو خونش برو خاک میبینی دیگه چیزی نمیبینی بعضی گفتن که فقیر چیزی داره مسکین بعضی گفتن برعکس چون شما خاندید که میخانیده ایشالله در سوره کهر که یک گروهی یک گروهی بودند کشتی داشتند حضرت از کنم خیزر کشتی را پاره کرد بعدم به موسی گفت که من چرا کشتی را سوراخ کردم گفت که اما سفینت فکانت لی مساکین. این کشتی مال چند تا مسکین بود خب اون چند تا مسکین شریک شدن یک کشتی خریدن کرای کشی کنم معلوم میشه که مسکین ہونه که چیزی داره اونا باوجودی که چند نفر شریک شده بودند یک کشتی خریده بودند قرآن اونا رو میگه مساکین پس مسکین اون که چیزی دارد و فقیر اونه که هیچی ندارد بنده از روی این آیه به صورت مزاح میگم ولی خوب یک حقیقتی هم هست که اگر شما دیدید دید یک آدم فقیری هست اما برای امرار معاش خودش رفته یک فرایدی غستی گرفته و با این داره کرایه کشی میکنه روز هزار تومان 200000 تومان هزار تومان گیرش میاد نصفش را به قسطش میده نصفش را برای زنو بچهش خرج میکنه فکر نکن این پولدار ماشین داره نه این مسکین همینه یعنی به این میشه زکات بدی قسطش جلو بیفته این مقدار دستش به دهنش برسه برای بچه شیک لباس نو بخره مردم اکثرم با همین وضعیت زندگی میکنند تحقیق بکنید به ظاهر تو کشیده هستند ولی خانه چیزی ندارند تحقیق میشه. لذا فقیرون که هیچی نداره مسکین اونه که مقداری مال داره اما کم داره با سختی می گزاراند. لذا این هم مصرف زکات زکات به این هم بده لذا اون کسی که بعضی میگن اینا مستحق زکات بله دانشجویان مستحق زکات هستند پول ندارن البته اون که سرمایدار باشه جدا است کارگران مستحق زکات هستند کسانی که بالاخره با سختی درآمد دارند و با سختی کار می‌کنند، غصه‌شون را، غصه‌ای اگر مندهشون را میدن، اینها همه مستحق زکات هستند. کسی ازدواج کرده، وام کرده، والآن داره وام میده، اینها همه مستحق زکات هستند. لذا کلن برای یک بیوی که هیچ یک ریال داشته نباشد نگردید. اون بهتره، ولی اگر اون نبود، اینام همه مصارف زکات هستند. و سومی والعاملین عليها کسانی که بر زکات کار میکنند یعنی از طرف حکومت اونها چی هستن مامور هستن دیگه درامدی در ندارن از همین درامد حقوقی بهشون میده پس اونها مستقیم زکاتند گویا کارمند هستند والمؤلفه قلوبهم و برای اینکه دلهای اونها را چی بکنیم برای اینکه دلهایشون رو به دست بیاری ببینید بعضی از کفار که با مسلمانان دوست بودند هنوز مسلمان نشده رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها هم میداد اونها رو میگه موالفه القلوب خب بسیاری از علما و فقها میگویند که یک زمانی نیاز بود که همه بیان مسلمان بشن بعدا جمعیت زیاد بود جمعیت زیاد شد نیاز به اینها نیست الان به این القلوب ندین مذهب دیگه فقها همینه که به اونها داده نشه اما امام احمد ابن حنبل رحمه الله میگه این حکم هنوز هست نیازی نیست ندین بیشن اگر یک وقتی افرادی بودن که شرایط ایجاب میکنه به پول بدیم تا دلشون نرم بشه بیان ایمان بیارن گنجایشش هست بعضی از مفسرین معاصر میگوین این نظر امام احمد ابن حنبل در امروز بیشتر احساس میشه که نیاز به این نظر هست واقعا بعضی وقتا افرادی هستند اگر ما کمکی بکنیم از همین مال زکاتم هم بهشون بدیم شاید بیم به طرف دین شاید بیم به طرف توحید لذا اشکال نداره بدید به اینها بر اساس یعنی مفسری میگم بر اساس نظر امام احمد و فر رقاب و همچنین در آزاد کردن گردن یک غلامی هست و این غلام مثلا با مولای خودش قرار داد بسته که هر وقتی من ده هزار درهم به تو دادم من آزادم میگه باش این میره کار میکنه لذا گردن این را تو آزاد کن از مال زکات بده تا این آزاد بشه سوابش به تو و غارمین یعنی مقروزین کزانی که مقروزند ورشکست شدند گرچه دیروز سرمایدار بود همه چیز داشت اما الان ورشکست شده هیچ چی نداره ظاهرا حالش خوبه ولی خیلی وام داره بینها هم زکات بدهید و فی سبیل الله و همچنین در راه خدا بدهید در راه خدا مثلا مجاهد میره جهاد میکنه طالب العلم میرے درس می کنے دانشجو میرے تحصیل میکنه، کنے را ہم زکات بدید حاجی در رای حج هست ہم بیش بدید بی زکات وقتی نیاز دارے وابن السبیل مسافر مسافر در شهر خودش دارے ولی انجا ایچی ندارے مستحق زکات هست فریضتا من اللہ انها همه فریضه هستن از جانب اللہ یعنی تائین شده هستند این افراد تعیین شده هستند به اینها بدید والله علیم حکیم الله جل علیم هست هر چیزی را میداند و کارهای الله جل با حکمت است و منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن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 يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله و رسوله احق ان يرضوه احق ان, يرضوه إن كانوا مؤمنين الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم در آیات گذشته ذکر منافقین بود و صفات منافقین بیان شد چونکه مبحث مبحث تبوک هست غزوه غزوه تبوک هست که در رابطه با غزوه تبوک الله عز و فرمودند کسانی که کوتاهی کردند کسانی که تخلف کردند و کسانی که حتی مانع و مزاحم دیگران شدند همیشه منافقین در هر معرکه مانع بودند، مزاحم بودند، موی دماغ بودند، نه خود می‌رفتند به خوبی و نه کسی را می‌گذاشتند و اگر می‌رفتند در جنگ شرکت می‌کردند به غیر از دردسر و به غیر از تمسخر و استهزا برای مجاهدین، برای صحابه مخلص چیز دیگه نداشتند. الله تعالی بعضی از منافقین را اینجا ذکر کرده و وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ و وَيَقُولُونَ هو اُذُن بعضی از این منافقین هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را آزار میدند، اذیت می کنند پشت سر رسول الله حرف می زنند و می گویند به رسول الله اذن اذن یعنی هر چیزی را گوش می کند منافق میکردند که رسول الله از روی سادگی هست هر چیزی را باور میکنه هر چی ما میگیم می گوش میکنه غافل از اینکه اخلاق کریمانه و اخلاق بسیار بلند و بالا رسول الله ایجاب میکرد که رسول الله پرخاش نکند رسول الله برخورد نکند تند نرود بر آنان وقتی که هر سخنشون را گوش میکرد میگفتند اذن هست بلا نسبت یعنی گوش هست هرچی که بگی قبول میکنه گوش میکنه باور میکنه این منافقی بود به نام نبتل ابن حارس. بسیار این بیادب بود اینو گفت در باره رسول الله اللہ قول قل اذن و خیر لکم اون گوش کننده خیر هست برش من هر سخن خوبی باشد گوش میکند اما اصلش اینه که بالله و یؤمنو للمؤمنین پیانبر من به خدا به من خدا ایمان دارد و به مؤمنین اعتماد دارد ایمان به مؤمنین یعنی اعتماد به مؤمنین به مؤمن اعتماد دارد و اگر حرف شما را هم گوش می کند از روی قلب پاکش هست شما را هم مؤمن می پندارد و به شما اعتماد دارد ورحمت للذین آمنوا منکم وإن رسول صلی الله علیه وسلام رحمتي هست برای کسانی که ایمان آوردند از شما یعنی کسانی که ایمان آوردند چه ایمانشون ظاهری هست چه ایمانشون واقعی هست رحمتی هست شما را که شما اظهار ایمان می کونی شما را رسوا نمیکند ایمان ظاهر شما را قبول می کند اسرار شما را که خدا به او گفته افشا نمی کند شما را بدنام و رسوان نمی کند اون کاری که با مشرکین می کند درگیری برخورد جنگ با مشرکین با شما نمی کند این رحمتی هست ولی شما قوم ناقدری هستید اما اگر رسول الله از این برخورد شما از بی ادبی شما اگر رسول الله شما برخورد نمی کند بدانید که خدای از زوجال شما را عذاب میده. الله می, می فرمد: والذین يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. آنهایی که رسول خدا را اذیت می کند برای آنان عذاب دردناک است. خدا بر شما دارد. خدا شما را به اشد مجازات گرفتار می کند شما که پشت پیام پشت سر پیامبرم حرف میزنید پیامبر را تمسخور می کنید و به پیامبر بد و بیرا میگویید خدا عذاب دردنا برای شما آماده کرده. و بعد یکی از خصلت های بد منافقین این بود که پشت سر حرف می زدن وقتی که خبر به پیامبر اکرم صلی الله و وسلم می رسید می آمدند قسم یاد می کردند سوگند یاد می منافق بودند اینها با هم صحبت می یکی جلاد ابن سوید و یکی ودیع ابن ثابت اینها هم پشت سر داشتند حرف می زدند اونطوری که محمد می گوید اگر حق باشند ما از اولاغ بدترین پس مسخره میکردند سخنان رسول الله را میگفت اگر حرف ایشون حق باشد و حرف ایشون واقعا درست باشد ما از علاغ بدتریم یک صحابی مخلصی بنا می عامر ابن قیس همین جا نشسته بود گفت سوگن به خدا حرف رسول الله حق است شما از علاغ بدترید وقتی که این گفت با هم درگیر شدند این صحابی حضرت عامر خدمت رسول الله شکایت کرد گفتی یا رسول الله اینا پشت سر شما اینو میگن اینها آمدند اونها آمدند خدمت پیغمبر و قسم خوردند که ما چینی چیزی نگفتی منافقی که از صفات و خصلتاش همین که قسم می خورد چه قسم جلاله در دلش بوی از ایمان نیست مقدار کمی هم باور نیست که این قسمو را میگیره آخر این آمر ابن قیس داشت تکذیب می شد آمر ابن قیس هم قسم خورد گفت که من سوگن می به اون خدایی که جانم در قبض قدرت او هست اینا اینا گفتند و همونجا دعا کرد ای خدایا از این جلسه ما بلند نشیم تا این که راست و دروغ را تو مشخص بکن وقتی که این دعا را کرد در همون جلسه این آیه نازل شد و الله تعالی انها را تکذیب کرد این نفر بودند این دوتا با هم حرف می زدند فقط گوش میکرد. اما این دوتا که با هم بیعدبی میکرد، اینها از ایمان محروم شدند اون سومی وقتی که دید خدا آیه نازل کرد او تکان خورد او منافق سوم، او توبه کرد اشاره به توبه بعضی از منافقین در آیات هم هست اون توبه کرد و گفت خدا یا من تا حالا اشتباه کردم دیگه من از دل به تو ایمان میارم و بعد بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ یمام در کنار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با مدعیان نبوت با مسعله کذاب در اون درگیری اون شریک بود و شهید شد ای حالن الله تعالی نسبت به اینها این آیه را نازل فرمود الله می فرماید یحلفون بالله لكم ليرضوكم اینا سوگند میخورن به الله برای شما سوگند میخورن لیرضوکم تا که شما را راضی کنن سوگن سوگند میخورند سوگن در حالی که والله ورسولو احق ان يردوه ان كانوا مؤمنین الله و رسولش حق تر است سزاوار تر ان کی اورا خدا راضی کنند، اگر اینها مؤمنند، اگر مؤمن واقعی هستند خدا را راضی کنند، رسول خدا را راضی کنند با اخلاص ایمان بیاورند، استه دل ایمان بیاورند چرا اینها به ظاهر ایمان می و بعد الله عزوجل تخویف اخروی وعید اخروی برای اینها بیان فرمود الله فرماید الم يعلموا من يحادد الله ورسولا آیا اینها نمی‌دانند که همان شأن این است هر کسی مخالفت کند با الله و رسولش فان له نار جهنم خالدا فيها همان برای او آتش جهنم هست همیشه در اون آتش جهنم ماندگار می شه الخزی العظیم این رسوایی بسیار بزرگ است این رسوایی رسوایی بزرگی است که انسان به دلیل کفر به دلیل نفاق تو آتش جهنم بیفتد لذا خداوند تکلیف اخریت انهار روشن کرد و وعید آخرت، عذاب آخرت برای این دسته بیان فرمود يحضر المنافقون ان تنزل عليهم صورت تنبئهم بما في قلوبهم ما همون که قبلا خواندیم منافقین بین تردد بودند همیشه تردد داشتند که واقعا ایمان ایمان حق است، درست است پیامبر حق است به همین خاطر نفاق خودشون را انجام می از یک طرفی می ترسیدند منافق خیلی ترسو هست می ترسیدن که هر آیه اگر نازل بشه این آیه بر علیه اونها مطلبی نباشد لذا همیشه در واهمه بودند در ترس و وحشت بودند و از یک طرفی مسخره هم می کردند الله تعالی می فرماید یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم منافقین می ترسند برحذرند از اینکه نازل بشه صورتی سورتی بر علیه ها سوره ای بما في قلوبهم به آنها خبر بده اون که در دلشون هست چون خدا از دل میدونست. خدا از درون میدانست می, می ترسیدن منافقین که سوره نازل بشه کیفیت درونی مارا بگه و بعد بعضی وقتا مسخره می الله اللہ می فرمان قلس او بگو بیانان مسخره کنید ان الله مُخْرِجُمْ ما تَحْدَرُونَ همان خدا تعالی ظاهر می اون چیزی که شما می ترسید از چیزی که بیم دارید از چیزی که احساس خطر دارید یه روزی می رسد خدا آیه نازل میکند تمام حرف های دل شما را الله به پیغمبرش میگه یه روزی دیگه بعضی از منافقین بودند که با هم نشسته بودند و با هم حرف میزدند صحبت میکردند دو تا منافق همین جا بر علیه رسول الله صحبت میکرد و سومی همیطور گوش میکرد آن حضرت از کنارشون رد شد پوسخند کردن از پشت سر گفتند، ایشون میخواهد که غلعه های کاخای ایران و روم را میخواهد فتح بکنه چقدر بلند پروازی داره گفتند و خندیدند که این اینجا در مدینه هست و اینجا جایی نداره این خواب ایران را میبینه خواب روم را میبینه خواب عبر ها را میبینه الله عزوجل از طریق واحی به پیغمبرش خبر داد که ای پیغمبر اینها چنین مسخری به شما میکند رسول الله صلی علیه و سلم فوراً اینها را احزار کرد وقتی که احزار کرد دیگه نتونستند بگند که خلافه چون خداوند واحی فرستاد پیغمبر خودش گفت یا رسول الله ما شوخی کردیم. ما با هم خوشگپی می کردیم شوخی می کردیم همینطور ب شوخی بود. الله تعالق قبلا در بار و و مسخرششون فرمود و اینجا فرماید ولا این اگر شما از اینها سوال کنید لا قولون نگوند ان ما كنا نخذ ونلعب. ما بودیم باوارد این بحث شدیم ولی بازی می کردیم شوخی می کردیم. الله عز و جل ناراضی هست از این شوخی اگر شوخی اینه کم برای شما حلاکت قل اب اللہ و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون آیا نسبت بخدا و آیات خدا و رسول خدا شما مسخره میکنید شوخی حدی داره شوخی جائی داره ایا شوخی با مقدسات آیا شوخی با شعائر دینی شوخی با رسول خدا صلی الله علیه و وسلم این نو شوخی ها عزیزان کسانی که میکنن میگوین ما در دل چیزی نداریم اینا غلط میگویند اینا در دل نفاق دارند امروز هم هستن بعضی ها مسخره میکنند بعضی ها کلیپ درست میکنند، و مسخره می کنند. هدفشون اینه مردم را بخندانند چی را مسخره میکنند؟ بعضی شعائر دینی را مسخره میکنند. مثلا آیات قرآن را به صورت تمسخرامیز می خاند را مسخره می کند. نماز را مسخره می کند. ریش را مسخره می اینها اینها شما میدونید که همه علائم مذهبی هستند نماز علامت دینداری هست، اذان شعار مسلمانان است، اذان در اسلام است در هیچ جای دیگه نیست، نماز در دین ما هست، ریش سنت رسول الله صلی الله علیه و هست، حجاب دستور قرآن هست لذا این هر کسانی که فیلم درست میکنه یا همین طور برای مردم جک میکنند، می و مسخره میکنند، و جک درست میکنند، این علامت نفاق است چرا یک چیزی که من اهمیتش در دلم باشد هیچ وقت مسخرش نمی کنم هیچ وقت برایش جک درست نمی کنم اب الله و, و آیاته و رسوله آیا نسبت به خدا نسبت به آیات خدا نسبت به رسول خدا و نسبت به شعائر دینی انسان بیاد مسخره بکند؟ این خوهران مؤمنه را که حجاب دارند بعضی ها چه نامهایی برایشون براشون درست کردند چه تمسخوراتی می کنند زن مدرن زن پیشرفته زن بروز از نظر اونها اونه که بلا نسبت بیشتر زینت و زیبایی خودش را به نمایش بذاره بیشتر جلوی مردان ظاهر بشه حیاش کمتر بشه این زن زن بروز هست و اونی که حیا داره، اونی که خودش را مخفی میکنه، این را میگند، این مورد تمسخره. و چه عنوان هایی برایش درست کردند؟ لذا اینها، این مسخرها مال منافقین است. و کسانی که اینو تمسخورها را میکنند، اینها درواقع بوی از نفاق دارند. اهمیت قرآن اهمیت دین اهمیت شعائر دینی و علائم دینی در دلشون نیست در وجودشون نیست که اینها این طور درست می کنن لذا باید اگر کسی نمی‌داند هم بداند که هر شوخی جایی دارد شوخی با دین خدا که نیست لذا الله فرماید قل اب الله و آیاته و رسوله خیلی چیزها هستند که شوخی اونجا معنا نداره در مسائل دینی مثلا کسی زن شرا بشوخی طلاق میده مگه میشه بگه نه من شوخی کردم نه شوخی این شوخی این هم جد است سلاسن جده الن جد و هزله الن جد پیغمبر میفرمای سه چیز هستن که جدی بگی هم جدی حساب میشه که شوخی بگی هم جدی حساب میشه یکی از اونها طلاق است بشوخی میگه میشه بشوخی با چینی چیزی شوخی کرد شوخی شوخی به او گفت که تو طلاق شد طلاق شد دیگر رفت از دستش و خیلی از شوخی ها هستند فقها نوشتند که کفر هستند اینها فان الهازل بالکفر کفرن لا خلاف فیهم من الامم خیلی از شوخی ها هستند که اینها کفر هستن هیچ یکی از از امت من الامه هیچ یکی از علماء امت این بحث نداره تو این اختلاف نداره که هر کسی بشوخی کفر بکند اون کفر میشه درست میگن نقل کفر کفر نباشد یعنی کافر یه چیزی گفته شما میخواید برای فهموندن بقیه اون کلمهش را تکرار بکنید تو دلت نیست این کفر نیست ولی اگر بشوخی کفر کند کسی کفر دیگه بنابراین این الله عز و جل می فرماید که اینها در واقع مسخره به آیات اللہ می کنند مسخره می کنند به رسول خدا مسخره می کنند به دین اینها این مسخره در واقع استهزائی هست این شوخی نیست لا تعتذیرو قد کفرتم بعد ایمانكم. الله به همین منافقین می شما اذر خواهی نکنید معذرت خوای نکنید شما بعد از اینکه ایمان ظاهر کردی بوده اند کفر کردی با این شوخیتون شما میگی ما شوخی میکنیم رسول الله را تماس خور میکنیم میگی من شوخی دارم الناف عن طائفة منكم الله میفرماید اگر یک گروهی را ما معاف کنیم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین یک گروهی دیگر را ما ازاب میدیم به سبب اینکه اینها مجرم هستند بنده از کردم این سه نفر که داشتند مسخره می کردند یکی فقط گوش کننده بود گوش می کرد اسمش بود مخاش مخاشن بن حمیر مخاشن بن حمیر این وقتی که دید سبحان الله الله عزوجل چطور از شوخیها و از اسرار ما که ما با هم مخفیانه پچ پچ می کردیم به پیغمبر خودش خبر میده این ترسید و بعد از اون گفت یا رسول الله من تا به حال اشتباه کردم من از این به بعد ایمان میآورم اسمش را عوض کرد اسمش را عبدالعبدالرحمن گذاشت قبلا اسمش مخاشن بود بعد از اون اسمش عبدالرحمن بود مؤمن شد مخلص شد انعف عن طائفه منكم اشاره به همین است که اگر یک بخشی را ما معاف کنیم چون توفیق توبه می بعضی هم متوجه میشن که هر پیچ ما را خدا می گیره هر اشکال ما را خداوند یاداوری می میکنه. لذا توبه میکنه کنن می ترسن دیگه طبیعی هست اما بعضی که کفر تمام قلبشون را سیاه کرده اونا هیچ پروان ندارن نعذب طائفتن گروه دیگری را ما عذاب می دیم بی انہم کانو مجرمین بسبب اینکه اینها مجرم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ببینید در این آیه شریفه خداوند صفات منافقین را بیان می فرماید. خیلی آهستن آه از طلاب عزیز که گاهی می پرسند چند روز پیش همی کی پرسید امروز منافقی اعتقادی هم هست مرافق عملی که زیاده متاسفانه همه ما به نوعی کم و بیش مرتکب هستیم چون رسول الله صلی علیه و سلم فرمود که علامت نفاق ستا هست وقتی که انسان حرف میزنه دروغ میگه ازا حد ازا وقتی که وعده میکنه وعده خلافی میکنه و ازا وعده اخلفه وقتی که به اون انسان اطمینان میکنی را و رازی را بهش میگی خیانت میکنه و اذا تو خانه وقتی که امین تو قرار میگیرد خیانت به تو میکند. راز تو را میگه میره افشا میکنه میره به ملت میگه میره به دولت میگه این منافقی دیگه ولی این نفاق نفاق عملی هست نفاق اعتقادی این هست که انسان در دل ایمان نداره به ظاهر خودش را مؤمن میگه. می پرسند که بعضی که امروز این منافق نیست امروز هم هست تنها عبد الله بن ابی نیست شما صفات را ببینید آیا این صفات در دنیای امروز دیده میشه من عرض میکنم خدمت شما آیا را اول ترجمه میکنم؟ الله میفرماد ال منافقون و المنافقات مردان منافق و زنان منافق بعضهم من بعد بعضی از بعضی هستند یعنی این از هم دیگه هستند از جنسی هم دیگه هستند مثل هماند یأمرون بالمنکر انها امر میکنند منکر امر میکنند وینهون عن المعروف و از معروفات بعض میدارند یعنی منکرات را شرک را کفر را غیر شرک کفر فحشار بی حیائی را بی بندباری را انها تشویق میکنند یا یعمرون بالمنکر بمنکرات تشویق میکنند و ینهون عن المعروف و از معروفات انسان ها باز میدارند دارند معروفات را نماز را دین را مسخره میکنند و یقبضون عیدیه هم و یک صفت سفومشان صف بخلست دستشون را قبض کردن یعنی محکم نگاه داشتن دستشون باز نمیشه. دست دهنده ندارند جود و بخشش ندارند بقیلند و دیگه صفت چهرومیشان الله، الله را فراموش کرده، این همه بدبختی بخاطر خدا فراموشی است. فنسی هم خدا مونا فراموش میکنه خدا مونا فراموش میکنه یعنی چه؟ یعنی خدا ترکشون میکنه خدا هم به حال خود انها را وامی گزارد اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هم الْفَاسِقُونَ همانا منافقان اینها هستن فاسقان حال ببینید چطور منافق امر به منکر میکنه و نهی از معروف میکنه یعنی کارهای خوب را نمیگذارد اول شما مطالعه بکنید حکام بلاد اسلامی را حاکمان و کسانی که در رأس کشورهای اسلامی هستند اکثرا من میگم بعضی ها را کار ندارم قوانینی که قوانینی که اینها واضح کردن تو کشورای خودشون قانون به نام کشور به نام اسلامی هست کشور مسلمان فلان کشور میگه نوید درصدش مسلمانه نوید پنج درصدش مسلمانه اما قوانینش در اون کشور تعلیم دین آزاد نیست تبلیغ آزاد نیست نماز آزاد نیست فعالیت جوانان آزاد نیست اما شراب آزاده بی آزاده فحشا آزاده تمام مفاسد آزاد هست اینها ببینید آیا یامرون بالمنکر و ینهون عن الماروف یا نیست علما بزندانند اما زنهای رقاصه آزادند علما نمیتونه یک جای محفل صد نفری تشکیل بده مردم را موایزه بکنند اگر این کار را بکنند جایشون زندان هست اما زنهای رقاصه شب با هزار نفر بلا نسبت محفل دارند و جلسه دارند آیا این حاکمی که این موقعیت فراهم آورده امر به معروف و نهی از منکر داره میکنه یا نهی از منکر و امر به معروف ببخشید امر به منکر و نای از معروف این داره منکرات را ترویج میده، این داره فساد را حجاب تو اون کشور ممنوع است بی حجابی افتخار و هنر است این چه حاکمی هست در داخل دانشگاه اگر با حجاب بری همه مسخره می کنند چنان ایجاد شده همون مردم مگر بوی از اسلام دارند که زن محجبه را مسخره میکنند، ولی زنی که بلا نسبت به یک شکل فجیع باشد این زن زن روز است زن پیشرفته هست مگر نفاق از کنم که چی دارد همین نفاق یعنی اینها اعتقادشونین هر وقتی که اسلام گرا ها مذهبیون در این کشور مثلا رای بیشتر را داره اینا ناراحت میشن می اینا نظام اسلامی را حاکم میکنن نظام اسلامی چرا نظام اسلامی واشاعت داری چون منافق است چون دوس ندارد انجا حجاب حاکم بشه دوس ندارد فرمان قرآن حاکم بشه لذا نفاق را هر انسانی خودش میتونه بشناسه این در بود بالا بنده از کردم در بود پایینتر تر کسانی که در فضاہ مجازی امروز فعالیت دارن یک گروه از جوانان با ایمان هستند که اینها همیش بلاخره سخنرانی موعزی سرود اسلامی قرآنی پندی نصیحتی را پخش می کنند. و یک گروهی هستند که فقط به را پخش می کنند. بی بند را تبلیغ می کند یا مرونه همینه. بی بند را تبلیغ می کند آقا می فروشگاه خودش را لباس خودش را بفروش برساند ده تا زن بی حیا و بی حجاب را میاره فیلم می گیره اکس میگیره تا مردم خوب نگاه بکنند پارچه بگیرند این پول برای تو چه ارزشی دارد که تو به قیمت اشاعی فحشا و اشاعی منکر می لباس لباست را جنس را بفروشی این پول برای تو زهری می شه این پول برای بلائی خان سوزی میشه کسی کی میخواد پول در بیاره و میخواد از طریق منکر و اشاعی منکر پول در بیاره حسابش مشخصه لذا این جوانان پسر و دختر انہی که در این فضاهای مجازی تو این لایوها تو ان استاگرام تو تلگرام تو بقیه موارد فضاها اینا سعی میکنند که بین به اسطلاح آزادی آزادی امروز یعنی فساد آزادی امروز یعنی بداخلاقی آزادی امروز یعنی بیبندوباری اینای ای که سعی کنند که میگه زن باید آزاد بشه میگه تن من مال من یک شواری بیشتر تو پاکستان هست میگه جسم من مال من تن من مال من به تو چی من هر کاری می با این جسمم نه خیر این مال تو نیست این امانت خداست مال منم نیست ولی اینا خدا به تو امانت داده و خدا به تو دستور داده که چیکار بکنی چطور جت تو اختیار در اختیار نداری شما در اختیار رب هستید رب خالق شماست رب مالک شماست تن شما جسم شما و تمام وجود شما مال الله و در اختیار الله است الله هر دستوری داده اون را صادر کن اون را اجرا کن نه اینکه هر دستوری که نفست میده این نفس بیچاره تو را به جهنم میبره این نفس و این هوای نفس بعضی میگه باشه باشه من به جهنم برم خب ای ایمان نداره من نفاق چیه نفاق همینه کسی که اعتقاد نداره کسی که باور نداره دیگه چیکار میشه برایش کرد این همینه که قرآن بیش بی. میگه یا امرون بالمنکر و ینهون عن المعروف لیسا عزیزان انهایی که نفاق اعتقادی دارند هم فراوان هستند هم درمیان عموم مردم هم درمیان از کنم که اون افراد سطح بالا کسانی که قوانین در دستشون هست و قوانین را توری برنامه ریزی میکنند که اونجا نماز خواندن قاچاغه نماز خاندن قاچاق جوان اجازه نداره به مسجد بره و مردم اگر نماز خانه درست میکنند با ترس و وحشت میان نماز میخونند اما بقیه منکرات آزاده بقیه فحاش خانه ها بلا نسبت آزاده آزاده لذا این حاکم مسلمان نیست این منافقه اللہ میفرماید یعمرون بالمنکر وینهون عن المعروف اینها امر رو به منکر منافقان و از معروف میکنن معروفات را جلوی معروفات را میگیرن و یک بیرون ایدیا هم اینها دس های خودشون را باز نمیکنن نسل الله فنسيهم انها الله را فراموش کردند الله را ترک کردند فناسیا الله اینها را هم ترک کرده الله نار به خود گذاشته. اینال منافقین هم الفاسقون همانا اینو منافقان، اینها فاسقان هستن. یعنی اینها از حد و حدود شریعت و فرمان خدا خارج شده. این دیگه مهم نیست. این بوی از ایمان نداره. خب تکلیف این منافق چیه؟ عاقبت این منافق چیه؟ الله نجات بده؟ اللہ می فرمائے وعد اللہ المنافقین والمنافقات اللہ وعد کرده وعد اللہ حق است ان اللہ لا یخلف المیعات چیزی که خدا وعد بکنه خلف وعد نمیشه اللہ وعد کرد با مردان منافق و زنان منافق معلوم میشه که زن در نفاق هم دست کمی نداره زن در اشاعی فحشا و منکر دست کمی از مرد نداره و چه بسا دستش طولانی تر است تأثیرش بیشتره چون زن بیشتر میتونه جذب بکنه کسانی را که دنبال منکر هستن الله این فرماید ببینی اینها را خداوند در زمره کفار قرار میده چی از کنم که وعیدی از این سختتر میتونه باشه وعد الله المنافقین والمنافقات اللہ وعده فرموده مردان منافقرا و وزنان منافقرا را والکفار را و کفار را علنی کفر می کنند همین را وعده کرده نار جهنم آتش جهنم را خالدین فیها همیشه در اون آتش جهنم میمانند مانند ماندگار ان ایمان ندارند کی انها برخلاف اسلام دارن کار می کنند هیا حسبهم همین جهنم کافیه را دیگه هیچ چی نباشه دیگه هیچ عذاب و شکنجی نباشه جهنم کفایت میکنه وَلَعَنَهُمُ الله سبحان الله، این کلمات واغین جای تفکر دارد جای تدبر دارد خدای عز و جل چقدر ناراضی هست بر این نوبندگان کہ خدا انبیاء را میفرسته در زمین اصلاح بکنند اینها در زمین فساد میکنند و لعنه هم الله الله انها را لعنت کرد، الله انها را نفرین کرد. یعنی از رحمت خودش دور نجاد داشته و لهم عذاب مقیم برای اینها عذاب دائم است. همیشه میسوزند، همیشه در اون عذاب گرفتارند اند. الله تالا همه هدایت کند، هنایی که قابل هدایت استند. اونا را اللہ هدایت کند، اونایی که قابل هدایت نیستند دستشون را کتاب بکند تا زنان و مردان مسلمان را فریب ندهند و بفساد نکشند اللہ تعالی می فرماید نمونای اینا در گزشته بوده کفاری که در گذشته خدا حلاکشون کرد زندگی اونها را بخانید تاریخ اونها را بخانید اگر در تاریخ نمیتونید بخانید در قرآن بخانید خود قرآن برای شما تعریف میکنه اللہ میفرمائی کاللوین من قبلکم مثل آنانی که قبل از شما بودند کانوهم هم اشد کانو اشد منکم قوه انها شدیدتر بودند قویتر بودند از شما انها از شما زیفتر نبودند امتهای پیشین شما از کنم که قدرتی ندارید، اونها را با دست می‌تراجیدند. کانو اشتد منکم قوّا قوت آنها نیروی جسمی اونها از شما بیشتر بود و اکثر اموالا او و اولادا او مالشان هم از شما بیشتر بود، اولادشان هم از شما بیشتر بود. اونها همه چیز داشتند، کمبودی نداشتند. و بعد در این دنیا هم کوتاهی نکردن در این دنیا هر عیش و نوشی که توانستن انجام دادن ببین این منافقین هم چند روزی در عیش و نوشند عرض کنم که بلا نسبت مست و خمارند در همون لح و لعیب خودشون چند روزی می گزارانند. اصلا حرف متوجه هم نمیشوند و اگر کسی باشون حرف بزنه مسخره هم میکنند چنان پرده عقل اونها را چکار کرده پوشانده اللہ تعالیٰ می فرماید اون گذشتگان را نگاہ کنید اونها چند روزی خوش گزراندند لذت زندگی را بردند ایشو نوش کردند خوش گذرانی کردند فساد و فحشا کردند شما هم چند روزی تون رسامی هرچی سامی از این زندگی و از خوشی زندگی داشته باشد می الله اللہ می فرماید اونهایی که اشد منکم قوه و اکثر اموالا و اولادا قدرت اونها از شما بیشتر بود مال و اولاد اونها از شما بیشتر بود فستم تعو بخلاقهم آنها بحره گرفتن از سهم خودشون سهم خودشون را در دنیا خوب بهره گرفتن هیچ کمی در ایش و نوش نگذاشتن یکی از حکام هندوستان که میگه که اکبر بکوشی یعنی در لذت و در خوشی تلاش کن و هیچ کوتاهی نکن که این دنیا نمی ماند یعنی دنیا زود میره تا روزی که هستی هرچی میتونی لذت حاصل بکن این کسی این را میگه که اعتقاد به آخرت نداره این منافقین هم اعتقاد به آخرت ندارن اینها میگن در دنیا باید هیچ کمبودی از نظر لذت و شهوت و شکم و شکم پرستی داشته نباشیم. فاستمتعوا بخلاقهم وناب سهم خودشون را بهره گرفتند از ایش نوش فاستمتعتم بخلاقكم ای منافقین شما هم به سهم خودتون را خوب بهره گرفتید این کسانی که منذ ذکر کردم اهل نفاق هستند و در رأس حکومت ها قوانین ضد دین را و قوانینی که در جهت منکر حسواز می کنند همین حکام اینا واقعا زندگیشون را انسان نگاه میکنه کنه زندگیشون گاهی درز می تو این فضاهای مجازی چه زندگی خوشگذرانی اینها دارن شب و روز های اینها با های عریان هست با انواع زنها هست انواع مشروبات هست انواع لذات زندگی هست الله تعالی می فرماید فاستمتعتم بخلاقکم شما هم بهره گرفتید از سهم خودتون سهم شما زندگی همین ایشنووش است اما الله می فرماید کما استمتع الذين من قبلکم بخلاقهم همان گونی که بهره گرفتن کسانی که قبل از شما بودن به سهم خودشون اونها هم بهره گرفتن شما هم بهره گرفتید و کل كالذي خاضوا و شما وارد شدید در شبهات باطل در مسائل دینی و مسائل دینی را مورد تمسخر و قرار دادید كالذي خاضوا مثل انها که آنها هم چیکار کردند وارد همون گاوت شدند وارد این مباحث شدند الله تعالی می فرماید این افرادی که این طور اعتقاد ندارند دین را مسخره کنند فساد و فحشاء و لذت حر شای می کنند عیش گزاری و نفس پرستی و هوا پرستی را ترویج می دهند الله می فرماید اولائک حبطت اعمالهم فی الدنيا والآخرة این افراد این گروه کسانی هستن که اعمال انها اعمال صالح انها برباد شده در دنیا و در آخرت نه در دنیا انها عمل برائش و میمانه در آخرت و اولئیک هم الخاسرون این انسانها زیانکارند این انسانها خساره دنیا و آخرت را انها میبینند ببینید ما خاندیم که الله عز وجل فرمود که مثل پیشینیان مثل اقوام گذشته اونها هم در زندگی بهره گرفتند اونها هم در زندگی ایشنووش داشتند حال چند تا از اون اقوام را خدا معرفی میکنه اون اقوام گذشته کیا بودند الله می فرماید الم یاتهم نبؤ الذین من قبلهم آیا پیش پیشینها اخبار کسانی که قبل از اینها بودند اون اخبار نگذشت یعنی اخباری کی قوم نوح و عاد و ثمود قوم نوح قوم عاد قوم ثمود و قوم ابراهیم قوم ابراهیم و اصحاب مدین هر یکی از اینها یک بدبختی داشتند یکی از اینها شرک که همه داشتند علاوه از شرک بعضی راهزن بودند دزد بودند بعضی یا کلاهبردار بودند مثل اصحاب مدین در بازار سر مردم کلاه میگذاشتند جنس کم به جای جنس زیاد دادند بعضی ها هم جنس باز و هم جنس گرا و شهوتران بودند تمام مریضی هایی که مردم امروز دنیا دارند اینها داشتند ما تفسیلا هم در سوره هود خواندیم هم در سوره اعراف خواندیم الله می فرماید قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و أصحاب مدينا و المؤتIFICات همچین قوم ابراهیم اصحاب مدينا قوم شعيب و المؤتIFICات مؤتIFICات يعني رسته سر سرنگون شده رسته سر سرنگون شده کدوم رسته قوم لوث الله تعالی اونها را سرنگون کرد به سبب هم جنس بازی امروز دنیای بظاہر پیشرفته و مددین امروز میگه که گرایی را باید به عنوان یک قانون قبول کنیم در انگلیس پاس شده در بعضی از کشورای این قانون پاس شده که مرد بتونه با مرد ازدواج کنه زن بتونه با زن ازدواج کنه مرد بتونه بلا نسبت استفاده جنسی از مرد بکنه اینها را میخواد در ارز کنم که بعضی کشورها در قانون پاس کنند دیگه این بد نباشه هر دو تا مرد برم با هم زندگی کنند بلا نسبت قبلا بنده ارز کردم که حتی حیوانات این طور نیستند حتی حیوانات شما دیگه بعضی ها حیوانات اهلی داشتید حیوان نر وقتی میره به طرف حیوان تازه وارد به طرفش میره بو میکنه احساس میکنه نره اون رویل میکنه ترکش میکنه دور میشه ازش حیوان چینین تمایلی ندارد ولی انسان از حیوان بدتر شده که انسان به سمت هم جنس خودش تمایل داره الله می فرماید والمؤتفقات های چپه شده های سر نوگون شده اینا رو خداوند اصلاً روستاشون را از از بیخ و بن برکند برد به آسمان از آسمان جبرائیل امین زد امروز هر کسی دوست داره بره بحر میت بحر میت بین حجاز و بین شام دریای مرده یا بحر لوت هم میگویند میگویند که 400 متر فقط عمق این دریاست و یک آب سیاه متعفن از اون زمان خدا میدونه الان 5000 سال یا 6000 سال از اون زمان گذشته اینها قبل از ابراهیم علیه و السلام بودند هنوز هست این آثارش ما مفتی محمد تقی حفظه الله می فرماید ما, ما رفتیم اونجا که بری میبینی سنگ با بقیه سنگ ها فرق میکنه که اونها را خدا سنگ باران کرد لذا الله می فرماید اتتهم رسلهم بالبينات پیامبران پیش اونها با دلائل و با معجزات آمدند ولی انها قبول نکردن خدا اشد مجازات گرفتارشون کرد و اللہ می فرماید خدا بر اونها ظلم نکرد خودشون بر خود ظلم کرد لذا امروز اگر برای کسانی عذاب میاد خدا ظلم نمی خودشون با این بیبند دوباری دارن بر خود ظلم میکنند الله می, می فرماید فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ الله نیست که بر آنها ظلم میکند ولكن کانو انفسهم يظلمون، اما انها بودن که برخودشان ظلم میکردند، کردن برخود ستم میکردند. کردن والمؤمنون والمؤمنات تا اینجا صفات منافقین بود اما صفات مؤمن را هم الله تعالی یادآوری می که اگر کسی خاص مؤمن واقعی بشه مؤمن حقیقی بشه این صفات را در وجود خودش احیامی کند الله می Holy сдел pir pir pir pir pir pir pir pir pir pir دوسته بعضی دوست هستند. یعنی pir یعنی مردان مؤمن با مردان مؤمن دوست باشند. زنان مؤمن با زنان مؤمن دوست باشند. pir pir با یک مرد مؤمن با مرد pir دوست باشه. یا زن مؤمن امروزه خیلی تو این فضاهای مجازی دنبال دوستیابی هستند الان اون که جنس مخالف با جنس مخالف دوست میشه اون یک عذاب دیگه هست اما همین که یک مرد با یک مرد غیر مسلمان دوست میشه و بعضی از این جوان ها این رام یادآوری بکنم بعضی از این جوانها ها یک سری بازیهایی هست بازیهای مجازی که با هم دو نفر بازی میکنن یکی تو این کشوری که تو یک کشوری دیگه هست فرض میکنین تو روسیه هست مسکو هست کمونیست این دو تا با هم دوست شدند هر شب بازی میکنند این درست نیست بالاخره اولا بازی له ولا هست اون بادش من امروز حرف نمیزنم اما اینکه انسان با یک غیر مسلمان دوست بشه و بعدا چنان دوست میشه که کم کم از او اثر می گیرد بعضی افراد را که دوست داشته باشید سعی میکنید مثل اونها باشید یک بچهی بچه‌ای کوچیک که شما نگاه کنید پدرش را که خیلی دوست دارد گاهی ادای پدر در میاره همون کلاه پدر را به سر میگذارد مثل پدر راه میره کفش پدر را به پا کند و میگه من دوست دارم چون که اون محبت پدر به دلش هست میخواد مثل اون پدر باشد لذا این جوان وقتی که یکی را دوست می‌دارد، همون به اصطلاح مدلش را هم میپسند، موش را به همون شکل در میاره، لباسش را به همون شکل در میاره، خیلی از جوانهای مسلمان هستند و خیلی از زنهای مسلمان هستند که مدلی اختیار میکنه مثل مدل زنهای هندی مثل مدل زنهای بازیگر اروپایی لباس نو پوشش نوع از کنم بستن موها نوع آرائش بلا نسبت این در واقع تأثیر دوستی هست و چه افتخاری میکنم بعضی ها بعضی این تجار ما میرن به کشورهای بالاخره تجارت میکنم بیشتر رفت آمد به چین هست به بعضی کشورهای دیگه هست خب اونجا هستن غیر مسلمان ها به ما اجازه داریم داد و ستت بکنیم معامله بکنیم اما چنان دوستی و محبتی که با هم دیگر بعضی ها ما میبینن میشنون بعضی تعریف میکنن رفت و آمد خانوادگی اون حریم زن و بچه یک حریم خاصی هست اونجا نباید هر کسی بتونه وارد بشه به خصوص غیر مسلمان این زن و بچه ما هم ضعیف هستند از اونها رنگ برمی‌دارند از اونها اثر میدارند. شما ببینی همین نوع افرادی که با مسجد فاصله دارند متاسفانه با اماکن دینی و با رجال دینی هم فاصله دارن گای خونه میره مییره خونشون پر از یک سری نمادهای است مجسمه یک نبات عجیبیه این نمادها مال کفار است چیز هایی است که کفار به احترام قائل هستند مسلمان ندونسته اینها رو میاره تو خونهش فکر میکنه یک مدلی هست فکر میکنه این یک کلاسی هست غافل از این که کم کم از نظر دینی داره شاعری اونها رو احیامی کنه حتی بعضی ها اسم بچه هایشون رو به همون نام ها می لذا اینها اثرات دوستی های بد هستند یک مرد مومن دوست باشد با یک مرد مومن دیگر اون که از من تر است از من با تر است از من با تر است از من با توفیق تر است با اون دوست بشم تا اینکه از او رنگ بردارم تا اینکه از او متاثر بشم زن مسلمان همچنین یک زن مسلمان با یک زن مسلمان مؤمنه دوست بشه با یک زن پرهیزگار دوست بشه با یک زن با تقوا دوست بشه با یک زن عالمه و ای که دارای عمل هست دوست بشه لذا الله می فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض بعضی‌ها دوستند بعضی هست یعنی رفیق دینی هم هستند و در کارهای دینی هم دیگر را کمک می‌کنند چطور یامرون بالمعروف و ینهون المنکر امر به معروف می‌کنند نهی از منکر می‌کنند یکی بل خدا بهش زبان داده یکی دیگه خدا بهش ماشین داده یکی دیگه خدا بهش مال داده اینا را کنار هم می‌گزارند امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند لذا الله عز وجل می‌فرمازد علامت مؤمن اینه که امر به معروف کن نهی از منکر کن و نه تنها مردم را میگویند شما این کار بکنید خودشون هم عمل میکنند و یوقیمون الصلاة ویئتون الزکات نماز را برپا میکنند زکات را پرداخت میکنند ویطیعون الله و رسوله و در تمام اوامر در تمام دستورات الله را اطاعت میکنند رسول الله را اطاعت میکنند. یعنی نسب العین زندگی اونها احکام خدا سنت های رسول الله صلی الله علیه و وسلم مردم مسخری ایشو میکنن ولی دیدید اینهایی که در مسیر امر به معروف و نهی از منکر میرا اینقدر حریص میشن بر احیای سنت چیزهای غیر از مأم الله میپرسن که ما بلد نیستیم مثلا میگه روش مسواک زدن چی ہے روش سرمه کردن چیه روش ناخن گرفتن چیه چیزهای ریز یعنی اینقدر حریص هستن میخوان در هر چیزی سنت را رعایت بکنند این هست این برکت امر به معروف و نهی از منکر است که یتیعون الله و رسوله اطاعت خدا میکنن و اطاعته رسول میکنن قدم به قدم مو به مو لذا اجرا میکنن سنت ها را احکام خدا را این های ها که این اینطوری باشن دارندگان این صفات خوب گوش کنید به این صفات متصف بشیم الله می فرماید اولائک سیرحهم الله این وعده اول است این گروه کسانی هستند که الله بر اینها ترحم میکند اینها واقعا دوست خدا خدا اینها بر اینها رحم میکند که شما دنبال احکام من هستید شما دنبال سنت های حبیب من هستید پس رحمت خدا بر اینا الله. اونجا شما خاندی اون گروه را و الله اللہ نا خدا اونها را لعنت کرد نفرین کرد اونهایی که امر به منکر می کنند و نایی از معروف می کنند اما اینهایی که در مسیر خدا حرکت میکنند، میخوان دین خدا به همگان برسه تنها خودشون دیندار نباشن دیگران هم دیندار باشن تنها خودشون ناجی نباشن دیگران هم نجات بیا بند اینها که اینقدر بر خلق خدا رحم دارن خدا بر اینها رحم میکند اولئیکס ایرحمه الله، این گروه استن حتما حتما بر انها الله رحم میکند این سین سین تقریب نیست سین تاکید است حتما بر انها الله رحم میکند ان الله عزيز حكيم بدون شک الله عز هم غالب است و هم کارهای الله با حکمت است خب اینها که خدا بر اینها رحم میکند تفسیر اون رحم چیه توضیح اون رحم چیه تشریح اون رحم چیه الله تعالی خودش تفسیر کرده و تشریح فرموده الله فرمد وعد الله المؤمنین والمؤمنات این و را این نو مردان مؤمن را وزن های مؤمن را این های که امر بمعروف و نایز منکر می کنن این های که با اهل ایمان دوست دارند جنات تجری من تحت ها الانهار این را اللہ واده فرموده در اون جن به اون جناتی بی اون باغاتی که تجری من تحت زیر ها الانهار جاری هست ازیر درخت های اونها نهر ازیر از کاخا و قصر اونا نار ها و جوی بر ها جاری هست خالدین فیها برای یک روز و دروز یک سال و دو سال نیستند خالدین نفیها همیشه اونجا ماندگار هستند و مساکن طیبه فی جنات عدن اللہ عز و جل برای انها مساکن و کاخا و ویلاهای بسیار زیبایی آماده فرموده در جنات جاودانه سبحان اللہ چه کاخایی که اون کاخا الان اگر قرآن میگفت برداشت بنده اینه که خدای عز و جل بعضی از مسائل را سرپوش گذاشته چون این عقل کوچی که من نمیتونه بفهمه گرسی بعضی جا فرموده که در احادیث آمده از طلاع و از نغره و خاک اونجا از, از کنم لؤلؤ و مرجان و یاقوت همیش خوشبو، همیش عطر، همیش زیبایی، همیش درخشندگی، همیش از کنم که خوبی ها ولی خب همونطور که در حدیث آمده نه چشم دیده تا باها، نه گوش شنیده و نه هیچ قلبی تصور و فکری اونها را کرده لذا این جنت جسمانی هست این جنت مادی هست خدمت شما ارزگونم اما جنت روحانی این بزرگترین جنت هست نصیب، اون انسانی هست اون ای هست که بعد از سالها تلاش پیش خدا میره خدا میگه ای بنده من از تو راضی خدا از انسان اگر راضی باشد بنده دیگه چی میخواد؟ اللہ می فرمائید و من اللہ اکبر رضایتی که از جانب اللہ اعلام بشه اکبر این از همی نعمتها بزرگ است اللہ از همی منشم راضی باشد حضرت شیخ مولانا حسین علی رحمه اللہ کے استاد الاستاد ما هستند حضرت استاد می همیشه ہمیشه ایشون تک کلامش بود اللہ راضی بات هر حرفی میخواست بزنید قبل از اون میگفت اللہ راضی باشه این مسئله چنین هست الله راضی باشه مسئله چنان هست تکیه کلامش بود که هر جملی میگفت این دعا را میکرد خود راضی باشه. تا وقتی که یک جای حرکت میکرد الله تو راضی باش مینیشست میگو الله تو راضی باش لذا بعضی بندگان هستن فقط میگن رضایت مولا حاصل بشه ما هم سی بکنیم الله راضی باشه. الله راضی میشه در صورتی که ما دستورات الله را اجرا کنیم لذا الله می فرمایید واردوان من الله اکبر. اون رضوانی اون رضایتی که از جانب الله باشد اکبر اون بزرگتر است از اون جنت و از اون کاخ و قصر اون خیلی بزرگتر است. اون چنان سروری انسان دست میده چنان به انسان دست میده که اون قابل وصف و قابل بیان نیست ذالک هو الفوز العظیم این هست فقط این کامیابی بزرگ کسی میخواد کامیاب بشه رب را مولا را راضی بکنه. خب اینجا تا اینجا هم صفات منافقین را مخاندیم و هم صفات مؤمنین را و هم پاداش منافقین جزائی اونها و هم پاداش مومنین را بعد از این خدای تعالی ترغیب بسوی جهاد میده یا ایوها النبی ای نبی من جاہد الکفار والمنافقین با کفار جهاد کن و با منافقین جهاد کن بعضی میگن منافقین با زبان باشون جهاد کن که رسول الله با شمشیر جهاد نمی کرد ولی شیخ میفرماید این تنها منافقین مدینه نیستن بیرون مدینه منافقین گاهی با مشرکین همراه بودند، تو سفه آنها بودند. چند روز اینجا آمده بودند پیش رسول الله، اما وقت می رفتند بیرون، موقعیت را می دیدن که بنفی کفار است، در صفوف کفار است، بودند با آنها فرمود که جهاد بکن وقتی در صف کفار استم بزن آنها را. جاهد الكفار والمنافقین منافقين وغلظ عليهم، وغلظ عليهم. یعنی با شدت برخورد کن ببینید این غلظت و شدت در امر دین هست ببینید با اون آیه در تزاد نیست آیه دیگه هست که الله تعالی به پیغمبرش میگه فبما رحمت من الله لنت لو ام به سبب از جانب خدا تو نرم هستی و لو كنت فظا غلیظ القلب لن فض من حولک اگر شما تند خوب بودی و سخت دل بودی همه اینا متفرق میشنن ولی تو آدم مهربان و نرمی هستی خب آیا نرمی خوبه یا سختی خوبه هر دو خوبه هر دو خوبه من اینجا میخوام فرقش را عرض بکنم اینکه ما نرم باشیم هر دعوتگر دین شما علماء شما دعوتگران شما تبلیغیان شما معتمدان و ریشتفیدان شما که خیرخواهی قوم هستید همه شما در باره مسائل شخصی تو نرم باشید کسی به شما بیعتنائی کرد به شما احترام نگذاشت به شما تمسخور کرد به شخص شما پروا نکنید اینجا نرم باشید اینجا دل وسیع داشته باشید برای نفست ناراضین نشو اما برای دین خدا دیگه تحمل نکن وغلوز علیم این شدت در باره دین است این سختی در بار دین هست اگر کسی به من هرچی بگه تحمل کنم شوخی میکنه راستی میگه مسخره میکنه بالاخره اما وقتی به پیغمبرم میگه میگه به مقدساتم میگه به یاران و اصحاب رسولullah میگه اینجا دیگه نباید تحمل کنم این اینجا باید خودم را به آب و آتش بزنم دفاع بکنم کسی در رابطه با شخص ما اگر بحثی داره ما بالاخره نیامدیم که از شخصمون دفاع بکنیم و تقدس گرایی بکنیم اما اگر نسبت به دین ما باشد وغلز علیهم اونجا چیکار کن شدت کن اونجا سختی کن اونجا دیگه هیچ ملاطفتی و هیچ نوع ملایمتی از خود نشان نده لذا الله فرمایت واغلز عليهم برنها سخت باش ومأواهم جهنم جای جهنم هست وبئس و بئس المصیر و بسیار مسیر و جای رجوی هست خب ببینید يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر و بعد اسلامهم وهم بما لم ينالوا این در رابطه با گروهی دیگر از منافقین هست غزوه غزوه تبوک از قبلا خدمت شما ارز کردم در غزوه تبوک بعضی از منافقین همراه بودند این منافقان چنان اذیت می کردن صحابه رسول الله را هر چند نفری با هم یک جا شد به یک صحابی کارو هم بود دیگه از این جا تا دو کیلومتر پشت سری هم بودند یکی را گیر می آوردن و را مسخره می کردن. اشاره ا اون فرد می ترسید اون فرد دلش می و حرف های بسیار بی هم میگفتن. اون جریانی که در اون آیه خواندیم بعضی میگن این آیه هم در اون هست که همون چند نفر یکی جلاس ابن سوید بود و بعضی دیگه بودند از منافقین که گفتن اگر ما در حضوری همون آمر ابن قیس جلاس ودیعه گفت اگر این سخنان را که پیغمبر به ما گفته به ما گفته رجس ناپاک چون رجس و ناپاک فرمودند اگر ما اگر این حرفش حق باشه اگر راست باشه پس ما از اول اخبتریم عامر ابن قیس که صحابی بود شنید خدمت کے رسول الله گفت یکی اینه یک جریان دیگه اینه که منافقین وقتی که برگشتند از بس که آیات بر علیه اونها نازل شد خیلی به تنگ آمدند آخر با هم مشوره کردن گفتن یک جایی میریم کمین میزنیم چون لشکر متفرق بود با رسول الله تعداد کمی بودند گفتن یک جا میریم ما کمین میزنیم رسول اکرم صلی علیه و وسلم وقتی که آمد حمله میکنیم اینا دوازده نفر بودند دوازده تا دو منافق بودند حمله میکنیم میزنیم خودشون رو کار را تبا میکنیم برای می همیشه راحت بشیم اینا وقتی که رفتند کمین زدند الله عزوجل به حبیبش خبر داد که از این راه نرود از اون راه نرفت راه دیگر را گرفت اونها تا دیر وقت ماندند آخر خجل شدند بعدا رسول الله صلی الله علیه وسلم به اونها یادآوری کرد این آیه درباره هر دو موضوع نازل شد توجه بفرمایید الله می فرمای بالله ما قالو اینها سوگند می به خدا که ما قالو اون جمله را نگفتند در حالی که الله گواهی میداد ولقد قالو کلمت الكفر اینها اون کلمه کفر را گفتند اینها نسبت به سخن شما اظهار شک کردند وکفروا بعد اسلامهم و بعد از اسلامشان کفر کردند حال اون کلمه چیه یا همون کلمه رجس و ناپاک بودن و یا اینکه گفته پیغمبر را از بین ببریم چون در ادامه هست و هم بما لم اینها قصد کردند اراده کردند اون چیزی را که لم ينالو حاصل نکردند انها چیزی را حاصل نکردن اراده کردن اراده کشتن رسول الله را ولی نصیبشو نشد حاصلش نکردن وما نقمو منهم حال سوالی جاست کہ چرا با رسول الله مشکل دارن چرا با مسلمانان مشکل دارن آخر عیب کجاست اللہ می فرماید که وما نقمو منهم نقم عیب را می یعنی انها اب گویی نمیکنند و بر عیب مسلمانان بر نخواستند مگر این اشکال را در مسلمانان می میبینند. اشکال چیه؟ ببینید منافقین قبل از اینکه رسول الله بیاید در مدینه منوره وظی خوبی نداشت از نظر مالی قبلا بهترین سواری آنها اق بود بهترین مرکب اونها اولاغ بود اما وقتی که رسول الله آمدند و بعد از اون جهاد هم شروع شد در بعضی جنگها شرکت کردند از مال غنایم به رسید چیزی و خوب شد اون تنگ دستیشان برطرف شد سواریشون بهتر شد از اولاغ به اسب رسیدند و نانشون در روغن شد به اسطلاح لذا خدای تعالی اینجا همین میگه میگه اینها چرا بدگویی میکنند چون پیغمبر آمد اینها فقیر بوده اینها را غنی کرد اینه هم کانو حین قدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر مدارک و قرطبی هردو میگن وقتی که رسول الله به مدینه آمد منافقین چی بودند فی ضنک من العیش از نظر عیش و زندگی تر سختی بودند لا یرکبون الخيل حتى عصب سوار نمی شدند عصب کسی سوار می شد که پولدار بود ولا يحوزون الغنیمه غنیمتی نبود که بینشون تقسیم بشه فاستغنوا بالغنائم و برای غنائم با غنائمی که خدا بهشون داد مستغنی شدند و قتل للجلاس مولا همین جلاس که این مسخر همین بدبخت منافق بعدن البته بعضی بگم ایمان آورد والله عالم این جلاس یک غلامی داشت غلامش کشته شد خدمت رسول الله یا رسول الله تو فیصله کن فامر رسول الله بیدیتیه اثنی عشر الفا رسول الله دوازده هزار درهم برای او دیه برید فستغن پردار شد بعد از اون الان خدای تعالی می فرماید من اینها چرا اشکال کار مسلمانان چیه اشکال رسول اللہ چیه که اینا بودن رسول اللہ اینا را غنی کرد وقتی که این آیه شد بعضی از اهل تفسیر گفتن جلاس اعتراف کردم جلاس ابن سوید واقعا من علام یادم محمد من چی بودم کی بودم به کجا رسیدم بی توفیلی همین رسول الله بود ببرکتی همین اسلام بود لذا استهید دل توبه کرد ایمان آورد پیغمبرم پذیرفت والله عالم لذا الله می فرماید وما نقمه الا ان اغناهم الله. ایب دیگر و ایراد دیگر انها نمی گیرند مگر اینکه ان خدا انها را غنی کرد و رسول خدا انها را غنی کرد من فضله از فضلش فا این یتوبو یکو لهم اگر توبه کنند از نفاق بهتر میشه برای انها و این یه اگر برگردن اگر پشت بدن توبه نکنند یوادی الله عذابا الیما آه الله آنها را عذاب میده عذاب دردناک میده في الدنیا و در دنیا و آخرت عذاب میده و مالهم فی الأرض میں هم ولا نصير برای اونها در دنیا هیچ حامی نیست هیچ نصیری نیست اگر خدا از اونها ناراضی بشه وَمِنْهُمْ من عَاهَدَ الله این اشاره به یک منافق دیگری هست ببینید یکی از علامت منافقان خدا مارا نجات بده بدعهدی هست یعنی اهدی که میکنه کنه که میکنه کنه وعده را وفا نمی کنه وعده را میشکنه لذا یکی بود الان اسمش کیه والله عالم تو بعضی کتاب ها هست تو احادیث هم هست ولی بعضی این حدیث را ضعیف گفتند این را خدمت شما عرض بکنم شما این داستان را زیاد شنیده داستان سعلبه ابن ابی حاتب بود سعلبه ابن ابی حاتب بود احتمالا تو فضائل اعمال همین داستان هم آمده که این فرد آمد خدمت رسول الله صلی الله علیہ وسلم گفتی یا رسول الله دعا کن که من سرمایدار بشم پولدار بشم رسول الله گفت تو اگر سرمایدار بشی تو بعد از اون از ما فاصله میگیری از مسجد دور میشی گفت نه یا رسول الله قول میدم رسول خدا دست به دعا برداشت دعای رسول الله قابل رد نیست اذا خدا تعالی در مالش برکت داد در گوسفندانش برکت داد اینجا پنج وقت نماز می آمد ولی گوسفندان زیاد شد مجبور شد که یک کم دورتر بره یک جایی که بالاخره بیشتر بتونه گوسفندان خودش را کنترل بکنه اداره بکنه خلاصه دو وقت می آمد صبح و شب می آمد روز کلا اونجا بود آخر بیشتر شده فاصله گرفت فاصله گرفت هفته یک بار فقط برای جمعه می آمد آخر بلاخره بیشتر فاصله گرفت تا دیرتر می آمد بلاخره ماه یک بار سال یک بار تا اینکه رسول الله بهش گفت که از طرف من کسانی میان زکات را تحویل می گیرند شما زکات بده گفت باشه وقتی وقتی که عامل رسول الله و نماینده رسول الله اونجا رفت گفت چرا ما باید زکات بدیم چیزی که خودمون در آوردیم زحمت کشیدیم باید بدیم اینها را نداد اون عامل برگشت اما خودش بعدم پشیمان شد که اشتباه کردم از اون جا آمد از اون جا آمد خودش گفت یا رسول الله من پشیمان شدم بفرمایدین از زکات رسول الله گفت نه من تحویل نمی گرم. برگرد تحویل نگرفت مالش را بالاخره تا روزی که رسول الله حیات داشت مالش را تحویل نگرفت در زمان ابوبکر صدیق آورد ابوبکر هم گفت چیزی که رسول الله تحویل نگرفته من تحویل نمیگیرم بعد در زمان عمر رضی الله تعالی آمد عمر هم گفت که چیزی که اون دوتا صاحب من رسول خدا ابو ابوبکر صدیق تحویل نگرفته من هم تحویل نمیگیرم نمی نمی خلاصه بدون ایمان رفت حال چرا رسول الله تحویل نگرفت والله و عالم میگوید که خداوند خبر داده بود که مؤمن نیست این ظاهران دارم میده خودش را میخواد حفظ کنه و ایلا اگر کسی از دل توبه بکند خدا هر توبه باشه خدا قبول میکنه فقط از صدق دل باشد لذا توبه نکرد اما بعضی از تفسیرها و محققین اهل تفسیر میگویند اسم سعلبه اینجا گفتن غلط اشتباه هست چرا؟ چون که میگن سعلبه یکی از اصحاب بدر بود کسانی که در جنگ بدر شرکت کرده بود و صحابه بدری هرگز منافق نمیتونن باشن درمیان اونها منافق نبود اونها از کنم که اونها را الله عز فرمود که شما هر چی بکنید من شما را بخشیدم یعنی در آینده اگر اونها اشتباهی بکنند داستان حاطب ابن ابی بلتار خان دید که اشتباهی کرد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم به تذکر داد چرا اشتباه کردی عمر رضی الله عنه گفت که یا رسول الله بذار گردن این منافق را بذارم یا رسول الله نارا حج گفت عمر مگر تو از صحابه بدری هست؟ مگه تو نمیدونی خدای از و اینها را بخشیده؟ حضرت عمر عشق عشقش جاری شد گفت الله و رسولش بهتر میدوند لذا اصحاب بدری را خدا بخشیده بنابراین میگویند که این واقع سعلب این روایت روایت ضعیفی هست این کی هست؟ بعضی دیگه منافقین را نام میبرند چند نفر بودند یکی نبتل ابن حارس یکی جد،, جد ابن قیس یکی معتب ابن قشیر اینا نامها رو میبرن که اینها که تاخر منافق بودند و منافق ماندند سالبه نبوده حتما کسی دیگه اسم سالبه را اشتباهی گفته تو روایت ها ده درسته ولی بعضی میگند که این واقعه سالبه اشتباه است والله عالم الا ای حال همین قدر ما میفهمیم اسمش کی بوده کار نداریم با اسمش می فهمم کسی که عهد بکند وعده بده بعدن واغر بشکند این بدترین کار هست الله می فرماید و منھم من عاهد الله بعضی از اینها هستن با خدا عهد می کنند چه عهدی عهد میکنه لا ان اعطانا من فضله خدایا اگر بما از فضلت دادی لنا حتما حتما صدقه میدهیم و لنکونن من الصالحین حتما حتما ما الصالحین میشیم معلوم میشه که اون کسی که نظر میکند ببین نظر کردن یک عادی از با خدا و بعدا نظر خودش را وفا نمیکنه کنه منافق است بعضی افراد هستند میگه خدای اگر تو از این من نجات دادی یک شطوری برای تو می کشم خدا نجاتش میده بعدن دلش نمیاد یاد هی تعویل میکنه توجی میکنه میگه اگر خود ما بکشیم بخوریم هم قبول نیست نخیر نا خیر نظر نظر یک لقمه و نظر واجب را یک لقمه نمیتونه خود تو, تو زنبا بخوره لذا این نفاق است که به اهدی که با خدا بستی به نظری که با خدا بستی به اون نظر تو چی؟ امل نكوني لذا الله مي فرمات ومنهم من عاهد الله بازی از این منافقان هستن با خدا اهد میکنن لئن آتان من فضله بار الهه اگر بما دادی از فضل خودت لنصدقن حتما حتما ما صدق ميدهیم ولنكونن من الصالحين حتما حتما الصالحین خاهیم بود فلما آتاهم من فضله زمانی کی الله بونها ميداد از فضل خودش بخلو بهی بسبب اون بخل می کنند و لو و پشت می دهند و هم معرضون انها اعراض کنند اللهم فرماید چرا انکار را می کنند فآقبهم نفاقا فی قلوبهم پشت سر انها خدا می اندازن نفاقی در دل های انها الى یوم القیامة که ان نفاق, نفاق تا روز قیامت باقی می ماند چرا؟ این واقعا کار بدی است با خدا وعده خلافی کردی، به ما اخلف الله ما وادو به سبب اینکه با الله وعده خلافی کرد، اون چیزی که با خدا وعده کرده بود و به ما کانو و به سبب اینکه با خدا دروغ گفت، با هر که دروغ میشه با خدا دروغ لذا کسی که با خدا آدمی کنه، کسی که با خدا واد میکنه بعد به با و وعدش وفاد کنه. و اینقدر انسان نمک نشناس نباشه میگه خدایی تو بده که بعد من این کار را میکنم. بعد وقتی که نوبتش میرسه خدا میده خدا نظرش را کامل میکنه بعدن میگه نمیتونم. برای مشکل این بالاخره بدترین کار هست و این از علامات منافقین هست. آلمی علمو أن الله يعلم سرهم و نجواهم آیا اینها میدانند؟ الله میداند سر اونها، مخفیات اونها و نجواهم سرگوشی های اونها. باهم خصوصی پیچ پیچ میکنند. این رمیگه نجوا. این پیچ پیچی اون ان جلسات سرگوشی و تغوشیشون را الله میداند. اونی که در دل مخفی دارد الله میداند. و ان الله علام الغيوب آیا نمیدانن که الله علام الغیوب است الله همه غیب ها رو میدانت الله غیب دان است میدانت لذا هر چی میکنی با خدا نمیتونی بکنی با هر کلک میزنی با خدا نمیشه لذا با خدا راست باش با خدا راست باش صادق باش بنده صادقی باش الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين یکی دیگر از علامات منافقین این علامات را خدا بیان کرد من شما سعی از این علامات به دور باشید الله ما حفاظت کنه ولی بعضی از علامات ها را گاهی در درمیان خود ما هستند سعی کنیم از این علائم به دور باشیم این خطرناک هستند یکی از علامات ها زدن به بندگان مخلص خدا هست زدن به چی؟ به بندگان مخلص خدای عزواجل هست مثلا رسول الله صلی علیه و وسلم وقتی که اعلام می کردند که شما بیارید مال بیارید صدقه بیارید در این جنگ لازم هست مؤمنین مخلصین که می آوردند منافقین چیکار می کردند مسخره می کردند خودشون نمی دادند اما اینا محفل تمسخرشون و محفل متلکبارین اینها خیلی گرم بود متلک می مسخره می مثلا در یکی از غزوات که غالبا همین تبوک بود رسول الله صلی الله علیه و فرمو مال بیارید این زمان مال هیچ نبود این موسم برداشت خرما بود کسی چیزی نداشت تازه خررم ها رو برداش می, می فروختند پول هم نبود سرمایه هم نبود. اما بعضی از دل داشتند بعضی هر الله تعالی جود وجود و سخد داده بود. هرچی که از نفاق دور باشی دلت بزرگتره دستت دهنده تر است دست بخشنده تر است بدال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو می تا شطور با بابار آورد سبحان اللہ تا شطور امروز هر کسی ندارے انہارا در راہ خدا بابار بیارے بگی یا رسول اللہ انہارا بگیر در رویتی سی ستاست انقدر رسول اللہ شاد شد خوشحال شد کہ رسول اللہ فرمود کہ بعد از این عثمان هر چی بکنے عثمان آزاد ہے همین برای آخرتی او بس یک لشکری را تجهیز کردن، بعضی سرمایدارهاه ما واقعاً الله بهشون همت داده بیشتر همت بده. چنان کارهای بزرگی میکنند، چنان کارهای یه جای میری میبینی یک مسجد عظیمی مثل همین هست، یک نفر سخته، یک نفر ساختگاهی هست، یک نفر همت داده الله تعالی 20 میلیارد، سی میلیارد. در این زمان یک جا مصرف میکنه چنین بندگانی هستند این توفیق پرورد و این هم بدونید که یک کریال از مالش کم نمیشه همین قد خدا دیگه منفعت میده وعده الله است وما تنفقو من خیرین فهو یخلفو دیشب خدمت حضرت شیخ بودم در رابطه با این مسجد جدید این دستگاهی که سیستم سرماگرما را دارد گفتم این دستگار خریداری کردیم مولانا فرمون نخیر این ممکن نیست به این ها بنده خبر نداشتم گفتم چقدر مولانا گفت که هزینهش تقریبا بیسی میلیارد هست اونجا من با خودم فکر کردم که هستن در این زمان بندگانی که یک بنده بیاد بگه که این را من میخرم برای مسجد تا روزی که اینجا نمازگزاران خونکی میخورند اون تو قبرش باشه در حشر باشه باشه عجر برای او دبل دبل میره سخت میشه شه. هست چین افرادی؟ لذا الله عزوجل دارت چین بندگانی که یک لشکر را تجهیز می کنند. عثمان عثمان نورین عبدالرحمن امن عوف در همین جریان آمد یا هشت هزار دینار یا هشت هزار درهم روایت ها متفاوت است. آورد یک جاداد به رسول الله رسول الله خیلی خوشحال شد. منافقین گفتم ببین این آمد خودش را نشان میده این ریا است این می‌خواد الا همه ما از این تعریف بکنیم غافل از این که تو اون قلب چی میگذرد و بعد یک صحابی دیگه بعد از عبدالرحمن ابن اوف احمد بنام ابو عقیل انصاری این مقداری قرمه آورد قرمه خشک آورد الله نگاه نمیکنه زیاد میدی یا کم میدی به اندازه ات بده الله خلوص قلبت را نگاه میکنه باچه انگیزه ای می میدی، باچه حب می دی لذا این صحابی که آورد خندیدن گفتند این لشکر منده بود که همین خورماش را بیاره. اگر, اگر این نمی آورد همه از گروسیگی می مردند. این مسخره کردند. الله عزوجل این آیه را نازل فرمود. الله فرماید الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات آن منافقینی که ثانی زنن متضوین را متضوین تضو یعنی صدقه نفلی دادن. اونهایی که صدقات نفلی میدن از مومنین در صدقات در صدقات به صورت نفلی نه تنها زکاتشون، علاوه زکات خیلی میدن. بعد منافق ما اون را مسخره میکنه. این دفاعی است از, از عبدالرحمن بن عوف. مَسْخَرَمِكُنَمْمُتَوْعِينَ رَأَى وَهَمْتِنِينَ وَالَّذِينَ که نمی آبند مگر را مثل ابو عقیل انصاری. یعنی به اندازه توانش میده، اونی که ده هزار دینار میده و اینی که یک کیلو خورما میده، این بالاترین توانش اینه، اون بالاترین توانش اونه، اجرشون مثل همه. خدا طالب خلوص صدق دل نگاه میکنه لذا اللہ می فیس فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ اینها مسخری می این را اینها را شما مسخر می کنید الله اللَّهُ خدا خودشون را مسخر میکنه کنے خداوند اونها را تمسخر می یعنی چه؟ یعنی جواب تمسخر الله تو دهانشون می جواب تمسخر چیه؟ همینی که خدا به عذاب گرفتاریم میکنه. ولهم عذاب آلیم برای این افراد عذاب دردناک است. و بعد اینقدر خداوند میفرماید این منافقین بدند، زشتند. که ای پیانبر تو اگر برای اینها استغفار بکنی هم خدا اینها رو نمی بخش را. استغفر لهم معلوم میشه که مختار کل اللہ است رسول اللہ نیست حتی رسول اللہ بخواد خدا کسی رو ببخشه خدا نمی بخشه رسول اللہ میره بالا سرش نماز جنازه میخانه اللہ میگه ب... می من نمی بخشم تو جنازه بخون استغفر لهم اذ الله يزوج برای انها مغفرت بخا او لا تستغفر لهم یا مغفرت نخا ان تستغفر لهم اگر شما برای انها مغفرت بخا سبعین 70 مره هفتاد بار فلن يغفر الله لهم هرگز هرگز الله نميبخشت انها را چرا ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله چون استه دل اعتقاد نداره باور نداره این به سبب این است که کفر کردن به الله و رسولش والله لا يهدي القوم الفاسقين الله چنین قوم فاسقی را هدایت نمیکنه توفیق هدایت نمیده که همیشه مسخره بکنات فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله همش خباست منافقین همش شناعت منافقین یکی دیگر از فسادهای اونها این بود که آمدند از رسول الله به دروغ اجازه گرفت یا رسول الله من فلان عذر دارم بچم مریضه زنم مریزه مشکل دارم خودم مریضم خلاصه به هر دروغی بود نرفتم به تبوک به غزوه طبوک نرفتند شرکت نکردند و اینجا بعد پشت سر خوش بودند با هم دیگه میخندیدند چطور توانیستیم سرشون کلاه بذاریم و به بعضی از بقیه دوستان و رفقاشون میگفتند یا به بعضی از مؤمنین میگفتند گفتند گفتن نروید دیوانید این گرمی کجا میخواید برید الله عزوجل جواب داد ای بیچاره میدونید که آتش جهنم گرمتر از اینه کاش شما می فهمیدید ولی این از نفهمی شماست به چه دلتون خوشه که نرفتید خوشی شما اگر میدونستید چه عذابی هست به جای این خنده ها گریه می کردید فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فرح المخلفون خوشحال هستم مخلف و مخلف اونایی که پشت سر انداخته شدن پشت سر نگاه داشته شدن یعنی به جهاد نرفتن پشت سر به بمقعدهم خوشحال هستن بسبب نشستنشان خلاف رسول الله در جهت خلاف رسول الله در اون جهت با رسول الله همراه نشدن وَكَرِهُوا اَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ببین مرز ببین ها را اولی مرز و کهیو نمی پسندند دوس ندارند، این یوجایدو اینک جهاد کنم با مالشان و جانشان در رای خدا منافق دوس نداره، نمال نم خرچ کنه، خودش بره. و مرزی دوم، لا قاولات انفرو الحر حر، بی بقیمیگویان نرفید درد گرمی گرمه کجا میری؟ آتشی سوزانه کجا میخوای بیري؟ الله جواب میده قل نار جهنم اشد و حرار بگو نار جهنم آتش جهنم سختر است از نظری گرمی لوکانو یفقهون کاش میفهمیدند کاش متوجه میشدند که آتش جهنم چقدر داغ هست اون وقت میرفتند این گرمی پرواه نمی کردند لذا گاهی اگر در راه خدا گرمی هست در راه نماز در راه حج در راه دعوت الی الله گرمی را احساس میکنید اونجا به این آیه بیفتید بعد اون گرمی آسان میشه نار جهنم اشد حر این جمله الهی هست کلام الله هست و الله تعالی می فرماید این قد قهقهه میزنند و میخندند فلیضحکوا قليلا ولیبکو کثیرا گرچه این انشاه هست اما به معنای خبر است. فالی از حکوم معنیش اینه که باید کم بخندند، زیاد گریه کنند ببینید اصلش اینه که خداوند خندیدن را برای ما جایز قرار داده خندیدن ناجائز نیست اما زیاد خندیدن بعضی ها اصلا می خواهند برای بنیت خندیدن می نشینند بعضی جوان ها میگه بیا با هم یک کم بخندیم چوک میگند شوخی می کنند سر به سر می فقط یک ساعت دو ساعت همش قهقه قهقه خندیدن این خندیدن ناجایز اینطور اگر کسی ناراحت هست و شما بخواهید که خندید از کنم که خنده را در بیارید می‌خواید از دلش یک مقدار در اشکال نادر خوبه به یاد حدیث افتادم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وقتی که تشریف بردند به خدمت رسول الله اونجایی که شایع شد که رسول الله همسرانش را طلاق داده رفت گفتی یا رسول الله شما طلاق ده گفت نه خير طلاق ندادم فقط رسول الله ناراضی شد چون همسران گفتن که یا رسول الله ان تو سوره اعظم میخوانیم یا رسول الله الان فتوحات آمده الان سرمایه آمده همه صحابه وضعشون خوبه همه غلام دارن کنیز دارن برایشون کار میکنن ما هنوز نانمون تو روغن نیست یک مقداری قضا بهتر باشه چربتر باشه بهتر نیست از این رسول الله ناراحت شد گفت میخواهید با من زندگی کنید همینه و الا مهرش شما را میدم پول هم به میدم برید برای خودت تو لذا تا یک ما رسول الله نیامد رسول الله بسیار مغموم بود حضرت عمر آمد چند شوخی کرد دخ... زنش دختر خارجه بود گفتی رسول الله اگر زن من دختر خارجه این حرفار بزنه من سرش را میشکنم چند شوخی از این و شوخی ها کرد رسول الله خنده شد خلاص خود حضرت عمر میگه من کاری کردم که رسول الله بخنده تا از این ناراحتی بیرون بیاد خب کسی وقتی میبینه دلش گرفته شما برید در حدی که اون شاد بشه اون غمش را فراموش بکنه این سنته این خوبه این مستحسنه اما فقط مجلس خندوانه که فقط بخندیم این دیگه درست نیست این خندیدن الله تعالی میفرما فلیضحکوا قليلا و لیبکو كثيرا در احادیث احمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم کان ضحکه متبسم یعنی جای که رسول الله می خندید در حد تبسم تبسم همونه که فقط لبها شما ببینید میدونی خندیده صدای نمیشنوی قهقهه ای ازو نمیشنوید لذا این خنده خوبه تا این حد انسان بخنده شوخی با هم دیگه بکنه اللہ تعالی خوشکی نفرموده اما اینقدر خوشگذرانی که یک ساعت دو ساعت دروغ و جوک و هرچی به سر بسر بکنند و یکی مسخره بکنند و برای یکی جک درست کنند تا بخندند آخر از این خنده چی, جور، چی درست میشه لذا اللہ تعالی میفرماید پس بخندند کم گریه کنند زیاد اما بعضی میگن نه این به معنای خبر است یعنی اینهایی که اینطور میخندن یک روزی میاد که فلیف حکو قلیلا کم میخندن یعنی نمیخندن ولی یبکو کسی زیاد گریه میکنن وقتی تو عذاب خدا گرفتار بشند اون وقت به جای این خنده ها گریه ها میشنوی جزا ام بما کانو یک این جزا هست این پاداششون هست کیفر عملشون هست به سبب عمل کرد و به سبب کسبشان فاین رجعک الله الى طائفه منهم کل الخروج وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله برمیگشت این آیات نازل شد آیات در رابطه با منافقین در مسیر نازل شدند هنوز به مدینه نرسیده بودند. الله تعالی فرموش شما که برگردی بعد از این به هر جنگی میخواستید بیری اینا میخوادن تلافی بکنن با شما بیاند ولی اجازه ندارید هیچی ایکی را از اینها ببرید اینا دیگه همیشه قدغن رفتن اینها محرومیشون کرد منهم اگر خدا شما را برگرداند إلى طائفة منهم بغرور از انها فاستاذنوك للخروج براي خروج از شما اجازه گرفتند برای خروج از شما اجازه خواستند فقل لن تخرجوا معي أبدا برو هرگز هرگز با من خارج نمی أبدا ولا تقاتلوا معيه عدوا هرگز هرگز با من نمی جنگید با هیچ دشمنی شما دیگه در کنار من نخواهید بود برای همیشه شما همراه من نیستید چرا انکم رضیتم بالقعود اول مره شما بار اول راضی شدید برای نشستن شما که خودتون راضی شدید فقعدو مع الخالفین همیشه بنشینید با خالفین خالفین یعنی اونایی که پشت سر میمانند شما به جهاد برید پشت سر کی میماند؟ پیرمردها میمانند، زنها میمانند، بچه های طفل میمانند. لذا شما منافقین هم از این بعد با منها بیمانید. شما اجازه ندارید. و دیگه معامله رسول الله با منافقین یکی این باشد، یکی این که بعضیها که میمیرن جنازهشون شرکت نکن. عبدالله ابن ابی مورد رئیس منافقان کسی که بیشترین ضربه را به اسلام وارد کرد بیشترین تمسخرات را او کرد بیشترین توطئه ها از سر او بود اما فرزند مخلصی داشت اسم فرزندش عبدالله الله بود هم عبد الله ابن عبدالله الله ابن عبی فرزندش عبدالله الله رضی الله عنه اون گفت رسول الله دونست که پدرش وضعش خوب نیست خب پدره انسان دلش می اون عاطفه و اون احساسات درونی هر کسی میدونه نسبت به پدر چیه لذا گفتی رسول اللہ خیلی برای پدرم ناراحتم از شما میخوام که دو کار بکنید یکی پیراهن خودت را بده همین پیراهنی همین چادری که شما بر بدن خودت می پیچونید همین رو بدم من میخوام پدرم را تو این کفن بکنم. هدفش این بود که وقتی که در پیراهن رسول الله باج خدا را اذاب نده. رسول الله پیراهن خودش را داد البته این عبدالله ابن ابی در واقع یک احسانی هم بر رسول الله داشت. اون احسانش این بود که در جنگ بدر وقتی که اسیران اسیر شدند تمام نزدیکان رسول الله بودند اسیر شدند خب اونها تو جنگ بودند لباسهایشون پاره شد خونی شد گم شد لذا اسیران را که آوردند لباس نداشتند لباسهای پارپوره ای داشتند گفتم برای اینها لباس بیارید لباس آوردند به همه لباس دادند به عباس عموی رسول الله لباسی نرسید چون عباس قد بلند بود لباسها جوابش شنا عبد عبدالله ابن ابی هم قد بلند بود این رئیس منافقان گفت من لباس خودم را بهش میدم لباس خودش را داد این احسان را به رسول الله و به اموی رسول الله کرد اینجا رسول الله اون را تلافی کرد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لباس خودش را و پیراهن خودش را داد که کفنش بکنند کفنش کرد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بلند شد که بره چنان زدش را بخانه. عمر فاروق گفتیار رسول الله منافق است. نرو ما شما نرو. نماز بر او نخان، اما تبر غرایتی رسول الله رفت نماز خاند. بعدن این آیه نازل شد. آیه نازل شد که الله تالا من کردن، شما نماز نخونید بر منافق. ولا تصلّي على أحد منهم ما ت نماز نخان بر هیچیک از آن منافقان که مرده در حالت نفاق ابدا هرگز نماز نخان ولا تقم على قبره بر قبرش نایست بر قبرش نایست بعضی میگویند که ایستادن بعد از بعد از جنازه و دعا کردن ثابت نیست پس چرا بعد از قبر اینجا میستند؟ برای منافق خداوند میفرمه نیست. پیغمبر را میگه نیست چون پیغمبر اگر بیسته چکار میکنه؟ برایش استغفار میخواد. برایش مغفره میخواد. تازه تازه دفنش کردیم. پیغمبر دعا میکنه خدای حساب و کتاب را آسان بگردن. خدای اعمال نامه را به دست راست بده. ما همین دعا رو میکنیم برای اموات خودمون. پس از اشاره قرآن معلوم میشه که بعد از دفن کردن دعا کردن هست چرا؟ بعد از جنازه نیست بعضی جاها میکنن این بداتی چون جنازه خودش دعایی هست شما وقتی که در جنازه بعد از تکبیر سفون میگه اللهم مغفر لحی نا و این خودش دعا هست بعدم بعضی سلام میگویم بعدم دعا میکنه این بدات است اما بعد از دفن کردن ایستادن و مغفرت تلبیدن برای ما هست ولاتقم على قبره بر قبرش نیست. این نوم کفرو بالله و چرا؟ چون این کافر از کف ده به خدا و رسولش. و ما تو وهم فاسقون و مردان در حالی که کافر مردن فاسق مردن فاسق یعنی خارج از دین. از دین خدا خروج کرده و مرده. خب حالا سوال اینجا است که اگر اینها منافقین آدمای بدی هستند چرا خداوند اینقدر مال و منال بهشون داده الله تعالی می فرماید ولا توعجبک اموالهم واولادهم مال و اولاد آنها شما را در شگفت نه اندازد مال و اولاد که خدا به کسی داده این فضیلتی نیست انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا خدا میخواد اونها رو به وسیله همین مال و اولاد در دنیا عذاب بده و تزهرق انفسشون و جانشون ربیگرید و هم در حالی که با کافر باشن یعنی با همین مال و اولاد مشغول بشن ببینید نفس مال اگر کسی مال داشت دلیل نیست که این انسان سعادتمنده اگر مال نداشت دلیل نیست که هم یا سعادتمنده یا بدبخته نه نه مال دلیل سعادت نه مال دلیل بدبختیه مال را که خدای از و میده ایک تقسیم خدا کرده یکی را گفته من میدم یکی را نمیدم این تقسیم الهیه است بر این اول هیچ کسی نباید اعتراض داشته باشه اما چه زمانی مال دلیل شقاوت و بدبختی هست زمانی که مال سبب غرور بشه زمانی که مال سبب غفلت بشه، زمانی که مال سبب معصیت و گناه و اسراف و تبزیر بشه، زمانی که مال سبب به منکر بشه. یعنی انسان با مال چکار میکنه؟ محفل گناه تشکیل میده. با مال جلسه رقص و دهلو ورگو نمیدونم فلان و فلان تشکیل میده با مال جلسه کباب و رباب و شراب و میو میخاری تشکیل میده این دیگه مال بدبختی هست پس خیلی ها هستند پولدارند و بدبختند خیلی هستند که نادارند و بدبختند خیلی هستند که پولدارند و سعادتمندند خیلی هستند که نادارند و سعادتمندند پس سعادت و شقاوت با مال و با ناداری هیچ کاری نده ره از خود انسانه لذا اینارا خداون میفرم مالشون سببه که با کفر بمیرن چون مال غرور میاره دیگه به طرف اسلام نمیاد و اذا آن زل سورة هرگا نازل میشه ان آمینو بالله و جاهیدم عرسوریه اینکی ایمان بیاورید به خدا و جهاد کنی با رسولش استعذنا کا ول منهم اول طول یعنی داره کسانی که دارای توانایی هستن قدرت ثروت از شما اجازه می گیرن قدرت مندان و ثروتمندان و, و چه می گویند؟ وقالو زرنا نکم مع القاعدین یا رسول الله مارا بگذار ما با همین های که نشستم بشینیم ردو با مع الخوالف الله می فرما انها راضی هستن که بشینند با خوالف خوالف بنا انعانیه النساء المتخلفات عن الجهاد اون زن هایی که از جهاد شکار می کنند، به جهاد نمی رن با اونها بشینند و طبع علی قلوبیم، اینها مهر خورده، فهم لا یفکهون اینها نمی فهمند، اینها فهم و درک ندارند. اما در مقابل منافقین، مؤمنین، مخلصین صفات اونها الله بیان می فرماید، یک تقابلی هست. ببین تعرف الاشیاء و بی ازدادها هر چیزی را با زدش می شناسی این سفید سفیدی را زمانی شما میشناسید که سیاهی را بدونید اون وقت می دونی سفیدی یعنی چه لذا منافق را با مخلص می شناسی مخلصین را ببین اون وقت می دونی منافق یعنی چه لذا الله اینجا مخلصین را اونهایی که پروانه های شم نبوت بودن اونهایی که اطراف رسول پروانه وار میگشتند، میچرخیدند، دور میزدند. گوش به فرمان رسول الله بودند. اونها را الله تعریف میکند. لَàَکِنَ الرسول اما رسول والذین آمنوا معه کسانی که ایمان آوردند با او جاهدو به اموالهم و انفسهم جهاد کردند با مالشان با جانشان در هر میدانی خودشون هم هستن مالشون هم هست یکی کل مال یکی نصف مال یکی هشت هزار دینار یکی سیسته شطور یکی ستة شتور هر یکی و اولایک لهم الخیرات این افراد این گروه کسانی هستند که برای اینها تمام خیر هست تمام خیرات برایشون است خیرات دنیا و آخرت و اولایک هم المفلحون اینها کسانی هستند که فقط اینها رستگار و کامیاب استند انسان های کامیاب اینها هستند اعذ الله لهم جنات تجري آماد کرده مهیا کرده الله برای انها جناتی آن باغاتی تجری من تحتیه الانهار جاری هست ازیر از درختها و قصرها یشناهرها خالدی نفیها همیشه در آن جنات میمانند این صحابه این مؤمنین مخلص ذلك الفوز العظیم این هست رستگاری بزرگ این است کامیابی بزرگ که الله عزوجل بنده خودش را موفق جنت بهش نصیب بگرداند وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون ما يوفقون حرج اذا نصحوا اذا نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ مَا ما على المحسنين من سبيل والله غفور الرحيم آنچه در آیات گذاشته خاندیم و در آیات آینده الله می خانیم در ارتباط با غزوه تبوک و جریان تبوک بود غزوه تبوک همون طوری که قبلا عرض کردم یکی از غزوه های بود که بظاهر بسیار سخت بود دلیل سختیش را هم در گذشته ارز کردم که طرف یک قوم نبود طرف و دشمن یک قبیله نبود یک گروه نبود یک قدرت بود یعنی امپراتوری روم اون زمان بود کسی که داشت بر علیه اسلام لشکر جمع می کرد هرقل روم بود که تقریبا لشکری در اون زمان اون زمانی که انسان انسانها بود انسانی وجود نداشت خیلی جمعیت کم بود در اون زمان در مرز سوریه و شام سی هزار نفر جمع کرد که به مدینه حمله کند در محل تبوک تبوک به فاصله پونسد و کیلومتری مدینه هست تبوک مرز شام هست مرز سوریه هست اون زمان سوریه جزید روم بود از کردم این کشورها همه تحت سیطره یکی از عبرقدرت ها بودند لذا در شام در تبوک لشکر بسیار بزرگی بر علیه اسلام جمعوری کرد تمام قبائل و تمام اقوام و تمام عرب و غیر عرب را جمع کرد تا به مدینه حمله کنند وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه شدند دستور دادند که قبل از اینکه اونا حمله بکنند ما به اونا حمله میکنیم این یعنی شجاعت این یعنی بهادری ان حضرت صلی الله علیه و سلم لشگری جمع کردند و دستور دادند نفیر عام نفیر عام یعنی بسیج عمومی همه باید بریم هیچ کسی باقی نماند. لذا مسلمانان را که جمع کردند اول و آخر سی هزار نفر شدند، سی هزار کجا و سیصد هزار کجا؟ ولی قدرت ایمان، قدرتی هست که نمیشه هیچ چیز باش مقابله بکنه. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند مال بیارید. این جنگ را میگن جیش عسره. واقعا سخت بود عسره به من سختی لشکری که با سختی داشت تجهیز می و آماده می شد اینجا بودن که صحابه ایسار و از خودگزشتیگی خودشون را نشان دادند تا جایی که توانست مال آوردند هر یکی در مال آوردن و در انفاق کردن و در خرج کردن گویا مسابقه بود به تبوک رفتن بلاخره دشمن ترسید قبلا خاندیم که دشمن جرعت نکرد متلاشی شدند متفرق شدند و فرار کردند از اون طرف مسلمانان عزتمندانه فاتحانه سربلند برگشتند اما وقتی که برگشتند این آیات در راه نازل شدند چهار گروه بودند که نتوانستند در تبوک شرکت کنند و همراه بشند این چار گروه را در ادامه این سوره ما می خانیم خداوند ذکر کرده یک گروه منافقین بودند منافقین شرکت نکردن به ظاهر مسلمان بودند اینها الله تعالی به رسولش گفت شما وقتی برید اینها میان دروغ درست میکنند دروغ میبافند و دروغ میگند میخوان شما را با زبان و با دهانشون راضی بکنند یردونکن نکن افواهی هم با دهان شما را راضی میکنند با چرب زبانی فقط میخاند شما راضی بکنند دیگه هیچ همکاری و هیچ هنر و کمالی ندارند اینها خوب تکلیفشون روشن هست خدای تعالی ذکر میکنند که دنیا و آخرتشون چطور هست؟ گروه دوم مؤمنین مخلصی بودند که اونها بذاعت مالی نداشتند اونها توانایی نداشتند خیلی دلشون میخواست شرکت بکنند ولی یک شطور که بر اون شطور سوار بشند و تا اونجا برن نداشتند حتی بقیه صحابه ای که شطور با خودشون بردند یا اسب در باره شطور میآید صحابی میگه که چند نفر به یک شطور نوبتی سوار می‌شدن سه نفر چهار نفر <پس> یکی که مقدار میرفت مسافی میرفت پایین می دیگری سوار میشه و برای خوردن چیزی نبود آخر به چند نفر به یک جماعت چندتا خرما می رسید این خورماها رو بین خودشون تقسیم میکردند. و حتی در بعضی روتمیت که خرما به کسی اگه نمی رسید خسته خرما رو بهش می دادند گفتیم که راوی میگه ما سوال کردیم خسته خورما چه چی کار میکردی میگه خسته خورما اثر خورما بر او بود کمی شیری بود اون را می تو دانش دانش شیری می بعد آب می خورد یعنی تا این اندازه سخت بود بالاخره این گروه دوم اینا هیچ چی نداشتند آمدن خدمت رسول الله یا رسول الله ما با جان آمده ولی مال نداریم رسول الله گفت منتظر بمانید آخر برای اونها سواری گیر نیامد چیزی گیر نیامد رسول الله گفت نمیتونیم شما رو ببریم اینها با چشمانی اشکبار برگشتند قرآن میگه که گریه کردند و برگشتند گروه سوم مسلمانانی بودند که اینها کوتاهی کردند میتوانستن برند ولی نرفتند اما اینها به محض این که رسول الله صلی علیه و سلم برگشتند اینا متوجه شده ما اشتباه کردیم توبه کردند ده نفر بودند ابن عباس رضی الله تعالی عنہ همه اینا ده نفر بودند یکی از اونها ابو لبابا بود این ده نفر رفتند خودشون را به ستونهای مسجد, مسجد النبی بستند و زار زار گریه کردند رسول الله صلی الله علیه و عادت شریفش این بود همیشه از سفر می برمیگشت اول مسجد میرفت و رکت نماز می بعدا بعدن خانه رفت وقتی مسجد رفتن دیدن این صحنه را چند نفر به ستونها بسته شدند. پرسیدند که جریان چیه گفته یا رسول الله اینها کسانی هستند که تخلف کردند عذر نداشتند او اینها الان خودشون را بستند و توبه کردند گفت که من درباره اینها نمیتونم چیزی بگم تا خداوند بفرماید تا اینکه خداوند عزوجل چون اینها فوراً توبه کردند فورا توبهشون را قبول کرد آیه ناظر شد اون آیه را هم انشاءالله میخانیم گروه چاروم سه نفر مسلمان بودند که اینها هم باوجود توانای شرکت نکردند که اینها خودشون در حدیث آمده داستان خودشون را مفصل بیان می کنند شاء به اون آیه که برسیم داستان را از زبان خودشون از زبان حضرت کعب رضی الله تعالی نو ارز می میکنم اینها فوراً توبه نکردن اینا آمد خدمت رسول الله رسول الله گفت چرا نه آمدی گفت یا رسول الله کوتاهی کردیم. رسول الله گفت پس منتظر بمانید اینها ها رفتن توبه کردن ولی توبه شون همونطور که دیر توبه کردن توبه پذیرش هم مؤخر شد. پنجه روز طول کشید تا این پنجه روز این چه حالی داشتن کلن قطع رابطه شد رسول الله دستور داری هیچ که با صحبت نکنه با سلام نده حتی زنهایشون اجازه ندارند بعد از چند روز زنها را گفتند بری خونید پدرتون اینها ها تنها ماندند شب و روز گریه گریه زار زار تا اینکه الله تعالی شون را قبول کرد لذا این چار گروه را ما در این سوره مبارکه در ادامه و باقی منده سوره می الله اللہ می فرماید المعذرون من الاعراب معذر کسی هست که عذر نداره ولی بزور برای خودش عذر می تراشد ما در فارسی و بلوچی میگیم گیم باز یعنی ای نداره عذر نداره ولی برای خودش درست بھی منافقین اینطور طور بودن عذر نداشتن هر ایک ایک دروغی سره سر هم کرد و جاء المعذرون من الاعراب اللہ می فرماید که بحان بازها کسانی که برای خودشون عذر تراشیدند آمدن از اعرابی ها اعرابی ها یعنی روستانشین ها بوده این اطراف مدینه زندگی می آمدن لیؤذن لهم تاکہ بی انها اجازه داد بشه و قاعده‌الذین کذب الله و رسوله الله می‌فرمایند شایسته کسانی که کذب الله با خدا دروغ گفتن با رسولش دروغ گفتن اینها نشستن اینها بهانه وردند الله می‌فرماید سیب‌الذین کفرو منهم عذاب آلیم ان قریب میرسد به کسانی که کفر کردن اینها چون اینا کفر داشتن تو درونشون ایمان نبود به اونها عذاب دردناک می رسد معلوم میشه که انسان اگر در دین همراهی نکند همکاری نکند و انگیزش کفر باشد چون اعتقاد ندارد فرق داره با اون کسی که اعتقاد دارد ولی انگیزش تنبلی و سستی هست لذا اینها را اللہ تعالی می فرماید که اینها عذاب دردناکی برایشون منتظر است. اما گروه دوم که اونها معذور بودند یا مریض بودند یا ضعیف بودند فلج بودند یا اینکه مال نداشتند. الله تعالی اینها را میفرماید که بر اینها هیچ عرجنی نیست. لیسا على الضعفاء نیست بر ضعیفان، ولا على المرضى و نبر مریزان ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج و نبرك سانك نیافتند آنچه ک خرج کنند برای اینها حرج نیست. بشرطی که در ده دلشون ایمان باشد. اذا نصحو لله و رسول زمانی که اینها ناصح خدا و رسولش باشند یعنی خیرخواه دین خدا و رسولش باشند. مال المحسنین من سبیل برچنین مخلصینی اینا چون اخلاص دارند برچنین مخلصینی هیچ نو اتحابی نیست هیچ نو ملامتی نیست هیچ راه ملامتی برای اینها نیست نه معذورند والله غفور الرحیم الله عزوجل نسبت به این بندگان معذورش هم بخشاینده و هم مهربان است. امون تورکی شرکت نکردند چون معذورند خدا اونها رو میبخشه هر کاری معذور باشی هر کاری معذور باشی الله تعالی عذر تو رو در نظر میگیره مفت میبخشه بعضی از عزیزان در ماه مبارک رمضان مریض هستند میبینم بقیه مردم روزه میگیرن اینها دلشون درد میگیره گریه میکنند میبینم بقیه مردم نماز تراوی میخوانا نمیتونن گریه میکنند انهار الله عزوجل بدونه چی در البته شرطش اینه که در زمان صحت و سلامتی در زمان صحت و سلامتی اینها عمل کرده باشند الان که مریض شدند الله بدون هیچی چی مفت اجرشون میده یک مریضی بود بیمارستان زنگ زدم احوال پرسی کردم تلفنی عیادت کردم گریه کرد گفت خدا میدونه که ماه رمضان است من چه حالی دارم دل دلش می سوخت بعد بنده به یاد اون حدیث افتادم براش خواندم که رسول الله صلی الله علیه و فرمود هر کسی که در حالت صحت و سلامتی و در حالت حزر وقتی که سلامتی در خانه هستی هر عملی را انجام میده هر عبادتی را انجام میده اگر یه وقتی براش عذر پیش آمد عذر دو چیز در حدیث آمده عذر مثلا مرض یا سفر یعنی مریض شد یا سفری رفت خب نتونست سبب اوزر اون عمل را انجام بده الله عزوجل همون زمان صحت و سلامتی هرچی بیش آجر میداده الانم مفت بهش میده بی او گفتم اون زمانی که شما سالم بودید ما شاءاللہ در روزه ہوتا داشتی نه در نماز کوتاهی داشتی الان که مریض شدی الان بقیه دارن روزه میگیرن شما روزه نمیگیرید اجر شما ان برابر است و چه بسا دلت میسوزه اجر تو بیشتر از ماست ما لذا این قانون الله است الله ببین درباره این که شرکت نکردند ولی معذور بودند الله میفرماد والله غفور الرحیم الله هم شما را میبخشه و هم بر شما رحم میکند الله بر شما لطف میکند، علاوه از بخشش به شما دیگه عطا میکند، غمی تو نباشه. لذا، هر وقتی که انسان معذور باشد، اما در در حالت صحت و سلامتی انسان کوشش میکنه، در مریضی نمیتونه، فا می اللہ میبخشد. اللہ میفرمه، اینها هیچ نوع اطاب و هیچ نوع ملامتی بر اینها نیست. وَلَا عَلَى الَّذِينَ وَهَمْچِنِي ملامت نیستند، و همچنین الزامی نیست طابی نیست بر آن کسانی که اضاات ما کل تحملهم هم زمانی که پیش تو مییم اے رسول الله تاک اونها را بر سواری سوار کنی میان یا الله ما سواری نداریم. اگر شطور از سواری هست ما هم می بیایم بجنگیم. می در راه الله سهمی داشته باشیم. می آیند پیش شما لی تحمل اومت تا انها را حمل کنی، اونها را سوار کنی. قل تلا اجدم آحمل کم علی. شما میگویید من نمی آبم، اون چیزی که شما را حمل کنم برآم. توی پیغمبر میگی، من خودم ندارم که سواری به شما بدم. اما اینها ببین چه احساساتی دارند. دلشون میخواد. توالو برمی گردند و آون تفید من الدمع چشم های میشه از اشک یعنی اشکبار میشه چشمشون گریه میکنند و برمیگردند چرا؟ حزنن الله ما معیون فقون به خاطر غم اینکه ندارند اون چیزی که خرج کنند ندارن خرج کنند در رای الله. ندارند که سوار بشن سواری که در رای اللہ لذا دلشون بقول ما محلی دوت دود می در دلشون آتش روشنه و گریه می همین طور بعضی وقتها حاجی به حج می روند بعضی دیگر دلشون میسوزه. سوزه گریه می کنند را اللہ عز و انشاءاللہ عجر می دیں اللہ می فرماید که تولو و اعیونهم اینها بر میگردند و چشمائشان تفید من الدمع اشک بار هست از اشکی که میریزد حزنن بخاطر غم این که اللا یجیدو ما نمی نمیابند آنچه که خرج کنند در راه الله بر اینها هیچ حرجی نیست هیچ اطابی نیست اینها را خدا ملامت نمی پس ملامت کیه؟ اللہ می فرمائے اولا ملامت اون منافقی هست که دروغ میاد از شما اجازه می گیرد اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاءَ جزی نیست که عطاب هست راہ ملامت هست راہ عطاب و سرزنش هست بران کسانی که يَسْتَعْذِنُونَكَ از شما اجازه می گیرند که بمانند هم اغنیاء در حالی که سرمایه دارند غنی هستند. هم شطور دارند هم اسب دارند هم شمشیر دارند میتونن در راه الله بروند رضو به ان يكونوا مع الخوالف الله می فرماید انها راضی هستن که بشینن با زنهای خان نشین خوالف زنهای خان نشین مرد مرد هست ولی میخواد مثل زنها بشینه تو خونه این آ... این در واقع صفت مرد نیست وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون خداوند دلشون را مهر زده و اینها نمی فهمند اینها درک ندارند نمی دونند که ما از این مهری که خدا زده این مهر را میگم مهر جباریت به سبب این مهر از هدایت و از ایمان محروم میشند درباره این مهر عزیزم برای طلاب توضیح دادم خلاصه خدمتش معرض بکنم یک انسانی که خیلی سرکشی می کند خیلی تمرد می کند خیلی گناه می کند و در هر مسیر نافرمانی خدا را می کند هر وقت نافرمانی خدا را می کند خدا تعالی آخر دلش را مهر میزند، بل بالخصوص کسانی که با اهل حق درگیر می شند. با دعوتگران دین با دعوتگران توحید با انبیا یا با دعوتگران راستین وقتی که درگیر میشند و سعی میکنند، اونها را خجل بکنند، اونها را شکست بدهند، خلاصه این نوع افراد خدا به دلشون یک مهر میزند که این مهر اسمش هست مهر جباریت در اصطلاح تفسیر. جای خداوند میفرمای ختم الله علی قلوبیم. خدا دلشون مهر زده یک جای میفرما بل الله على قلوبهم فهم اقفاله خدا مهر زده دلشون قفله یعنی چی یعنی انها دیگه قابل هدایت نیستند انها حق را با چشمی خودشون ببینند هم هدایت نمیشه. انها حتی با چشمی ببینن چشم که فرشته داره میره به آسمان و داره میاد بعضی میگن جادوه مرا چشم بند کردند. یعنی توفیق هدایت اصلند نصیب نمیشه الله تعالی دربار این افراد میفرماید و طبع الله علی قلوبهم خدا دلشون را مهر زده فهم لا یؤمنون اینها لا یعلمون نمیدانند و دربار همین منافقین خداوند میفرماید وقتی که شما ای پیامبر برگردید از تبوک شما به مدینه بروید این هم میایند عذر خواهی می عذر خودشون را میگن یا رسول الله فلان مریضی بود فلان مشکل بود خانومم این بود پسرم این بود حیوان مالم این اینطور شد هرچی میگویند شما عذرشون را گوش نکن بگو لا تعتذیرو عذر بیان نکنید ما به شما اعتماد نداریم دیگه صف صف بی اونها بگو که اعتماد شما از اونها سلب هست و بگو که خدا به من گفته در باره شما یا تذیرون اذا رجعتم ایلیهم ان سرزنش اسبر منافقین عذر پیش میکنم کنم بسوی شما اذا رجعتم وقتی که شما برگردید از غزوه تبوک بسوی آنان وقتی که عذر آوردن قل لا تا ای رسول الله به انها بگو لا تا تذیرو عذر خواهی نکنید عذر پیش نکنید لن نؤمن لكم ما هرگز به شما اعتماد نداریم اینجا ایمان به چیه چی؟ اعتماد تصدیق ای لن نصدقكم ما شما را تایید نمیکنیم لن نؤمن لكم چرا قد نبأنا الله من اخباركم الله بما خبر داده خبر شما را به بما گفت شما چرا نیامدید الله بما فرمود شما منافقید منش اینه دیگه اللہ فرمود که شما از روی نفاق نیامدید نه اینکه از روی اوزر نیامدید وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ یعنی در آینده هم خدای عز اعمال شما را نگاه میکوند و رسولش منظور اینه که نگاه میکوند شما واغیم بر میگردی توبه میکنید یا نه همین طور ثم بیدید سُمَّتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ سپس برگردانده می شوید در محضر اون ذاتی که هم داننده غیب هست و هم داننده شهادت است. یعنی ای منافق تو اگر پشت پرده کاری میکنی، هم خدا می بینه تو فکر می کنی کسی نمی بینه به ظاهر صفحه اول هستید اما پشت پرده چکاری دیگه میکنی؟ الله هم از غیب میداند، هم از حاضر میداند. داند فیونبعکم بما کنتم تعملون شما را خدا خبر میده که شما چه اعمالی انجام می دادید اعمال شما را خدا گوش زد می کنه. اما الله عزوجل و می فرماید که اینها برای شما سوگند یاد می قسم میخورند می خورند سیحلفون بالله لکم اذن قلبتم الیهم لتعرضو عنهم ان قریب انها سوگند میخورن برای شما قسم یاد میکنه وقتی که شما برگردید بسیار ها چرا قسم میخونن لطوع رزوان هم تا شما از اونها اعراض کنید شما ملامتشون نکنید الله میفرمه ای پیان من فعر رزوان هم شما هم اعراض کن شما هم اعراض کن یعنی چه بعضی میگویند ایراز کن یعنی قطع رابطه کن با اونها رویگردانی کن بعضی این تفسیر کردند یعنی دیگه تعویلیشون نگیر دیگه باشون حرف نزن اگر توبه کردن که کردن اگر نکردن دیگه شما اصلا بسوی اونها نگاه نکن پس بعضی اعراض را به معنی غتر رابطه گرفتند بعضی از مفسران میگن نه فا اعرزوان هم یعنی همون ترکیون اونها میخاند که شما ملامتشون نکنی ملامتشون نکن خدا تعالی به منافقین محلت میده خدا نمیخواهد که زود مچ دست اونها را بگیره بگذارونار اونها به حال خودشون این هم رجس اینها نجسند منظور از رجس و پلیدی چیه؟ اعمالشون پلیده اعمالشون گندست میشون و مقواهم جهنم جایگاهشون جهنم است ظاهر با شما اما تهدل با دیگران بظاہر مسلمان اما پشت پرده یهودی جذا به مکان و یکسبون این جزعشان هست به سبب اونچه که کسب کردن یعنی به سبب کفر و نفاق. و بعد اللله تعالی یکی از علامت منافقین را همین میفرماید که زیاد قسم میخورد. این سوگند خوردن زیاد چیز جالبی نیست. خدای تعالی هم در قرآن میفرماید که شما نام خدا را نشانه قرار ندهید هدف تیرایتون قرار ندهید هر چیز باشه بعضی ها تا کوچکترین چیزی ببین چرا این کار را کردیم میگه والله بالله تعالی چینی شد خود چینی از این همه قسم بخوری زیاد قسم خوردن سوگند خوردن این علامت منافقین است الله می فرماید یا احلفون لکم لترضوا عنهم برای شما قسم میخورند ای رسول الله تا که شما راضی بشید از اونها اما شاید شما را فریب بدن چون شما علم غیب ندارید شما از پشت پرده خبر ندارید شاید قسم دروغینشون را باور کنید و ازشون راضی بشید ولی این بدون که خدا راضی نمیشه خدا حقیقت را میدوند فَإِن تَرْضَوْا عنهم اگر شما از آنان راضی بشید فَإِنَّ الله لا يَرْضَا عن القوم الفاسقین اما الله راضی نمیشه از قوم فاسق از این قوم فاسق و بیدین الله راضی نمیشه چون الله از پشت پرده میدونه الله از اسرار دل و اسرار سینه و قلب خبر داره خدا هیچ وقت راضی نمیشه الاعراب اشد کفرا و نفاقا واجدره حال خدای تعالی زجر و سرزنش می کند اینها را با شدیدترین کلمات این را خدمتی شما عرض کردم. بیشتر این منافقین اعرابی ها بودن اعرابی ها یعنی بادی نشین سحرا نشین جنگل نشین اینها بیشتر رستاها و بادیه و تو جنگل ها زندگی میکردند. اطراف مدینه صحرا زندگی می کردن. خبر رسول الله دستور در همه برند هر کسی مسلمان است بیاد اینا را که گفتن اینا چون به به خاطر تحفظ خودشون ایمان آورده بودن در درون قلب خبری از ایمان نبود لذا الله تعالی این سحرانشین را و این بادیانشین نشینها را می فرماید الاعراب اشد و ونفاقا عربی ها سحرانشین ها بادیانشین ها از نظر کفر سخت و از نظر نفاق هم سخت ترند اشد کفرن اشد از این شهریها اونها بیشتر کفر دارند چون اینها کمی علم دارند اونها هیچ علم ندارند و اجدر الله يعلمو حدود ما انزل الله على رسوله و اونها سزاوارتر و لایق هستند که ندانند حدود اونچه که خدا نازل کرده و رسولش چرا چون تو سهران نشسته علم نیست یادگیری نیست لذا او بیشتر جاهل است او بیشتر بیخبر است از دستورات خدا و رسول خدا والله علی حکیم خداوند هم درباره این افراد هم علیم هست خوب میداند و کارهای الله با حکمت است و همچنین یکی از های دیگری این سهرانشینان این سهرانشینان منافق مطلقت سهرانشین نیست سهرانشینن خوب داریم در آیه بعدی خدا اونا رو تعریف میکنه. کنے بعضیها سوء استفاده می این آیات که نازل شده بعضیها هر رستایی را می بینه یا هر سهرانشین کوهنشین را می بینه میگه الاعراب و اشد و کفر و نفاقن در حالی که این آیه برای مسلمان نیست این آیه نازل شده برای منافق لذا سزاوار نیست که برای مسلمان خانده بشه اون مسلمان کوهنشین سهرانشین بعدیانشین آیه بعدی در باری او هست که ایمان دارد اما بعضی از زمین عربی های منافق وقتی پول میدن در رای خدا این اصلا کل منافقین خسلت تمام منافقین است. پولی در رای خدا میدن این پول را برای خودش تاوانی میدونه فکر میکنه که من ضرر کردم یک غرامتی هست باید بپردازم کسی که شما را گاهی دولت جریمه بکند دولت ماشین بازی را جریمه میکنه این جریمه دادنش خیلی سخته غرامت نه بعضی آدم مفت میگه ما داریم میدیم بعضی هم با پولیس درگیر میشند چون این پول واقعا سخت دادنش خب این عرابی که که صدقی میخوام بدند همون طور اصلا گویی که غرامتی دارم میدنم اینطور سخته سخت الله می و من الاراب من ما ينفق مغرما بعض از اعراب ها هستند که من يتخذ میگیرند آنچه که خرج میکنند آن را مغرما, مغرما مغرمی میگیرند یعنی غرامتی تاوانی احساس میکنند تاوان مالی کردیم و این اعرابیا دوست دارن هر چیز تر برای مسلمانان مشکلی مصیبتی تا از دستشون خلاص بشیم این طور انتظار دارند و یتربص بكم الدوائر انتظار میکشند برای شما حوادث را انتظار میکشند برای شما اتفاقات بد را علیهم دایره سوء الله می فرماید حوادث بد بر آنها خودشو به حوادث گرفتار می شوند والله سميع علیم خداوند هر چیز را شنواست و هر چیز را داناست دقت بفرمایید یک نکتهی که اهل تفسیر نوشتن خداوند اینجا بازی نشینها و شهرانشینها را کسانی که دور از شهرها زندگی میکنند، تو کوهها زندگی میکنند، تو روستاها زندگی میکنند، جایی که امکاناتی نیست، امروز گرچه اللهم دللا اکثر روستاها امکانات دارند، اما جایی که امکانات علمی نیست، امکانات سواد نیست، امکانات یادگیری نیست. اونا خیلی در خطر هستند به همین خاطر خدای تعالی این کلمات تند و شدید را فرموده مفسری میفهمند اگر کسی از مسلمانان چنین جاهای زندگی می کند حتما به فکر علم و سواد باشند حتما به فکر یادگیری باشند هم علم دین حلال و حرام و احکام خداوند و هم بقیه علوم باشند و الا اینها همینطور که خداوند فرموده واجدر و, و اللہ یعلم حدود ما انزل الله اینا لایقین هستند که حدود خدائی را ندونند اینا لایقین هستن که علمی در برای خدا و رسول داشته نباشند چون که اونجا جای علم نیست لذا این افراد کسانی که در صحرا هستند کسانی که در بادیه هستند کسانی که در کوه روستها هستند اینا سعی بکنند حتما از میان خودشون خودشون اگر همه نمی توانند یا کسی را ببرند اونجا علم یادشون بدند هم علم دین هم علم دنیا یا اینکه از میان خودشون افرادی را انتخاب بکنند برای یادگیری و علم بفرستند که اینها بیند علم یاد بگیرند فردا برند اونها را راهنمایی کنند هدایت کنند پس این برنامه ریزیل حتما باید کسانی که در جاهای دور دست و کور روستاها واقع هستند این داشته باشم. این عزیزان دعوت و تبلیغ گای میرن چنین روستایی خیلی دور افتاده همین الان در همین زمان ما می بینیم که از اولیات دین خبر ندارن کلمه را بخوان غلط میخوانه سوره فاتحه را بخوان اصلا بلد نیست نماز چند رکعتی میگن نمیدونم خب این در این زمان که زمان انفجار علم و نور هست هر کسی بلد هست اینها را در این زمان کسی که نداند این دیگر همون اوج محرومیت هست به همین خاطر این افراد در این زمان علم اگر به این صورت بمیرند پیش خدا جوابگو هستند باید اینها به فکر یادگیری دین خودشون و علم باشند اما همه احرابی مثل هم نیستند همه بادیانیش اینها مثل هم نیستند یک گروهی هستند مؤمن معتقد و مسلمان واقعی الله درین آیه اونها را تعریف میکنه. و من يؤمن بالله واليوم الآخر بعضی از عربیها اونهای هستن که ایمان می‌آورند به خدا آخرت و يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول و اون چیزی را که خرج میکند در راه الله این را وسیله قربت و وسیله نزدیک شدن به خدا میداند میگه من این پول را دادم این گوسفند را دادم این باعث میشه من به خدا نزدیکتر بشم. این باعث میشه رسول الله برای من دعای خیر بکند این را وسیله چی میداند؟ قربات عند الله وسیله قربت و نزدیک شدن به خدا و صلوات الرسول وسیله دعای پیغمبر پیغمبر برای ما دعا می کند دعای رسول الله برای ما برکت دعای رسول الله برای ما رحمت, برای ما رحمت, برای ما برای ما رحمت از این چی چیزی بهتر می تونه باشه الله تعالی می فرما این روز تانشین که این عقیده را دارد الله مطابق عقیده اون اعلام می کند انها قربت لهم خبردار این خرج کردن و این صدقی باعث قربت اونها میشه باعث نزدیک شدن اونها به خدا میشه هر کسی صدقی خرج بکنه باور بکنه که با این صدقی به خدا نزدیکتر میشه قرب الله حاصل میشه چون هر صدقی که خرج می‌کنی فرمانی از فرمانهای خدا را داری اجرا می‌کنی بنده ای که فرمان خدا را اجرا می‌کنه او محبوب خدا میشه او مقرب خدا میشه بله ان الله سیدخلهم الله فی رحمت این بیان قربت است چطور قرب خدا حاصل میشه الله میفرماید ان قریب این افراد را خدا داخل میگوند در رحمت خودش یعنی بعد از اون بر اینها رحمت میبارد بر اینها برکت نازل میشه اینها مورد لطف و عنایت ویژه پروردگار قرار میگیرند چه برکتی و چه خیری بزرگتر از این میدونه باشد لسا هرچی که در راه خدا بدی هرچی که در راه پیشرفت دین بدی این باعث چی میشه قرب تو به الله میشه اِنَّ الله غفور الرَّحِيمُ بدون شک الله تعالیٰ غفور هست بخشاینده هست و مهربان هست علاوه از این که از طرف خودش مهربانی و لطف کند. خب بعد از این ما می رسیم به تعریف اون مخلصینی که با رسول الله هم رائی کردند سبحان الله الله تعالیٰ هر جایی که منافقین را رد می کند منافقین را نکوهش می فرماید و مزمت می فرماید اونجا مخلصین را تعریف می کند که شما بشناسید در کنار رسول الله مخلصینی هم بوده اینجا اون مخلصینی که در هر حال در کنار حبیب خدا بودند از هیچ کمکی و از هیچ یاری دریغ نکردند از هیچ همکاری اونها دریغ نکردند نه مالی نه جانی نه کمکهای دیگر اینا کیا هستند صحابه رسول الله صحابه باز چند دسته هستند اینجا خدای تعالی سه گروه از صحابه رزق می کند گروه اول مهاجرین اونایی که اول اول استقبال کردند اونایی که قبل از همه آمدند و پذیرفتند در اون روزهای سخت شکنجه ها را هم قبول کردند، تاوانه ها را هم قبول کردند، آخر ترک وطن کردند، هجرت کردند، قوم و خیش و تبار خودشون را گذاشتند، خانه های خودشون را گذاشتند، باقی، زمینی، هرچی داشتند گذاشتند، خاطر الله از همه سرف نظر کردند. سبحان الله مهاجر واقعا خیلی قربانی میده چرا هجرت میکنی چرا خونت برات کی میمونه برای هر کی میونه ببونه من بخم دینم را حفاظت کنم مهاجر یعنی همه چیز را ترک میکند وطن را ترک میکند دین را محکم میگیرد خب این چنین فرد پیش خدا خیلی عزیز است پیش خدا خیلی گرامی است الله تعالی اولین گروه گروه مهاجرین را بیان فرماید دومین گروه که اینجا می فرماید تعریفش می, فرماید می گروه انصار هستند انصار اونهایی که با جان و دل پذیرایی کردند انصار اونهایی که استقبال کردند این را خدمت شما عرض بکنم که انصار چطور درست شدند وقتی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم در مکه اعلام کرد اسلام را و دعوت داد خبرش در مدینه پیچید این زمانی بود که خیلی سخت بود برای برای رسول الله و برای صحابه که کجا برند منتظر بودن خدا بگه کجا برند در اولین حرکت شش نفر از مدینه آمدند به حج آمدند اما در ایام حج تحقیق کردند در رسول الله شنیده بودند تحقیق کردند آخر به دلشون نشست این رسول خداست به صورت مخفیانه در میدان در دامنه کوهی یا اون سر کوهی اونجا بیعت کردند با رسول الله بیعت کردند این بیعت را میگم بیعت عقبه عقبه گردن کوه را میگویند اونجا بیعت کردن گفتن یا رسول الله ما ایمان میاریم اینا رفتند رفتند به بقیه گفتند اما غاچاغی به صورت مخفیانه سال بعد حج دوباره شد دو سال طول کشید سال بعد در ایام حج دوازده نفر آمدند از این دوازده نفر پنج نفر همون قبلی بودند شش نفر بودند یکی نیامده بود پنج نفر قبلی بودند هفت نفر جدید بودند این جدیدها آمدند و با رسول الله صلی الله علیه وسلم دوباره بیعت کردند و از رسول الله دستورات جدید گرفتند و رسول الله انها اینا هر فرستادی نه دوباره رفتن بعد از حج اینا همه به صورت قاچاقی بود آمدند مدینه کم کم فعالیت کردند فعالیت کردند افرادی بیشتری را سال سوم در این اقبه بیعت عقباء بیعت عقباء هفتاد نفر شرکت کردند هفتاد نفر از اهل مدینه اینها آمدند با رسول الله بیعت کردند و اینها اعلان کردند یا رسول الله ما تاخر استادیم جان بخای جان مال بخای مال وطن بخای وطن هر نو کمکی شما اگر بخایید ما مساعدت میکنیم و اگر پیش ما بیایید ما استقبال میکنیم شهر ما ما قول میدیم که ما با تمامه توانی که داریم از شما و از مسیر شما و از خط شما ما دفاع میکنیم رسول اکرم صلی الله علیه و اونها را تذکر و هشدار داد گفت ببین جان شما امکان داره در خطر باشه زن و بچه شما در خطر باشه گفت یا رسول الله به خاطر شما همه خطرات را مقبول میکنیم ما که گفتیم از شما حمایت میکنیم حمایت میکنیم فقط شما تشریف بیارید بالاخره این هفتاد نفر که برگشتند بعدان الله عزوجل دستور داد هجرت کنید کم کم هجرت شروع شد به مدینه صحابه رفتند و همون زمان نه گفتن یک کسی را بفرستید به ما یاد بده آموزش بده یک سال قبل از هجرت رسول الله صلی الله عليه و سلام مصعب ابن عمر را فرستادند سبحان الله مصعب جوان شیک و رانایی بود مصعب نازپرورده مکه بود از خانواده بسیار ثروتمندی بود مصعب کسی که در احد شهید شد اما قبلا که در مکه بود بقیه مردم می گویند هر وقتی که از کوچه میرفتیم، بوی عطر می رسید می دونیستم از اینجا مصعب راه رفته چنان عطر او تمام مکه را عطرالود کرده بود صبح یک نو چادر می پوشید اون زمان پیراهن می چادر بود صبح یک نو چادر می پوشید بعد از دور یک نو چادر می چادر چادرها یمنی و شامی و عبری شم همین چادرها خیلی سرمایدار بود مصعب ابن عمیر اما وقتی که ایمان آورد همه چیز را از دست داد آخر به عنوان معلم اهل مدینه آمد و اینجا تعلیم داد مردم مدینه را یک سال قبل از حجره بعدا در احد شهید شد اونجا داستانش را خاندید که کفنش کفاف نکرد بعدن بر روی پاهایش ازخر گذاشتند الف گذاشتند که پاهایش پوشیده بشن نصف بدنش با کفن اینطور در این عالم ارز کنم که بیچارگی او را دفن کردن یعنی هیچ چی نداشت از مال و دنیا اینطور الله عزوجل اینها را امتحان کرد بلاخره دومین گروه که اینجا هستند انصار مدینه هستند سومی گروه که الله تعالی میفرماید اونای که بعدن آمدند اونای که بعدن آمد اما بعد از چی این را توضیح میدم اول آیه را ترجمه میکنیم الله میفرماید والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار اونای که سبقت گرفتند و اول اول بودند از همه سبغت گرفتن در ایمان آوردن قبل از همه ایمان آوردن قبل از همه حجرت کردن قبل از همه نصرت و یاری کردن قبل از همه خرج کردن در راہ الله و السابقون الاولون انها ایک پیشی گرفتن و اولی بودن از مهاجرین و انصار اون مهاجرین ایک اول اول اولین کسی کی ایمان آورد ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ علی مرتزی رضی الله تعالیٰ عنہ و بعدا ابو بکر دعوت داد بقیه را بقیه خیلی ها مثل حضرت عثمان و امثالهم اینا به دعوت ابو بکر ایمان آوردن اینا همه جز اولین هستند من المهاجرین والانصار چه مهاجرین چه انصار خب اینها که اولین هستند اولین تا که حساب میشند بعضی از علماء میگویند که تا تحویل قبله اینها جز اولین هستند یعنی بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کردند تا 17 ماه به سمت بیت المقدس نماز می‌خوندند تا این 17 ماه هر کسی اسلام آورده بود هر کسی ایمان آورده بود چه مهاجر چه انصاری نه جز اولین ها هستند این 17 ماه هجرت بعضی میگن نه اولین اونها حساب میشن که تا حدیبیه تا صلح حدیبیه چون صلح حدیبیه خیلی سخت بود بعد از اون الله فرج آورد شما خواند در سوره فاتح لذا تا صلح حدیبیه که 1400 نفر بودن در حدیبیه اینا تمام جزء اولین هستن چه مهاجر بودن چه انصاری بودن اینا اولین هستن بعد از صلح حدیبیه کسانی که ایمان آوردند اینا چیند اینها والذین تبعوهم کسانی که را پیروی کردن با احسان با اخلاص پیروی کردن نظری نفاق. لذا الله عزوجل فرماید این گروه سه گروه است صحابی شدن. السابقون الاولون من المهاجرین، السابقون الاولون من الانصار، و همچنین الذين تبعوهم کسانی که بعداً پیروی کردن با اخلاص. این هر الله تلا برایشون اعلام می کند اعلام پاداش. اولین اعلام رضایت خداست است بهشت روحانی اسمش هست جنت روحانی هیچ سعادتی برای من و شما از این بزرگتر نخواهد بود که رب اعلام کند ای بنده من ای بندگان من من از شما راضی هستم اینها را الله تعالی می فرماید رضی الله عنهم الله راضی شد از اینها اینها با اون از خود گذشتگی با اون رشادتی که از خود نشان دادند الله از اینها راضی شد ورضو عنه اینها هم از الله راضی یعنی هر چی خدا احکام نازل کرد دستور داد جهاد هجرت نماز زکات اینا راضی هستند خدا هر چی که میگه از سوی محبوب بیاید خوش آید ما راضی و با جان و دل انجام میدیم اما منافقین راضی نبودند. تا دستوری آمد یا رسول الله چرا جهاد را لازم کرده خدا؟ چرا تاخیر نداشت چند سال بعد؟ لذا اینها نه. این چی که خدا برای اینها گفته اینهام راضی از الله. این جنت جسمانی روحانی هست. جنت جسمانی را خانیم و لهم جنات تجری تحت الانه خالدین دین فیها ابدا. آماده کرد الله برای اینها جناتی که جاری هست از زیر درختهایش اون جنات نهرها همیشه در اون جنات بصورت ابد می الله اللہ می فهمد ذالک الفوز العظیم این رستگاری رستگاری بسیار بزرگی هست ببینید کسانی که از چه اولون هستن چه بعدی ها چون بعضی از صحابه آخران ایمان آوردن قبلا هم خدمت شما ارز کردم بعضی از مردم جرعت میکنن اونها را بد و بیران میگویند. در حالی که صحابی هر چی باشد. اینجا شما مشاهده فرمودید چه سابقون اولون چه کسانی که بعدن ایمان آوردند. بعد از فتح مکه ایمان آوردند. از همه خدا راضیه. رضی الله عنهم و رضو عنه. ولو اینکه عملی انجام ندهد کوچکترین عمل اونها از بزرگترین عمل ما اجرش بیشتره. این رسول الله صلی الله علیه و بیان فرمودند. در صحیح بخاری هست رسول الله فرمودند درباره صحابه و یاران خودش. آن حضرت درباره آینده پیشگویی کردند که کسانی خواهند بود نسبت به صحابه بدوبیرا میگویند. ان حضرت فرمود فلو ان احدكم انفق مثل احد اي انسان های بعدی اي نسل های بعدی اگر یکی از شما مال خرج کند در راه خدا به اندازه کوه احد مال داشته باشد به اندازه کوه احد کوه احد خیلی بزرگه کسانی که دیدند کسی نمیتونه سر کوه احد بره لذا به اندازه کوئی اهد شما مال خرچ کنید. ما بالغ مد احد ولا او. این خرچ کردن شما از نظر اجر به اندازه یک مد دی صحابه نمی رسد. مد کمتر از یک کیلو هست. مد تقریباً 780 گرم است. اون زمان بالاخره می گفتم وضوی می گرفتم با دو تا مد یعنی با یک و نیم لیتر آب فرض کن. اگر صحابه به اندازه نیم کیلو هفصد و هشصد گرم خرچ بکند خورما بده شما به اندازه کوی احد بوده این کوی احد شما به اندازه نصف اون مدش هم اجر ندارد یعنی اون ویژه هست اون خاص هست اون اخلاص داره اون در کنار رسول الله بوده اون یک ویژگی داره که ما تا, تا قیامت سر به سجده بگذاریم به اون ویژگی نمیرسیم. لذا این انسان های ها مقدس، به اینها نباید کسی لب گشایی بکند. آخرت خودش را خراب میکند. لذا الله میفرم: "ذالک الفوز العظیم". این هست رستگاری بسیار بزرگ. وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق بعض از منافقین را الله معرفت میکند ای پیامبر شما انها را نمیدانید بعد از ذکر صحابه بحث منافقین هست الله می فرماید وممن حولكم من الاعراب منافقون بعض نهای از نهایت اطراف شما هستند از أزدهاتها وبعض ينشينها منافقاً ومن أهل المدينة بعضهم أز أهل مدينة مرضوا على النفاق خو رفتن بر نفاق يا إنك عادت كردن بر نفاق مرضوا بعضي قفتن أسبتو وأسررو ثابت قدم ماندان و إصرار بر نفاق دار هميش منافقت ميكوند لا تعلمهم نحن نعلمهم ای پیانبری من شما اونها را نمی شناسید ما می شناسیم سنعذبهم مرتین ان قریب ما اونها را عذاب می دیم مرتین یعنی دو برابر دو بار یعنی دو برابر ثم یردون الى عذاب عظیم سپس برگردانده دیمیشن به عذاب بزرگ یعنی عذاب آخرت اینجا هم عذابشون دو بله هست اونجا هم این منافقینی که با شما حق بازی می کنند و آخرون اعترفوا خب بحث منافقین هم گذشت بحث اون مؤمنینی که نداشتند و گریه کردند و از بیبزاعتی شرکت نکردند اونها هم گذشت اما گروه سوم این گروه سوم مسلمانانی هستند که اینها فوراً توبه کردند ببینید این صحابه صحابه خطاکاری هستند یہ تفسیر جالب نوشته بود نوشته بود نیکی های صحابه هم برای ما الگو هست و گناهی که صحابه میکنه هم برای ما الگو هست چطور گناهش برای ما الگو هست ما هم گناه میکنیم ولی اونها وقتی که اشتباه میکردن فوراً می میوردند هنوز رسول الله نرسیده خودش را به ستون بسته و توبه میکنه یعنی این برای من تو باید الگو باشه که گاهی ما هم انسانیم از دست ما اشتباهی سر فورا توبه بکنیم نگذاریم دیر بشه نگذاریم سیاهی گناه بر قلب مثل پرده ای همه قلب را بگیرد هر روز گناه را ادامه بدیم بگیم وقتی که سننم به بالا رسید بعد توبه می معلوم نیست سن یاری نداد لذا صحابه را الگوی خود قرار بدهید همونطور که صحابه در نیکیها از همه پیش پیش بودن منا برای جان پروار داشتن نه برای مال از اسلام دفاع کردن هر وقتی که اسلام به جان شما نیاز داشت برای جان پروار داشته نباشید به مال شما پر نیاز داشت برای مال پروار داشتن نباشید مسلمانی یعنی این و بعد در اون اشتباهات هم صحابه را الگو قرار بیده اشتباهی که کرد فورا توبه کرد ببین الله تعال چطور تعریف میکنه؟ از این هایی که کردن الله می فرماید و آخرون اطرف آخرین هستن دیگرانی هستن که ا طرف بدونو کردند. خلطو عملا صالحا و آخر سیئا این ها کسانی هستن که غاطی کردند عمل صالح را و آخر سیئا و دیگه عمل بد را عمل بد خوب را با هم غاطی کرده یعنی هم مومن است، اما به جهاد شرکت نکردین عمل سیئه هست الله یفرماید عَسَ اللَّهُ عَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ الان که فورا توبه کرده وعده خدا است اصل اللہ وعده خدا است وعده الله است که این توب علیهم این بر رجوع کند یعنی توبه را قبول کند ان الله غفور الرَّحِیم همانا الله بخشاینده است و مهربان است هم انها را میبخشه که انها این طور توبه کردن هم الله تعالی از طرف خودش بینها لطف میکنه بیکران میده لذا ببینی توبی صحابه حال به پیغمبر چی میفرماید خداوند که خوز من اموالهم صدقتا از مالهایشون صدقی بگیر تو پاکیشون پاکشون بکن چکار کن اونا پاک بکن و تو زکیهم بیها بوسیل ایمال اونا را تذکیه کن و صلی علیهم بر اونها درود بفرست یعنی دعای رحمت کن بر اونها چه کن؟ دعای رحمت کن در این آیه چند نکته هست که دقت شما را می طلبد اول اینکه انسان انسان هست جایز خطا هست اشتباه می کند گاهی اشتباهی اگه از ما سرزد توبه کردیم به توبه اکتفا نکنید خدا ایمان توبه کردن دوباره نمی کنم به این توبه اکتفا نکن بعد از توبه کار نیکی هم انجام بده خودت را جریمه بکن اگر مال داری مال بده صدقه بده اگر مال داری صدقه بده چقدر صدقه بده هر چی بیشتر بهتر چنان صدقه بده که بر نفست فشار بیاد یک کسی مثلا الله بهش مال داده ایک گناهی کرده الان بیاد یک میلیون بده یک میلیون از کدوم قسمت مالش کم میشه این نه پولی بده که بر نفس گران معلوم میشه که نفس آهش بیاد بیرون که این همه پول یک جدت چرا تو نفس مرا فریب دادی لذا نفس خودش را تنبیه بکند صحابه که توبهشون قبول شد آمدن گفتن یا رسول الله همین مال سبب شد که ما نه آمدیم به jihad لذا این مال تو تحویل بگیر در رای خدا ما دیگه نمیخایم بیزار از این مال رسول الله گفت نه ای چیزی برای ذره بچی بیزارید گفت نه ما کل مال را میخایم بدیم آخر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک سوم را گرفت از یک سوم را در رای خدا دادن دو سوم برای شما ماند چنین صدقه ای چنین نفست رو تنبیه بکن یعنی که وقتی که نفس خیلی عذیتید کرد تنها با صدقی بعد از اون بگو چنین اشدوائی کردی صد رکت نفس بخاند صد رکت نفس که بخاند پدرش در میاد داغون میشه این نفس باشه دوباره شما به سمت گناه نمیبره لذا انسان تنبیحی بکنه این را که واقعا به دردش بیاد یا این که ده روز روزه بگیر بیست روز روزه بگیر چیزی که بر نفس شاق باشد گرام باشد از این جا همین معلوم میشه که ای رسول الله خدا توبهشون را قبول کرد تو هم مالشون را به عنوان صدقه بگیر و پاکشون بکن. صدقه انسان را پاک میکنه بعضی گفتن تو تا هم این مال اونها را پاک چون چونکه ما در آیه قرآن کریم داریم ان الحسنات یذهبن السيئات یعنی کسی که عمل سیئ انجام میده کار بدی انجام میده و گناهکار میشه بعدن توبه بکنه بعدن حسنات این سیئات و اثر سیئات را از بین میبره حسنات از بین میبره یعنی از به خدمت شما که نیکی بعد از اون بکنه نیکی هر نیکی باشد عرض کردم بشینه ده روز روزه بگیره بشینه چند رکعت نفل بخانه بشینه مال بده در رای خدا تا اینکه بالاخره اون اشتباهش جبران بشه معلوم میشه خدای از زوجل گرچه مارا جریمه نکرده بعد از گناه مال بده بعضی گناهان چرا مثلا کسی قسمش رو میشکند کفار قسم هست یا غلامی آزاد بکن یا ده مسکین رو برو براشون یک دست لباس بخر برای هر یک دست لباس برای ده مسکین یا ده مسکین رشام شام و نهار بده این جریمت هست یا بعضی ها بالاخره اشتباهات دیگری می کنند هم جریمه های آمده کفارات اما هر گنای جریمه نه آمده خودت خودت را جریمه کن از اینجا معلوم میشه چه جریمه مالی چه جریمه جانی بله الله می فرمات خود من اموالهم صدقتا تطهرهم از مالشان بگیر صدقی که اونها را پاک بکنی و تزکیهم بها به وسیله مال اونها را تذکیه بکنی ببینید تزکیه هر چی که خلاف نفس باشه انسان را تذکیه میکنه انسان را می سازد لذا به اندازه ای کردم که خلاف نفس باشه بر نفس گران معلوم بشه وصلی علیهم بر انها بر انها درود بفرست درود بفرست یعنی چه یعنی دعای خیر بکن دعای رحمت کن کسی خرمائی زیادی آورد صدقیداد رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمود اینا را آورده گفتند که آل ابی اوفا آورده گفت اللهم صلی علی آل ابی اوفا رسول اللہ دعا کرد ہر کسی که می آورد رسول اللہ براش دعا می کرد لذا کسی که متولیه امور مالی هست صدقات هست در هر جایی کسی که مثلا در یک مجموعه دینی هست مدرسه دینی هست اونجا امور مالی در دستی اوه او دیگه سنت بر او این هست که وقتی که مسلمان میاره برای مسلمان دعا بکنه برای مسلمان چیکار بکنه دعا بکنه چرا چون که ان صلاتک سکن اللهم، دعای تو باعث سکون و آرامش میشه مال دادن خیلی سخته یک جا از مالت یک بخشی را جدا کن بده بالاخره این بر نفس گران میشه نفس بیچار زخمی میشه این دعایی که اون میکنه دعایی که رسول الله میکنه یا هر کسی که انسان صالحی هست این در واقع مرهمی میشه بر اون زخم این در واقع آرز کنم آرامشی میشه وقتی که مثلا شما مال تر می‌دی اون میگه الله تعالی در عوض این مال در جنت فردوس چند برابر بهت بده بی این انسان را خوش میکنه. انسان باید باور داشته باشه که این دعا قبول میشه این آرامش میده به انسان الله می فرماید ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم الله شنوا هست هر کسی اعتراف می کند گناه خودش را الله می شنود علیم چیم بحث ندامت و توبه این هست. و بعد الله تعالی برای آینده هم ترغیب میده که هر وقتی که توبه می کنید صدقه هم بدهید صدقه هم بدهید الله می فرماید علم ان الله هو یقبلو توبت عن عباده آیا نمیدانند که همانا الله قبول می‌کند توبه از بندگانش و یا خود صدقات و صدقات را می‌پذیرد و آن‌الله هو التواب الرحیم و همانا الله توبه پذیر و مهربان هست در راه الله بدهی الله می‌پذیرد و قل عملو فسیر الله هو عملکم بعد از این توب توبه کردی عمل کنی دیگه نماز بخونید نیکی کنید الله می فرماید و قل اعملوا بگو به عمل کنید فسیر الله عملكم ورسوله ان قریب می بیند الله عمل شما را و رسولش می بیند و المؤمنون مؤمنون می بینند همه می بی شما عمل میکنی الله نگاه میکنه شما چیکار میکنید چطور نماز میخونی چطور روزه میگیری چطور دعا میکنی همه چیز را خدا می بیند و ستردون ال عالم الغیب والشهاده ان قریب شما برگردان می شوید در محضر اون ذاتی که غیب میداند و حاضر میداند ظاهر میداند و باطن میدانت مخفیات شما را هم میدانت و علنیات شما را میداند هر چی که تنها کردی هم میدونه هر چیزی که کر علنی کردی هم میدونه اونی که در جمع و در مسجد میکونی انجام میدی هم میبینه اگر خانه کار دیگه کردی هم میبینه همه چیز را می بینه. انسان وقتی که عقیدهش شیم باشه که خدا همه جا می بینه. پس در مسجد هم نماز میخانه. اونجا تو تکانه تاریک هم نماز میخونه. اونجا چه معتقد خدا می بینه. اینجا هم دعای نیایش میکنه. اونجا هم دعای نیایش میکنه. اونجا دیگه کاری دیگه نمیکنه. اونجا دیگه از خدمت شما تخلف نمیکنه. اونجا گناه و ماسیت نمیکنه. اونجا از طریق این فضا های مجازی ارتباط نادرست برقرار نمی کنه چون میداند که خداوند عالم الغیب و شهادت است هم از غیب میداند از اونایی که نادید هستند دیده نمیشن هم خدا میداند و هم از حاضر میداند فینبئ بکم بما کنتم تعملو خدا به شما خبر میده شما چیکار میکردید و اخرون مرجون لامر لایق گروه از صحابه بود که ده نفر بودند توبه قبول شد اما گروه دیگری هستند که امیدوارند این همون گروه سوم هستند اینها سه نفر بودند یکی حضرت کعب کعب ابن مالک انصاری دوم حضرت مراره بن ربیع سوم حضرت هلال ابن امیه که بعدن درباره اینها ما به تفصیل بیشتری میخوانیم. چون آیاتشون جلوتر میادید. اینجا خدای تعالی میفرماید که امیدوار هستن فقط. اینها امیدوار هستن. امیدوار چی هستند؟ امیدوار امر خدا هستن. که خدا برای اینها فیصله خیر بکند. الان خدا یا عذابشون میده یا توبهشون را قبول میکنه. و آخرون مرجون لعمر الله یعنی گروه دیگر هستن که امیدوارن به امر خدا، اما هم یا اینکه خدا اینها را عذاب می ده و اما و علیهم یا خدا توبهشون را قبول می والله علی حکیم خداوند خوب میداند اخلاص و غیر اخلاص را و در کارهای خدا حکمت است خب ببینید اونها توبهشون قبول شد اینا امیدوار استن اینا چرا توبهشون قبول نشد؟ فرقشون چیه؟ امام راضی رحمه الله در تفسیر کبیر نوشته که الفرق بین القسم سانی و سالس فرق بین این دو قسم دوم و سوم اونا را خاندیم که توبهشون قبول شد اینا هنوز ادامه داره تا پنجاه روز ان نوای که ساره او ایل توبه اونا زود رفتن توبه کردند هنوز رسول الله بر رفتن توبه کردند و ها اولای علم یوسا ریو این سه نفر زود توبه نکردند اول رفتند گفتین یا رسول الله عذری نداشتیم. بعد برگشتند و توبه کردند چون دیر کردند به خاطر این دیر کردند تنبیه شدند اونطوری که مفسری میگه لذا این را من برداشت میکنم خدمت شما میگم که ما اگر زود توبه بکنیم خیلی فرق داره با اینکه دیر توبه بکنیم اگر اشتباهی میکنیم فورا توبه بکنیم فورا توبه کردن خیلی بهتر و راه است از اینکه انسان دیر توبه بکند لذا الله تعالی می اینها امیدوارن هنوز اعلام پذیرش توبهشون اینجا نیست بعدم میاد فعلا اینها همینطور می گزرانند کل داستان را اونجا که آیه بیاد خدمتش معرض می کنم اما والذین اتخدوا مسجدا ضرارا اینجا خدا بحث دیگری را آورد بحث مسجد زرار ببینید این چون که در همین ایام تبوک بود خدای عزواجل ذکرش را اینجا فرموده منافقین مسجدی درست کردند نزدیک مسجد قبع در همون محله قبع گفته یا رسول الله مسجد فاصله داره و بعضی از ما معذور هستن پیر و پیرمرد هستن نمیتونم اونجا برند ما مسجدی درست میکنیم تا بتونیم نماز بخونیم مسجد را درست کردم اما نیتشون چیزی دیگه بود و مسجد را داشتم تکمیل می کردم به رسول الله گفتا یا رسول الله شما تشریف بیارید منطقه ما روستایی ما چون رستای با الان در وسط مدینه واقع شده شما تشریف بیارید نماز را شما افتطاب بکنید شما شروع بکنید می خواستن که رسول الله آغاز بکند تا کسی به اونها شک نکند بعد از اون دیگه هر توتی او هر مکری باشد از امونجا شروع کنند و کار بکنم بر علی مسلمانان اصل مسجدی نمی خواستم بسازن یک سنگری بر علیه اسلام و مسلمین لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم داشت به تبوک میرفت به اینها قول داد گفت من میرم تبوک از اون طرف برگردم میام مسجد شما نماز میخانم در مسیر بود در راه بود ببین پیغمبر علم غیب ندارد از پشت پرده خبر ندارد که چی خبر است الله تعالی به دستور دار لا تقم فیه ابدا ما بعدا بری تو این مسجد نماز بخانی ها بعدا نماز نخوان، اونجا قیام نکن این مسجد مسجد زرار است این مسجد به منظور ضرر رسانی و آسیب رسانی به شما مسلمانان درست شده این مسجد را تخریب کنید رسول الله صلی الله علیہ وسلم چند نفر را دستور دادن یکی از اون افراد وحشی بود رضی الله عنه قاتل حضرت حمزه اینجا دیگر وحشی برای هر کاری آماده بود گفت بریم مسجد را خراب کنید لذا اینها مسجد را درست کرده بودم به این نیت اصلش این مسجد را من خدمت شما عرض بکنم یکی از منافقین به نام ابو عامر محل مدینه بود این از مدینه رفت وقتی که رسول الله به مدینه آمد رفت مکه اونجا با اهل مکه همراه شد وقتی که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مکه رفت کرد و به طرف هنین رفت این رفت با اهل هنین در جنگ شرکت کرد امین ابو آمر خیلی سرسخت بود و خیلی دشمن اغدهی بود در جنگ هنین شرکت کرد و بالاخره وقتی که در جنگ هنین ابتدام خاندیم مقدار پیروز شدن بعدن که شکست خوردن او از اونجا فرار کرد ابو آمر فرار کرد بقیه رفتم تایف تا بعدن تسلیم شدن اما ابو آمر رفت به طرف شام شام اون زمان ارز کردم تحت سیطره روم بود از اونجا نامی نوشت به هرقل روم به قیسری روم به قیسری روم نامه نوشت گفت که ما عرب هستیم و این پیامبر ادعای نبوت میکنه روز به روز در پیشرفت میکنه آخر خطر برای ما و برای شما هست ما را کمک کنید تمام می خایم اونجا فعالیت بکنیم او گفت چه کمکی میخایید گفت ما می یک مرکزی درست کنیم که تو اون مرکز فعالیت های خودمون را ادامه بدیم بلکه موافقت شد اون گفت کمک مالی میکنم این ابو آمر پیغام فرستاد برای منافقین مدینه گفت که شما یه جایی درست کنید پول من میفرستم بعد اونجا را در واقع محل مشوره و جلسات خودمون میگذاریم منم گاگاهی مخفیانه میام اونجا با شما میشینم چکار بکنیم یعنی میخواستند کار و مبارزه را بر علیه اسلام شروع کرن مرکزی در خود مدینه درست کرن لذا اینها و هم ابو عامل گفت که گا گای نماینده از رومیت همونجا مستقر باشد تو همون مسجد همه خودمانی باشید خودتون باشید لذا اینها در محله خودشون این مسجد را بنا کردند رسول الله صلی علیه و سلم وقتی که آمد در مسیر این آیات نازل شد اللهم يفرمايت والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ان که گرفتم گرفت تم مستری را زر الرسانی و کفرم بمنزور کفر و شایع اشاعی کفر و تفریقا بین المؤمنین و هدفشون جدائی بین مؤمنین بود از اونجا می‌خواستم بین مسلمانان و صفوف مسلمانان شکاف ایجاد کنن و ارصادم به این چند هدف است هدف اول انضرارا منزورشون زر الرسانی هدف دوم کفرم منظور دومیشون دو اینه که کفر را می‌خواستن ترویج بدن هدف سوم تفریقا بین المؤمنین بین مؤمنین می‌خواستن که اختلاف درست کلام مسلمانان را به جان هم بیاندازن هدف چهارم ارشادا لمن حارب الله و رسوله میخواستن یک کمینگاهی کمینگاهی یعنی یا محل مخفیگاهی درست کنن برای اون انسان بدبختی که با خدا و رسولش قبلا جنگیده یعنی همون ابو آمر همون ابو عامر که راهبی شده بود مسیحی شده بود این که برای او مخفیگاهی درست کنند برای او سنگری که در از اون سنگر فعالیت های خودش را بر علیه مسلمانان شروع بکند درست کنند الله می وقتی که پیغمبر را خدا دستور داد الله تعالی پیشگویی فرماید شما که برید سوگند ما نیت خوبی داشتیم ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنا انها حتماً حتم سوگند میخورند ما اراده نداشتیم مگر اراده خوب داشتیم اراده خوبی داشتیم اراده این که اینجا آسایش باشد به راحت بتونی نماز بخوانیم والله یشهد انهم لکاذبون الله گواهی میده اینا میگند الله می نه ندرگو هستند شما باور نکنید از به خدمت شما بعضی از مردم ما الان گاهی میشنویم شنویم می بینیم مساجد رغابت هایی دارند این رغابت ها ولی خوب نیست مساجد برای عبادت هستند و بعضی ها افراد می کنند تندروی می کنند بعضی افراد مساجد به افراد مساجد دیگر یا به مسید دیگه میگه مسید زرار این ندرست است ببین مسید زرار چهار هدف داشت یکی هدفشون ضرر رسانی به رسول الله بود دوم هدفشون ترویج کفر بود سوم هدفشون اختلاف بین مسلمانان بود چارم حدفشون این بود که یک مخفیگاه و کمینگاهی درست کنم برای اون دشمن سرسخت کی گریخته بود آیا در این مساجد مگه همین برنامه هاست که ما گاهی میگیم مسجد زرار یا مدرسه ضرار خب درسته ما همیشه فاصله ها را رعایت کنیم فاصله بین مساجد یک مقداری باشد حد یک کیلومتر. پانصد متری دو مسجد از هم دیگه فاصله داشته باشه. فاصله کمتر اگر باشد درست نیست. ولی خب یک وقتی مردم میبینی که زمینی را وقف میکنند. یا میخواهند که خودشو مسجدی داشته باشند. یک نیکی بکنند. درست نیست که اینطور مساجد را مسجد زرار لقب بگذاریم. مسجد ضرار همونه که هدف درست کردنش تخریب باشد و ضرب زدن به اسلام باشد به قرآن باشد. لذا الله می فرماید لا تقم فيه ابدا ماییست در این مسجد ابدا هرگز نئیست چرا چون که در کنارش مسجدی هست که بر اساس تقوا گذاشته شده این مسجد مراد کدوم مسجده بعضی میگن مسجد و نبی مراد است شما الان برید اونجا بالای مسجد نبی اونجا کتیبه نوشته لمسجد اسس علی تقوی اعتقاد دارن که مسجد نبی مراده بعضی معتقدم مسجد قبا مراده اینجا ظاهر همینه چون مسجد زرار در محله قبا بود رسول الله صلی الله علیہ وسلم هر هفته به قبا می رفت روزهای شنبه نماز فجر در چی می خاند؟ در مسجد نبی می خاند. بعدن تقبا می میرفت وقت اشراق میشد نماز اشراق را هر شب می اونجا می میخات لذا الله می فرماید لا مسجدن اسس على التقوى من اول يوم احق احق ان تقوم في يفزله مسجد قباءس یا مسجد النبی یا هر مسجدی که مسجد اساس بر اساس تقوا باشد البته ام مسجدی که اساس گذاری شده بر تقوا من اول یوم از روز اول احق ان تقوم فی ام مسجد سزا و اقتر است لایق است با ارزش تر است تو اونجا بیستی بری نماز بخانی این فضیلت خود مسجد بود فیه رجال فضیلت مقتدیای مسجد فیه رجال یحبون ان يتطهروا در مسجد مردانی هستند که دوست دارن خیلی پاکیزگی را خیلی پاکیزگی کن از مقتدیان قبع پرسیدن که شما که خدا شما را دستور داده خیلی پاکیزگی میکنید شما مگه وقتی وضوح میگیرید چی کار میکنید که بقیه ندارن اون زمان آب کم بود آب کمتر استفاده میشد و اون زمان شما میدونید که بیشتر مردم برای بعد از دستشویی مردم از سنگ و کلوخ استفاده می کردند برای پاک کردن و نظافت و از طرفی میده هم میده های خشکی بود مثل امروز نیست امروز وز مردم خراب بدون آب چاره نیست اما اون زمان نه میده خشک بود نیازی نبود به آب ولی این اهل قبا اینقدر احتیاط می کردند که هم از سنگ و کلوخ استفاده می و بعد از اون از آب هم استفاده می کردن. گفتم ما خیلی در پاکیزگی الان این یک جزئی هست این نکته می خواهم ارض بکنم که اسراف نباشد در آب ولی هر اندازه که ما بیشتر در پاکیزگی تأکید بکنیم از نظر مسواک از نظر استنشاق از نظر شستن بدن تمیز کردن هر اندازه بیشتر باشد این محبوب, محبوب خداست خدا پاکیزگی کنندگان را کسانی که پاکیزگی را دوست دارند و پاکیزگی زیاد می کنند اونا را خدا دوست دارد ببینیم اینجا خدا می فرماید والله یحب المطحرین خدا دوست دارد کسانی را که پاکیزگی را اختیار می کنند لذا هر اندازه که ما نظافت رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی به نظافت تاکید داشتن بعضی مردم هستند توجه نمی کنند هر نوع غذایی می خورند غذاها غذاهای امروز متلون هستند رنگ برنگ هستند انواعی از کنم که غذاها الغذا می میزن غذاها یک بوی خاصی می گیرند بعدن دهان انسان بو می ده مسواک استفاده نمی کنه خود رسول الله اینقدر مبالغه میکرد نه به وقت وضو مسواک استفاده بکند همیشه مسواک استفاده میکرد قبل از وضو استفاده میکرد قبل از نماز استفاده میکرد قبل از خواب استفاده میکرد قبل از غذا استفاده میکرد بعد از غذا هم استفاده میکرد بعد از خاب استفاده این نکته که روزی پنج بار و ده بار استفاده بکنه خیلی استفاده میکرد دائما مسواک به دستش بود کار می‌کرد و مسواک استفاده میکرد لذا آن حضرت خیلی هم پاکی را دوست داشت و هم می‌فرمود که عطر را زیاد دوست دارم خوشبوئی زیاد استفاده میکرد و اصلاً از اون چیزهایی که باعث بو بشد در دهان مثل پیاز و سیر اینها اصلاً ان حضرت نزدیک اینها نمی رفت ایچ دست نمی زد می گفت که من پیش ما فرشتگان میایند. لذا این سنت حبیب ماست پیامبر ماست که هم مسواک هم پاکی پاکی زگی نظافت امروز دنیا متمدن و مترقی یاد گرفته نظافت را و تأکید دارد بر بهداشت و بر سلامت و بر نظافت در حالی که اون زمانی که رسول الله تأکید کرد الان ببینی کسی اگر روز پنج بار وضو بگیرد برای هر نماز وضو بگیرد خب این کمال نیست چون همه چیز فراوانه اون زمان مردم یک مشکیز آب میرفتند از چند فرسخ می آوردند باشتور می آوردند در اون شرایط. رسول الله صلی علیه و وسلم همیشه حضور بگیرد هر جمعه غسل بیکرد اون زمان مردم اصلا بلد نبودن غسل کردن یعنی چه؟ روز جمعه بعضی وقتا ابتدائن البته تازه جمعه واجب شده بود مردم آمدن به جمعه نماز جمعه و مسجد تنگ بود همه لباس پشمی داشتن عرق هم کرده بودن درق وقتی که با پشم یک جا بشه میدونی چه تفونی دارد مسجد اصلا یک گازی و یک بوی گرفته بود آن حضرت ناره شد فرمود که غسل روز جمعه بر هر فرد بالغتون از این به بعد واجبه دیگه با اون کم بوده آب هر جمعه غسل بکنید این در واقع چی را میرساند تأکید اسلام را بر نظافت و اهمیت اسلام را به موضوع نظافت پس هر اندازه که ما نظافت را بیشتر توجه بکنیم آب استفاده بکنیم برای مسواک برای استنشاق برای از کنم که عطر استفاده بکنیم خوشبو بزنیم نظیف باشیم پاک باشیم تمیز باشیم بیشتر خدا این را میپسندد والله يحب المتطهرین الله تارا دوست دارد کسانی را که پاکیزگی را اختیار میکنند اَفَ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تقوى من الله وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ اللہ می فرمائید آیا اون انسانی انجا یہ مغایسے ہی کردم بین قبا و بین زرار آیا اون بنائی کے اساسا اساس گزاری شده یا اون انسانی کے اساس گزاری کرد بنیانه بنا را بر تقوا از خدا از خدا میترسد و بر اساس رضای خدا می را، خدا راضی بشه چرا این زمین را می ده؟ می خدا از من راضی بشه هیچ چیزی به خدا بدم در راه خدا بدم آیا این بهتر است؟ خیرون آیا این بهتر است؟ اما اساس بنیانه علا شفا جروف یا اون کسی که اساس گزاری کرده بنایش را بر لبه حلاکت جروف حلاکت اونم هار هار در حال سغوط در شروف سغور بر لبه پرتگاه، فنهار بیه فی نار جهنم که بعدم می اندازت اورد در آتش جهنم یعنی کسی که بنای می کنند چنان بنایی که بر اساس تخریب است و اون را آخر به جهنم می برد کدوم از اینها بهتر است مسلمه والله لا یهد القوم الظالمین خداوند چنین قوم ظالمی را که برای تفریق بین مسلمانان و جدائی افکندن بین مسلمانان مسجد درست میکنند به نام مسجد درست میکنند توفیق هدایت نمیده و الله تعالی فرما اینجا خیلی هزینه کردند این بنیانشان همیشه سبب نفاق بیشتر میشد گودهشون بیشتر شد دیگه این نیست که توبه بکنند لا يَزَالُ بُنِيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِيبَتًا هموار بنای انها آن بنای که بنا کردند ریبتن یعنی این چی هست یک نفاقی هست شک یعنی نفاق نفاقی هست در قلوبشان یعنی این نفاق نفاقی قبلی را افزود اضافه کرد نه اینکه اینها توبه بکنند حداقل اگر اینا ذرهی وجدان داشتند درک داشتند میدوننن که خود خدای عزوجل به پیامبرش در سفر تبوک وحی کرد معلوم میشه که این پیامبر مستقیم با خدا ارتباط داره معلوم میشه که این پیامبر واقعا پیامبر خداست هر کسی باشد کوچکترین وجدانی داشته باشد از تعصب خالی باشد ایمان میاره میترسه حقانیت پیامبر را پی میبرد ولی اینها نه اینها بجای اینکه شکشون بر طرف بشه بجائی اینکه بیان بسوی ایمان نفاقشون بیشتر شد انادشون بیشتر شد که چرا این ساختمان را خراب کرد؟ لذا الله می فرمات لا يزال بنیانهم الَّذی هم وارئی این بنای اونها اون بنایی که بنا کرده بودند ریبتاً سبب شک و نفاق بیشتر میشه فی این شک و این نفاقی تمام میشه اِلَّا اَن تَقَدْتَى زمانی که دلیشون تکه تکه بشه یعنی زمانی که موت بر انها بیادو انها حلاک بشن والله علیم حکیم اللہ عز و جل ہم علیم هست هر چیز را داناست و هم کارائی اللہ تعالی با حکمت هست اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ این آیه مجده است. مجده هست برای تمام مؤمنینی که با خدا معاملے میکنند. البته بنده جریان بیعت عقبه خدمت شما عرض کردم بسیاری از مفسرین فرمودند آنها وقتی که آمدم بار سوم سری اول 6 نفر بودند سری دوم دوازده نفر بودند سری سوم هفتاد نفر بودند آمدم با رسول الله بیعت کردند بیعت بر اسلام قبلا کردند اینجا بیعت کردند بر نصرت بر حمایت بر اینکه تا آخرین لحظات زندگی ما در کنار شما باش لذا شامل حال اونها هم میشه تنها آیه اختصاص به اونها ندارد و نخواهد داشت آیات قرآن عمومی هستند هر کسی که چنین حرکتی بکند هر کسی که چنین حمت والایی داشته باشد و بی برای دین خدا کاری بکند که بگت خدای من با تو معامله میکنم من جان میدم بهشت میخوام یا مال میدم بهشت میخوام و همونطور خلوص چه جان میده چه مال میده ها مثلا یک جای نیاز از مسلمانان هست نیاز مالی بزرگی هست برطرف نمیشه یکی میاد با خدا معامله میکنه با خدا عهد میکنه با بنده خدا که اونجا در رأس هست و سرپرست هست میگه من میخوام چینی ای بکنم با خدایم لذا بیعت میکنه هر کسی که چنین اقدامی بکند چنان هر حرکتی مجاہدانه ای بکند مشمول این آیه میشه مستاقین آیه میشه الله میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین الله خریداری میکند اینجا مشتری کی الله است بایع کی مؤمنین هستند زیر ان الله بمجذنی سے مشتری زیر لفظ جلاله الله بنو سے مشتری زیر لفظ مؤمنین سے بایع اللہ می خرد از مومنین چی می خرد؟ دو تا مبی مبی اول انفسهم جان هایشان را می خرد و اموالهم مال هایشان را می خرد اللہ می گه من بده مال بده در رحمان جان بده و سمن چیه؟ خداون چی پرداخت می کند؟ ان لَهُمُ الْجَنَّةِ به عوض این که برای اینها بهشت است در عوض بهشون بهشت میده اما بیان این معامله و توضیح این معامله چیه تفصیلش اللہ میفرمایات یقاتلون فی سبیل اللہ انها می جنگ اندر راه الله فیقتلون میکوشند دشمنان خدا را و یقتلون هم شهید میشوند وعدا عليه حقا وعده الله اصبر الله می وعده وعده حق است نه تنها این وعده در قرآن است فی التورات و الانجیل در تورات و انجیل این وعده است امروز مسیحیت میگه اصلا در دین ما جهاد نبوده حکمی نام جهاد نبوده دروغ میگند اینها در تورات هم دستور جهاد اولا تورات را خوب مسیحیان قبول دارند موسا را قبول داشتند به تورات کی ایمان داشتند در تورات که هنوز هم دستور جهاد است در تورات هنوز حکم جهاد وجود دارد و از انجیل برداشتند ولی عیسی علیه و السلام حواریون را نگفت که بیایید مرا یاری کنید این در انجیل هم هست در قرآن هم هست عیسی بن مریم گفت که من انصاری الله قال الحواریون نحن ان انصار الله خب چطور عیسی را یاری کردند بعد از اینکه عیسی را به دار زدن دشمنان اینا نتونست از عیسی امایت کنند بعدا جهات کردند دو کار کردند سه کار رسول الله می فرمان سه گروه ناژی یک گروه جهات کردند شهید دادند یک گروه تبلیغ کردند گفتن من نمیتونیم جهاد جهات بکنیم تبلیغ کردند اینها هم فرمون ناژی یک گروه دیگه گفتن نما میتونیم تونین جهات بکنیم نمی تونین تبلیغ بکنیم رفتن تو قارها تو جنگل ها خدا را عبادت کردند. هایی که در همین مسیر ماندن بازم ناجی هستند. لذا الله عزوجل و می این حکم در تورات و انجیل بوده این نیست که در تورات و انجیل حکم جهاد نبوده امروز بلوف می زن مسیحی می نه جهاد نیست جهاد در همه ادیان بوده وعدا علی حقم فی التورات و الانجیل والقرآن در همه کتاب آسمانی لذا الله می فرماید و من اوفا بعهده من الله چه کسی وفادار تر به عهد خودش از الله خواهد بود خدا وقتی که عهد کرد با شما خدا وقتی که وعده کرد با شما عهد خدا عهد است وعده خدا وعده است وفا میکند پس کسانی که با خدا معامله کردید خوش باشید بشارت باد شما را خوش خبری باد شما را فاستبشرو ببيعكم الذي بايعتم به مجذبات شمارا تحویل بگیرید خوشخبری را ببیعکم الذي بمعاملهایی که بايعتم به شما معامله کردی به وسیله آن با خدا و هو الفوز العظیم این هست فقط این فوز بزرگ کامیابی بزرگ البته بازی وقتها کسی فکر بکنه که من با خدا معامله بکنم و دیگه هیچ کاری نکنم هیچ عملی نکنم این طور هم نمیشه کسی بگه من مثلا ده میلیارد میدم فلان پروژه را برای خدا و برای دین خدا انجام میدم آماده میکنم یک مسجد جامع بزرگی درست میکنم دیگه بعد از اون هیچ چی نمی کنم نه این اوصاف را هم باید داشته باشند اتائبون العابدونل حامدون سائحون اینا کسانی هستند که تائبون بار بار توبه میکنند رجوع میکنند به سمت خدا العابدون کارشون عبادت است همیشه خدا را عبادت میکنند الحامدون فقط و فقط الله را حمد میگویند الله را تعریف و سنا می میگویند یعنی ذکر میکنند السائحون این ها سائحون هستن سائحون دوتا تفسیر آمده بعضی گفتن یک روایت یا سیاحت امتی السیام سیاحت امتی من چیه روزه گرفتن سائحون یعنی روزه می گیرند و بعضی می سائحون یعنی جهاد می کنند. جهاد می در در الله اللہ الراکعون الساجدون حمرکو کننده و سجد کننده هستن الامرون بالمعروف انه ونه نهی اون های هستند که امر کننده دب معروف هستند و نهی هستن کنند هستن کننده از منکر هستند و حافظون حدود الله و حدود الیله را چیکار میکنن فازت یعنی احکامات خدا رو تمام هر حکمی باشه حفاظت چشم باشه حجاب باشه معاملات ربوی باشه بر حدود خدا قائم هستند و بشر المومنین چنین مومنین را ای پیانبر من بشارت بده بیانن لهم الجنه که برای اینها بهشت منتظره همین که چشماشون را ببندن مستقیم انشاءالله به بهشت خدا نائل میشن ما کان لین نبی والذین آمنوا ان یستغفرو للمشرکین اینجا الله عز و جل پیام را من کرد که اگر بدون ایمان مردند با شرک مردند نه برای اونها جنازه خنده بشه نه برای اونها استغفار بشه میگویند که این آیه در رابطه با کسانی هست که نزدیکانشون بدون ایمان مردند می‌خواستن برای اونها استغفار بخونند از خدا معذرت بخرن یکی پدرش یکی مادرش بازی میگن که اموی رسول الله ابو طالب چونکه ایمان نیاورد این در رابطه با ابو طالب هست بالاخره محمل آیه عام هست هر کسی که از ماها فوت کرده بدون ایمان برای او نمیتونیم از خدا معافی بخواییم می میفرماید ما کان للنبی والذین آمنوا سزاوار نیست و مناسب نیست برای نبی و مؤمنین برای پیامبر و مؤمنین این استغفروا للمشرکین ان که برای مشرکین مغفرت بطلبند ولو كانوا قربا گرچه اون مشرک از نزدیکان باشد از خویشاوندان باشد از دارندگان قرابت باشد من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم بعد از اینکه واضح شده که اینها اصحاب جهنم هستند دیگه برایشون مغفرت نخواهید کجا واضح شد خب کسی که در حالت شرک بمیرد قرآن گفته ان الله لا یا غفره، ان یشرک به لذا وقتی که بدون ایمان رفته دیگر نباید برای او از خدا مغفرت خواست برای او از خدا معافی خاست. اما سوال مطرح میشه چطور ابراهیم الله السلام برای پدرش مغفرت خواست وقتی که اونجا هجرت کرد گفت لا استغفرا لنک و ما املك لک من الله من حتما برای تو از خدا مغفرت میخوام الله تعالی می فرماید اون مغفرتی که ابراهیم خواست چون وعده کرده بود با او و چون ابراهیم خبر نداشت اما وقتی که برای ابراهیم واضح شد که پدرش بدون ایمان مرده یعنی خدا بهش گفت که ابراهیم برای پدرت مغفرت نخواهد چون اون بدون ایمان رفت بعد از اون ابراهیم اعلام براءت کرد الله می فرماید وما کان استغفار ابراهیم لابه ابیه نبود استغفار خواستن ابراهیم برای پدرش الا عمویدت وعدها ا مگر از بخاطر یک موعده‌ای که وعده کرد با او فلما تبین له زمانی کے واضح شد برای ابراهیم انه عدو لله که همانا اون پدرش دشمن خداست یعنی با کفر و شرک مرده تبر امین از او تبری ریجوست از او اعلام برایت کا گفت خدا من از او بیزارم این ابراهیم لعواه حلیم همانا ابراهیم هم دل بود و هم بوردبار بود اما با وجود این وقتی که دید در حالت کفر است دیگه از او اعلام برائت کرد وما ما کان الله ليذل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون حالا ما مثلا کسانی که استغفار کردند سوال اینجا خیلی از نمی نمیدونستانت برای نزدیکان مشرکشون برای پدر مشرک برای برادر مشرک معافی خواستن الان گناهکارند الله تعالی می فرماید چون که قبلا اعلام نشده بود از طرف خدای تعالی قبلا اعلام نشده بود بدون اعلام بود هرچی کردید اشکاری ندارد الان که اعلام شد از این به بعد مغفرت نخواهید که از این به بعد اگر کسی مغفرت بخواهد برش گناه است و ما كان الله ليضل قوما بعد اذ خداوند گمراه نمی کند هیچ قومی را قبل از نهی بعد از اینکه راهنماییشون کرد حتی بیان له ما یتقون حتی خدا بیان می کند اون چیزی که باید بپرهیزند خدا برایشون بیان می کند بعد از اینکه بیان کرد بعد از اون باید نکند اما قبل از بیان کردن اگر کسی کاری کرده براش اشکالی ندارد ان اللہ بکل شین علیم همانا الله نسبت به هر چیزی داناست ان اللہ لہو ملک السماوات والارض این بیان تعیید الهی است اللہ تعالی برای او هست نبرای غیر خدا یعنی ببینی پیغمبران هم نتونستند پیغمبران هم مختار نیستند برای الله از پادشاهی آسمان ها و زمین یحی و یمید الله زنده می کند و الله می میرانند و ما لکم من دون الله من ولي ولا نصير نیست برای شما به از الله هیچ کارسازی و هیچ نصرت کننده بجز الله برای شما وجود ندارد لقد تاب الله على النبي این آیه در رابطه با همو سه است گرچه وعلى الثلاثه الذين خلفوه از این جا هست اما عذکر کردم افراد مختلفی در جنگ تبوک کوتاهی کردند این افراد هم بعضی‌هاشون از کنم که منافق بودند که تکلیف اونها روشن خداوند و جل فرمود برای اونها عذاب دردناک است بعضیها مسلمان بودند که نداشتن خب اونها معذور بودند بعضی هم مسلمان بودند کوتاهی کردند فوراً خدا اونها رو بخشید سه تا از این مسلمان ها که اینجا پذیریش توبهشون اعلام شد در رابطه با اینها خدمتشون عرض می کنم این سه نفر یکی حضرت کعب بود کعب ابن مالک و یکی مراره ابن ربی و یکی حلال ابن امیه این کعب از اصحاب جلیل القدر بود این میگه فقط من در بدر توفیق نداشتم همرا باشم در بدر توفیق نداشتم اما در بقیه معرکات در تمام جنگها بوده حتی در اون بیعه عقبه که رفتم مکه با رسول الله بیعت کردم و از رسول الله دعوت کردن یا رسول الله شما تشریف بیاری مدینه ما از شما حمایت میکنیم در اون بیعه عقبه هنوز همراه بوده این را برای خودش افتخار میدونه و میگفت من اون همراهی در بیعه عقبه را از بدر بالاتر میدونم لذا یک مسلمان مخلص اما خودش تعریف میکنه میگه وقتی که رسول الله اعلام کردند که همه میرویم به جهاد به تبوک میریم میگه من آمادگی داشتم من اسبم بقیه یک اسب داشتم من دوتا داشتم اسبم هم تندرو بود من گفتم که بذار بقیه حرکت بکنند من بعدم میرم هی hey, درنگ کردم تاخیر کردم همین که قبلا خدمت شما عرض کردم که قلب در دست الله است وقتی که کار نیکی بود تاخیر نکنید که چه بسا تاخیرها هستن که انسان را محروم میکند این میگه من امروز فردا کردم گفتم تون میرم به اونها میرسم ولی هی امروز فردا کردم تاخیر توفیقی نشد کار هم نداشتم مشکلی هم نداشتم نشد بعد از اینکه رسول الله تشریف آوردند من دیدم که منافقین هر یکی می روند و دروغی می گویند می دروغ می یک بهانی میارند رسول الله را فریب میدن و رازیش میکن. میگه منو می‌تونستم، سوگن میخوره من از اوننا بهتر میتونستم ولی از خدا ترسیدم نکردم این کار را وقتی رفتم خدمت رسول الله سلام گفتم دیدم چهره ایشون خیلی گرفته خیلی ناراحته گفت کب چرا تو نیامدی گفتم یا رسول الله عذری نداشتم تنبلی بود گفت پس منتظر باش تا خدا تکلیف تو رو روشن کنه بعد اطرافیانم مرا ملامت کردن گفتم تو یک بهانه میگفتی یه چیزی میگفتی پیغمبر از تو ناراضی نمیشد گفتم نه پرسیدم غیر از من کسی هست که مثل من باشد و رسول الله بهشون بگه تکلیف شما روشن میشه گفتم بله دو نفر یکی حلال ابن امیه هست و یکی مراره ابن ربی هست گفتم خب پس هر دو از صحابه بدری هستن اونها مخلص هستن قطعا خدا برای ما خیر میکنه ما سه نفریم لذا حضرت کعب میگه که ما وقتی منتظر بودیم خدا تکلیفمون را رو روشن بکنه توبه کردیم اما خبری از پذیرش توبه نشد امروز فردا چند روز گذشت دیدم که رسول الله دستور داده که از این به بعد کسی با این سه نفر حرف نزنه غط رابطه میگه این برای ما خیلی سخت شد می آمدم به نماز می آمدم وقتی رسول الله مرا می دید سرش را پایین می کرد من سلام می گفتم می دیدم یک چیزی لبش تکام می خورد زمزمه می ولی به من وانمود می کرد که اصلا با تو صحبت نمی خلاصه هر هر می رفتیم بازار می رفتیم پیش مردم تو باغها تو بازار سلام میگفتیم هر کسی ما را میدید دید را اون طرف می کرد به ما نگاه نمی تمام میگه با ما قطع رابطه کردند حتی میگه حضرت کهب میگه من پسرموی داشتم اون تو باغ بود و داشت با بیل کار میکرد بی میگه من از دیوار رفتم بالا دیدم پسرموی هم هست گفتم سلام اون که تا به من نگاه کر رفت اون طرف اصلا تحویل نگرفت من را صدا کردم گفتم تو که پسرموی من هستی تو را به خدا سوگن میدم تو مگه نمیدونی که من منافق نیستم من از طه دل ایمان آوردم گفت خدا بهتر میدونه فقط همین قد گفت گفت خدا بهتر می دوری خلاصه ده روز رد شد ده روز که رد شد دستور دادن که زنهایشون هم از اینها جدا بشند زنهایشون هم از اینها جدا بشند زنها فوران نطاعت کردند زنهای مؤمنه وقتی که رسول الله دستور میده شوهر مهم نیست آمدن زنها پیش رسول الله گفتی یار رسول الله چطور جدا بشیم؟ طلاق بخواهیم یا یعنی نه طور مؤقتا جدا بشیم. کلّن از اینها جدا بشیم. رسول الله فرمود نه کلّن جدا نشید. صبر کنید. ولی فعلا از اینها جدا بشید. لذا همسر یکی از اینها فقط گفتی یار رسول الله غالبا حلال بود گفتی یار رسول الله پیر شده ضعیف است. خودش نمیتونه غذا درست کنه اجازه میدی من فقط غذا درست میکنم میبرم میذارم خودم میام دیگه پیشش نمیرم آن حضرت استثنا اجازه داد نظامیگه که دیگه زنها هم مارا ما را گذاشتند ما کارمون شب و روز گریه بود شب و روز داد و فریاد بود پیش خدای عزوجل التماس بود معذرت خواهی بود و حتی کعب میگه من یک روزی بازار رفتم خیلی بر من سخت گذشت قرآنم هم همین را گفته که زمین با وجود اون فراخی بر اینا تنگ شد حضرت کعبم تو تعبیرش میگه واقعا هر جا که رفتم هر کسی را با هر کسی صحبت میکرد هیچ کبی من با من صحبت نمیکرد ببینید چه اطاعتی چه فرمانی باز بقیه صحابه تا اینکه شنیدم که یکی بردی هست یک فرد رومی هست از یک مغازداری پرسید که کعب کجاست کعب میگه که اون به من نشونده کعب ابن مالک اون داره میره من متوجه شدم من رو نشان میده اون دوید به طرفی من آمد گفتن شما گفت من از روم آمدم از طرف ملک غسان پادشاه غسان ای برای شما آوردم میگه من نامه را که باز کردم تمام بدنم آتش گرفت که این پادشاه غسان شنیده بود که محمد صلی الله علیه و نفر از زیاران خودش را قطع رابطه کرده او برای من نامه نوشته بود او امید کرده بود که من شنیدم شما را ترک کرده من آماده پذیرایی از شما هستم اگر میخوای بیایید بیایید به بی ملک ما و اینجا هر کاری بکنید شما را حمایت میکنم کنم منش اینه که بیایید برای پیغمبر از اینجا کار بکنید میگه من این نامه رو تکه پاره کردم و فریاد بر پیش خدا که خدایا مسئله من به رسید که الان کفار هم امید کردند که طمع کردند که من دیگه از مسلمانی خارج بشم لذا میفرماید که همین طور دیگه گریه بود و اشک چشمای ما خشک شده بود شب و روز گریه میکردین میگه وقت سحر بود آخرین روز پنجه روز گذشت کلن بعد از پنجه روز الله تعالی توبه را قبول کرد برای پیامبرش قبل از نماز صبح وقت س... وقت ارز کنم که سحر اللہ اعلان فرمود که اینها توبه شون قبول است رسول الله صلی الله علیه وسلم به کسی را گفت که به کعب خبر بدهید که توبهشون قبول شد رسول الله هم براش سخت بود بهترین یارانش بودند در اون روزهای سخت بیعه عقبه رفت به مدینه و از رسول الله دعوت کرد که تو بیا پیش ما اما الان رسول الله اجازه نداره با این ارتباط بگیره لذا رسول خدا گفت بریم بهش خوش خبری بدهید دو نفر دوید دو نفر دوید چون که هر اون زمان اینطور بود کسی اگر خوشخبری و مجده میداد مجدگانی می گرفت یکی با اسب یکی پیاده اون یکی پیاده بود دید که اون اسب سوار از من پیشی گرفت اون رفت جلوتر خبر میده. از همین جا صدا گفت که کعب توبه تو قبول شد. از دور خوش خبری داد. کعب این قدر خوشحال شد که وقتی که میگه بالا خانه خانهام بودم از اون جادد پایین، و آمدم اون شخص را دیدم همین پیراهن خودم را در آوردم به اشدادم گفتم این مال تو از بس که من خوشحال شدم و اینجا وقتی که آمدم خدمت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دیدم چهره مبارک رسول الله می درخش از خوشحالی سلام گفتم با یک بشاشت و خوش روی می بند جواب دادن و مرا را تبریک گفت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم که الله تعالی توبه شماره قبول کرد لذا اینجا پذیرش اون توبه است الله می فرماید لقد تاب الله على النبي همانا الله رجوع کرد بر نبی خودش و بر بندگان مهاجر والانصار و الانصار و صحابه انصاری الذين اتبعوه في ساعة العسراء اون مهاجرینی و اون انصاری که از پیغمبر پیروی کردن در ساعت سخت جیش العسره بود و آغیان تبو اللہ به انها رجوع کرد یعنی اللہ تعالی انها را کرامت بخشید من بعد ما کاد یزیغ و قلوب و فریق منهم بعد از اینکه نزدیک بود کج بشید دل گروهی از انها یعنی نزدیک بود از بس سخت بود نزدیک بود که نروند اما ثم تاب عليهم سپس الله بر ها رجوع کرد انه بهم رؤوف الرحیم الله نسبت به این بندگانش رؤوف و مهربان است و همچنین و على الذین خلفوا الله می بر اون نفری که خلفوا اونها متخلف قرار داده این سه نفر کعب ابن مالک و مرار ابن ربي و هلال ابن امیا الله میفرماید و على السلفة الذين خلفوا إن أتفسر على النبيين لكتاب الله على السلاس الله رجوع کرد ثوب را بازی از اون سه نفری که خلف و متخلف قرار داده شدن، تخلف کردند. حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، حتی زمانی که تنگ شد زمین بر آنها با وجود گشادگیش، با وجود وسعتش حضرت کعب میگه زمین بر ما تنگ شد. اینقدر فراخ بود ولی تنگ شد بر ما که ما چقدر مردودیم و چقدر مزمومیم که نه خدا به ما توجه میکنه نه رسول خدا نه بندگان خدا و ضاقت حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت حتی وقتی که تنگ شد بر آنان زمین به سبب و با, با وجود ضاقت عليهم انفسهم و تنگ شد بر آنان نفسشان یعنی دلشون هم تنگ شد دلشون گرفت دلگیر بودند و شبروز مغموم بودند پریشان بودند و ظنوا الله ملجا من الله الا اليه الله می فرماید آنها یقین کردند ظنو اینجا به من یقین هست ظنو یعنی ایقنو آنها یقین کردند که الله ملجا من الله انك نیست پناگاهی از الله الا الیه مگر به الله پناهجا فقط الله دیگر نیست. ثمّ تاب عليهم ليتوب سپس الله بر اونها رجوع کرد تا اینکه اونها به خدا برگردن در مواقع مصیبت و معصیت در هر دو صورت به خدا رجوع کنن جای دیگه رجوع نکنن إن الله هو تواب الرحيم همانا الله از ذوجل اون ذات فقط توبه پذیر هست به کسرت رو جو کننده بر بندگان و توبه هر بنده ای را میپذیرد <تصفح> نه تنها توبه صحبه هر بنده ای و بعد از پذیرش توبه الله رحیم هست الله مهربان است. اضافت یک نکته میخوام اعرض کنم و تمام هست اون نکته این است که برای توبه ما در هر کاری توبه بکنیم. اما برای توبه پذیرش فورا لازم نیست اینها دیگه انسانهای بودند که تمام اولیاء روی زمین جمع بشن به گرد پاکی این صحابه نمی رسند اینها را اللہ تعالی تا پنجه روز تأخیر داد تا پنجه روز اینها زار زار گریه میکردن. خود اللہ می فرماید زمین بر اونها تنگ شد یعنی این فشیمان پشیمان بودند کہ زمین با این وسعتش برای آنها سلول و زندانی بود و دلگیر بودن و ضاقت عليهم انفسهم لذا ما گاهی انشالله در همین سوره میخانیم در درس فردا اگر حیاتی باشد الله فرماید که شما گاهی مشکلاتی بر شما میآید توبه کنید گاهی مشکلات برای ما میآید ما نسخه نادرستی برای مشکلات خودمون میپیچیم کسی برایش مصیبتی میاد برایش مشکلی میاد برایش ورشکستگی میاد در کاروبارش دوچار مشکل میشه هی hey میره پیش ملا میگه من هر جا کم میارم به من تعویز بده به من دعای بنویسو بده ببین این نسخه نادرستی هست بلاخره اینجا اون کسی که تشخیص داده که تو تعویز بگیری هم غلط تشخیص داده حل مشکل با این که کسی دیگه برای تو دعای بنویسی هیچ وقت حل نمیشه مشکل تو به دست خودت حل میشه اون چی هست رجوع الاللہ است به خدا برگرد توبه کن و چنان توبه صادقانه شاید ده روز بیس روز پنجار روز خانی هم قبول نشه که خدا نگاه می کنه چه اندازه در این بنده واقعا ندامت و پشیمانی آمده واقعا پشیمان شده شاید چهار سال طول بکشه الله تعالی در همین ورد حضرت یونس امامی خانه فرم می فرمودن, فرمودن که یونس خانت فناده فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یونوس که تو اون ماهی گرفتار شد این خاند اللہ می فرماید که فنجیناه من الغم وقتی یونوس خاند واقعا صادقان به خدا رجوع کرد چند روز بود بعضی میگه هفت روز بود بعضی میگه چهل روز بود تا چهل روز خاند اللہ بهش رجوع کرد اللہ می فرما فنجیناه من الغم ما از او را از غم نجات دادیم و كذلك ننجي المؤمنين بعد از این خدا همین میفرمايد بقیه مؤمنین را هم چی ما نجات میدیم یعنی چه یعنی بقیه مؤمنین اگر بیاند همین ورد یونس را بخوانند ما نجاتشون میدیم همون طور مثل یونس بخوانند استهدل بخوانند رجوع صادقان به الله داشته باشند لذا کلید حل مشکلات همه من و شما توبه هست رجوع ال الله هست. تعویذ نیست دا نویسی نیست ما به خدا برگردیم از خدا پوزش بخوایم معذرت خواهی بکنیم اوراد بخونیم اذکار بخونیم تسبیح یونس را بخونیم دعاهای بقیه انبیا را بخونیم ان شاء الله الله تعالی دیر یا زود الله ما هم زیاد امتحان نمی کنه میدونه ما بندگان ضعیفی هستیم زود الله قبول میکنه زود ان شاء الله ورق بر میگردد زود مشکل شما حل میشه لذا کلید اصلی اینه که حضرت کعب داشت و رفقای کعب داشت ما هم این این ایت را که میخانیم اینا بدونیم که ما به همین صورت میتونیم که توجه رب را رحمت رب را به خود جلب کنیم. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا, أن يتخلفوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ زَمَأٌ وَلَا نَصَبْ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَأُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ النَّيْلًا إلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ بعد از بیان جریان تبوک و همچنین تذکر بر تخلفات که بعضی از این تخلفات مال منافقین بودند بعضی ها مال مسلمانان که کوتاهی کردند اما توبه کردند و توبهشان پذیرفته شد در ادامه الله تعالی ترغیب میده به سوی اخلاص و دوری از نفاق دوری از ریا دوری از تظاهر اما در این ترغیب خداوند تعالی میفرماید که اگر شما میخواهید اخلاص بیاد در درون شما، تقوی و خدا ترسی بیاید، شما همراهی و مصاحبت صادقین را و انسانهای درستکار را انتخاب کنید. خداوند میفرماید یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ای مؤمنان شما از خدا بترسید از خداوند پروا داشته باشید یعنی خلاف نکنید گناه نکنید معصیت نکنید تخلف نکنید اما این تقوایی که خدای تعالی اینجا بیان فرموده نسخه تقوی و النسخی خدا ترسی هم خدا تعالی بیان می فرماید و کونو مع الصادقین شما با انسان صادق باشید با انسان راستکار و درستکار باشید عزیزان خیلی تأثیر دارد مصاحبت و همراهی همراهی با نیکان همراهی با صالحان همراهی با صادقان کون و معا الصادقین صادق کیه صادق به اون کسی گفته میشه که هم در قولش راسته در اقوالش و هم در کردارش یعنی هرچی میگوید خلاف نمیگوید مثل منافق دورنگ نیست صادق در مقابل و ضد منافقه و هم هرچی عمل میکند اون عملش هم در عملش هم صادقه بعضی ها عملشون دروغه به ظاهر خوب عمل میکنند اما پشت سر این برای ریاست برای نشاندادن است برای تماغ است برای خوشرقسی است لذا این هم در عمل دروغ میگوید وقتی که مثلا شما را ببیند مشغول میشه به دعا و تضرر و سجده این عملش عمل دروغینی است. پس خدای تعالی میفرماید همرا با صادقین باشید صادقین اونهایی هستند که هم در گفتار راستگو هستند هم در کردار کار و درست عمل هستند عملشون درسته برای خداست مخلصند برای ریا نیست مثل منافقین برای نشان دادن سمعت نیست لذا اگر می‌خواهید تقوا نصیبتان باشه با اینها همراه بشید ارز کردم که همراهی و مصاحبت بسیار تأثیر داره در عمل انسان در روحیات انسان انسان با هر نوع همنشینانی همراهی داشته باشه اثرش را می گیرد جالب تر از اینکه حتی انسان از حیوانات متأثیر میشه چه برسه به انسانها در حدیث از رسول الله صلی علیه و وسلم یه جایی یک گروهی را یک قومی را که قبیله ریعب بود رسول الله تعریف کرد. گفت اینها آمدند اینها اهل غنم هستند یعنی مالداری گزفند دارند، بیشتر با گوسفندان سر و کار دارند و فرمود که اینها ادمای نرمی هستند دلشون نرمه مزاجشون نرمه، اخلاقشون نرمه، و دیگران را ان حضرت صلی الله علیه وسلم که با شطور سر داشتند فرمود انهایی که پشت سر شطورها داد و فریاد میکشند آه و فریاد میزنند و بیشتر به دم به شطورها گرفتند فرمود نه دلشون سخته یعنی چه می میگویند که اینها چون که با گزفندها سر دارند همون اخلاق گوسفندی نرمی ملایمت و آرامی در اونها تاثیر میگذارد اونهایی که با شتر که یک انسان یک حیوان تندخویی هست و برخوردش گاهی احیانا خشن است با اونها سر و کار داشته باشه همون رنگ را از شیر شتر از گوشت شتر از زندگی کردن و مصاحبت کردن با شتر گیرد در زبان عربی مقوله‌ای هست میگه اهل الجبل کل جبله یعنی کسانی که تو کوها زندگی میکنن دلشون هم مثل کوها سخته همین طور مثل کو هم سلابت دارند خیلی سخته کسانی که در سواحل زندگی میکنن کنار دریاها زندگی میکنن کنند می مثل مایها نرم هستند خویشون نرمه طبیعتشون نرمه عادتشون عادت بسیار نرم و آدمای آرامی هستند معلوم میشه که انسان در هر زمانی در هر مکانی با هر نوع حتی حیواناتی مالداری بکنه اثراتی از او بر میدارد از مجموعی این هم روایت ها و هم اقوال معلوم میشه لذا کسی که انسان بدی را به عنوان رفیقش انتخاب میکنه انتظار داره تقوی در درونش بیاد اگر میخواهیم اگر می خواهیم خود ما با تقوی باشیم خود ما خدا ترس باشیم فرزندان ما صالح و نیک باشد رفت و آمد ما مراوده ما نشست و برخاصت ما با نیکان باشد انسانهای خانه های ما رفت و آمد داشته باشند که اونها را بچه های ما ببینند بیاد الله بیوفتند بیاد نماز بیوفتند بیاد طاعت و بندگی بیوفتند بیاد خدا ترسی بیوفتند لذا الله تعالی این فرموده که ای بندگان من ای بندگان مؤمن من شما تغوار را پیشه کنید خدا ترس باشید و اثر خدا ترسی از کجا می آید و کونوا مع الصادقین شما با بندگان صادق خدا و بندگان راستگو خدا و درستکار خدای عزوجل همراه باشید همیشه با آنها نشست و برخاست داشته باشید رسی فرمایید که جوانان ما که بیشتر مشکلات دارند بخش اعظمی از به جوانان که مشکل دارند به دلیل مصاحبت با همراهان و رفقای ناباب است با کسانی منشینند که شب و روز تکیه کلامشون دشنام دادن است از دشنام دادن برای اینها عادی میشه برای اینها یک تکیه کلام میشه با کسانی منشینند که بزرگترین گناهان را می لذا گناه از نظر اینها یک چیز عادی هست یک چیز معمولی هست با کسانی منشینند که افتخاراتشون شرابخاری و میخاری هست لذا اینها وقتی که با این نوع افراد بشینند قطعا اثر را می گیرند نقش بر دارند وقتی که همیشه شما با یک دکان عطر فروش رفت و آمد داشتی باشد. پیش عطار برید تو صندلیش میشینید از دکانش خارج میشید بدن شما لباس و شما بوی عطر میده بالاخره هر چیزی اثر خودش را دارد اثرات ظاهری کمتر است از اون اثرات باطنی و معنوی لذا الله تعالی توصیه می فرماید. ما سعی بکنیم خودمان تجدید نظر بکنیم خیلی از جوان ها هستند که میگوین دوست داریم که برگردیم به سوی خدا اما استقامت نداریم یکی از راهکارهاش اینه که دور این رفقای ناباب را خط بکشند. شمارهشون راست تلفن پاک بکنند رفت و آمد را با اونها قطع بکنند به اونها دیگه زنگ نزنند، پیش اونها به هیچ صورت نرن سعی کنم در مسیر اونها واقع نشوند. آدم های خوب هم تو دنیا هست انسان های صالح هم هست انسان های خداترس هم هست انسان های حلال حرام هست انسان های عابد هم هست لذا از اینها افرادی را برای رفاقت برای دوستی برای مصاحبت انتخاب بکنند لذا الله امین رمی فرمات یا ایها الذين آمنوا ای مؤمنان اتقوا الله اذ خدا بتسید و مع الصادقين هم ربا انسان های راستگو و راست عمل باشید کسانی که هم در گفتار راستند هم در کردار راستند و یکی از بهترین مصداقای صادقین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و وسلم هستند چند جای قرآن مجید ما خاندیم الله تعالی به اونها میگه اولائک هم صادقون اینها صادقین هستند چون صحابه در مقابل منافقین منافقین کاذبون بودند صحابه را الله میفرمازد صادقون گرچه صحابه امروز نیستند که ما بریم با اونها نشست و برخاست بکنیم اما میتونیم سیرت اونها را زندگی اونها را آداب زندگی اونها را روش زندگی اونها را اخلاق اونها را در زندگی خودمون پیاده بکنیم ما کان لاهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ما در آیات گذشته خاندیم که الله تعالی سرزنش کردند بسیاری از متخلفین را که تخلف کردند از جهاد و در این جریان تبوک با رسول الله راه نشدند اللہ می فرماید برای اهل مدینه سزاوار نیست ما کانی اهل مدینه تی انجا ترغیب جهاد است و زاجر و سرزنش بر تخلف کردن است و من حولهم من العرب نتنها اهل مدینه انها ایک اطراف مدینه هستن از بادی نشینها از سهران نشینها برای اونها مناسب نیست سزاوار نیست اینکه از رسول الله تخلف کنند رسول الله رفته در راه مشقت در راه زحمت در راه جهاد در راه خطر و اون آقا اینجا نشسته زیر سایه درخت و زیر سقف خانه بازن و بچهش نشسته و راحت هست ولا لا يرغبو بانفسهم عن نفسه و خودشون را ترجیح ندهند نفس خودشون را بر نفس رسول الله لا يرغبوا یعنی به خودشون تمایل داشته نباشند به نفس خودشون یعنی به نفس خودشون راحت برسانند ان نفسی به غیر از نفس رسول الله نفسشون در راحت باشد و نفس رسول الله در مشقت باشد خودشون زیر سایه باشند و رسول الله در گرمی تبوک عرق بریزد تفسیر قرطبی نوشته یعنی لا يرذوا لانفسهم بالخفض والدع و رسول الله في المشقه برای خودشون راضی نباشند که خودشون در جای راحت و آرام باشند و رسول الله در مشقت و تکالیف باشد لذا هیچ وقت نفس خودت را جان خودت را بر نفس و جان رسول الله ترجیح مده ذلك بانهم حال خدای تعالی ترغیب میده به سوی جهاد و فضیلت جهاد را بیان می فرماید اللهم فرمد ذلك بأنهم لا يصيبهم این بسبب سبب این است که به اون مجاهدین رسد ولا نسب و ولا مخمسة و في فی سبیل الله در خدا ولا يتأون موتا و انها لجت نمی کنند هیچ جای پارا کی غیز الكف کفار،, کفار رب خشم بیارند ولا ينالون من عذوب و حاصل كنا از دشمن هیچی چیزی را الا كتب لهم بهی عمل صالح این جواب همه است مگر نوشته میشه برای آنها در مقابل این عمل صالح یعنی هر گرسنگی عمل صالحی برایش نوشته میشه هر تشنگی عمل صالحی برایش نوشته میشه هر خستگی هر مسیری که میره نیم کلومتر کی میره اینها همه عمل صالح برایش نوشته میشه اللہ تعالی برایش عجر میریز اللہ تعالی قربان رب بیریم که خدا تعالی وقتی که ما در راه نیکی قدم برداریم هم هنوز داریم مقدمات را فراهم میکنیم خدا از الان برای ما عجر میریزی از الان برای ما عجر میریزی مثلاً شما در یک اداره کار می کنید، در یک کارخانه کار می کنید، شما صبح، شش صبح بلند می شید، خوابتون را ترک می کنید، اذیت می شید، جای پیاده می رید، سردی، گرمی، خیلی اذیت، تا با, یک هز، با هزار مشقت ساعت هشت اونجا می رسید، ساعت هشت که وارد اداره می شی، تایم می زنیک ساعت هشت رسیدم، حقوق شما از کی حساب میشه؟ از هشت دیگه حساب میشه از اون شش که این همه زحمت تو مسیر کشید با اون کار نداره رئیس داره با اون کار نداره صاحب کارخانه شما برای کسی کارگری میکنید از اون گوشه شهر حرکت میکنی سر صبح یک ساعت دو ساعت تو راه هستید میایید برای صاحب کار هشت ساعت کار میکنید از ساعتی که پاره در ساختمون گذاشتی از این ساعت حساب میشه اون میگه به من ربطی نداره قبل از این تو باچه بدبختی اومدی باچه سختی اومدی اما الله این نیست الله می ربانه اللہ عز و جل می که از همون ابتدا که شروع می کنی و حرکت می کنی برایت نوشته میشه. نه از اونجا که شروع می در حدیث شریف هست که همین اسب خودت را اگر الف می دی همین عجر به اندازه علف ها به شما می رسه و اسب حتی بلا نسبت پسفکنده می اندازه پشگلی می اندازه ادرار میکنه. اینها هم برایت عجر می نیست این اصف میره در مسیر هرچی آب می به همون اندازه برایت عجر می هر اندازه که شما گروسنگی، تشنگی، خستگی، رنج تحمل می کنی اینا همه برایت عجر می شه یعنی خدای عزوجل مثل صاحب کارخانه از اون ساعت و تایمی که شما وارد شدید از اونجا حساب نمی از وقتی که نیت کردی حساب می چرا رب به مهربانی هست چقدر دنبال بحانه هست که به بندگان بده شما برای نماز حرکت میکنید شما اینجا تو مسجد میاد از اینجا ثوابت نوشته نمیشه از اونجا که وضو گرفتن را شروع میکنی هر قطره ای که از بدنت میریزه گناهت میریزه و بعد هر قدمی که برمیداری برات نیکی نوشته میشه گناهی ازت کم میشه در تاریکی می در شب می در روز می آئی، هر ایکی عجل خودش را داره از اون جا حساب نمیشه که فلان سات وارد مسجد شدی این را می رب مهربان، واقعاً اللہ عز و جل دنبال این است که بندگان خودش را ببخشد به یک بحانی به بندگان عطا کند اما این بنده است که کتاهی می کند لذا اللہ می فرماید هیچ خستگی هیچ تشنگی هیچ خستگی و هیچ گروس نگی در راه خدا تایی نمی کنند. و همچنین قدمی نمی گذارند در قدمگاهی که این قدمشون کفار به خشم در می آورد و همچنین از دشمن هیچ آسیبی به اونها نمی رسد مثلا تیری بخورد زربهی بخورد زخم بشه مگر در مقابل همه و همه الا کتب لهم به عمل صالح مگر برای اون عمل صالح نوشته میشه ان الله لا يضيع اجر المحسنين همان الله زاینمی فرماید اجر مخلصین را بندگان مخلصی که برای خدا کار میکنند ولا ينفقون نفقه صغيره ولا کبیره، ولا یقطع نه وادیا بازم الله ای درامیده. هر کاری می کنی، نفقی می کنی، کم خرج میکنی یا زیاد؟ یک وادی را پشت سرمی گذاری، ده کیلومتر را پشت سرمی گذاری، یک تپه و یک کوه را پشت سرمی گذاری. آرچ؟ ولا ينفقون نفقه. خارج نمیکنه هیچ نفقهی صغیرتن نفقهی کمی ولا کبیره ونفقهی بزرگی ولا يقطعون وادیا وهمشین نمی پیمایند هیچ وادی و هیچ میدانی را الا كتب لهم مگر نوشت میشه برای اونها لیجزیهم الله أحسن ما كانوا يعملون تاکی الله تعالی به جزا جزای بهترین اونچه که عمل کردند یعنی بر اساس بهترین عملشون خدا جزای بهتر میده بش منظور بهترین جزاها بهترین پاداشها و نیکی ها را الله تعالی بهشون عطا فرماید اما در وسط جمله موترزه برای فراگیری علم است اگر بخواهیم ربطش را بیان بکنیم اینقدر اینجا فضیلت جهاد تعریف شد و بیان شد میطلبت همه برن بجهات اما الله تعالی می همه نه. بعضیها باید بشینن علم حاصل کنند بعضیها یاد بگیرند بعضیها حلال و حرام را بفهمند وما کان المؤمنون لینفرو کافه مؤمنین همگی نروند کافتا یعنی به صورت همگانی به صورت بسیج عمومی هیچ که باقی نماند نه یک گروهی بره علم یاد بگیره علم هم ضرورت هست علم هم فرض کفایه هست ببینید اگر در میان ما یک مجموعه نرود علم یاد بگیرد علم دین را به تفصیل علم شریعت را علم قرآن را علم سنت را علم فقر را استنباط و برداشت مسائل را اگر یاد نگیرد همه ما گناهگار میشیم. باید یک گروهی برای فرض کفایه هست. همون طوری که نماز جنازه را ما یک گروهی میخانیم از گروهی دیگه ساقط میشه. یک گروه بره علم یاد بگیره بعد از گروهی دیگه ساقط میشه. لذا الله میفهمد گروهی بره البته این علم تفصیلی هست. علم تفصیلی یعنی مفصل علم قرآن، علم سنت، جزئیات. تمام موارد اما علم به صورت ضروری در حد ضرورت بر تک تک من شما فرض فرض کفایه نیست فرض اینه اونجا بر ارز کنم که جوان هم علم فرضه بر پیرمرد هم علم فرضه بر زن هم فرضه بر مردم فرضه به اندازه ضروری ضروری یعنی چه ضروریت دین؟ ضروریات دین اون چیزهایی را میگن که باید هر مسلمان بدانت هر مسلمان باید داشته باشه مثلا در بوی ما نسبت به خدا چه اعتقادی داشته باشیم مثلا ایمان داشته باشیم که خدا خالق خدا مالک خدا رازقه خدا از عزوجل هست که تنها باید او را سجده کنیم فقط باید مشکلاتمون را از خدا بگاییم اون چیزهایی که جز اولیات هستند جزء ضروریات هستند این حلال هست این حرام هست نماز خاندم فرضه ترک نماز حرام است روز گرفتم فرضه ترک روز حرام است این احکام را هر کسی باید بداند و نماز چگونه خانده میشه چند رکن نمازه این را دیگه یه ملای بره یاد بگیری از سر شما ساقط نمیشه شما باید یاد بگیری چند رکن نمازه چطور بخانم نماز را روزه را چطور بگیرم الان جزیات را خب فرض نیست بر شما اگر یه جای بجای اتحییات رفتم به غیام چکار بکنم خب این را از عالم می پرسی ولی اصل فرائض را ضروریات را اولیات را اونی که هر کسی باید بدونه همگان باید بدونم بر همه فرض اما بغیر از این این را میگه علم ضروری علم ضروری برای همه فرض اینه اما علم تفصیلی که کاملا قرآن چی گفته از اول تا آخر قرآن را ترجمه تشریح تفسیر یاد بگیرم احادیث رسول الله را یاد بگیرم فقر را و احکام را که چگونه از آیات و از احادیث برداشت میکنم یاد بگیرم اینها فرض کفایه هست یک مجموعی از فرزندان شما یاد بگیرند از همه شما کفایت بیکند لذا الله می همه به جهاد نروند فل عما كان المؤمنون نسببرای مؤمنان لینفروا کاف تاکب که بروند همگی فلولا نفر من كل فرقت چرا نمیرود از هر گروهی منهم از همه مؤمنین طایف یک مجموعه لیتفقهوا فی الدین تا فهم دین حاصل کنند فقه دین فقه دین یعنی فهم دین دین را بفهمند اشارات قرآن و سنت را بفهمند علم قرآن و سنت رب بفهمند و لينذر قومهم فريز اول یادگیری است فريز دوم رساندن به قوم است این عالمی که بعد از بعد از یاد گرفتم میر مغازه‌داری می‌کنه فريز دوم را ادا نکرده اگر من کلمه سبکی و تندی نگم همین که این به فريز دوم خودش عمل نکرده و مسئول هست و گناهکار هست یک امانتی به دستش هست ده سال دوازده سال در این حوزه های علمیه نشست و از صدقات و خیرات مردم استفاده کرد گرچه برای این نباید تبلیغ بکنه ولی خوب خیلی هستم به هزینه خودشون نشینند. نشست یاد گرفت الان که این فریزه اول حاصل شده وظیفهش هست به مردم برسانند مردم را بهترساند لذا اگر اون بره به فکر معاش خودش باشه به فکر زندگی خودش باشه اون وقت به وظیفه خودش عمل نکرد کوتاهی کرد ولی اون ذر قوم آمهم اگر رجع وقتی که بسوی اون قوم برميگردند لعلهم يحذرون تا قوم بترسند از خدا بترسند و گناه نکنند معصیت نکنند. اینجا الله تعالی در ادامه در آخر سوره که پایان سوره نزدیک میشیم مجددا موضوع جهاد را یادآوری میفرماید در جهاد اینه که انسان از دشمن نزدیک به خود شروع بکند. همون کاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم کردند. این دشمنان وقتی که عهد شکنی دارند، پیمان شکنی دارند، اول اینا را قلقم کند. چنانچه رسول الله صلی علیه و وسلم اول به حساب یهودی رسیدگی کردند. یهودیایی که نزدیک مدینه بودند، اینهایی که هر روز توطئه می کردند، هر روز پاپوش درست می کردند، مسلمانان رازیت می کردند، اول خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم را قلقم کرد، مدینه را از وجودشون پاکسازی کرد بعدا دورتر به کجا رفت؟ مکه رفت بعدا هنین و طعف فت شد هنین و طعف و اطراف سرزمین حجاز و جزیرت العرب که مسلمان شد و همه فتح شد بعدا اصحاب رسول الله به ایران و روم رفتند به افریقا و اروپا رفتند لذا الله تعالی می از خود شروع کنید همانطور که در جهاد باید اول فتنهای نزدیک تر را قلقم بکند در تبلیغ هم همچینین تبلیغ اول نزدیکان خودت شروع کن از خانواده شروع کن از برادرانت شروع کن از قوم و قبیلت شروع کن از محلت شروع کن بعد برو به شهرت بعد برو به شهرهای دیگه لذا الله می فرماید یا ایها الذين امنوا ای مؤمنان قاتلوا الذين يلونكم من الكفار بجنگید با آنهایی که متصل هستند نزدیکی شما استند از کفار و یجیدو فیکم غلظه الا از جهاد در شما غلظت و شدت ببینند یعنی بر در باره دین قبلا این مسئله توضیح دادم در امر دین نرمش نشون ندهید در باره مسئله شخصی تون بله نرم باشید و علمو ان الله مع المتقین و بدانید که هر من معیت خدا همراهی خدا با متقیان است. اونای که از شرک و از گناه دوری میکنن اونا متقی هستن. و الله تا الله منافقین را در ادامه مورد سرزنش قرار داده. منافقین مسخره میکردند. هر وقتی که سوره نازل میشود می گفتن که این سوره ایمان کی را اضافه کرد چون اونها شنیده بوده آیات قرآن ایمان را اضافه میکنه میگفت ایمان چه کسی اضافه شد یکی به مسخره میگفت ایمان من اضافه شد یکی میگفت نه مال من اضافه نشد اما خدای عزوجل میفرمایند تا تمسخر میکنند اما مؤمنین واقعی هر که آیه نازل میشه ایمانشون اضافه میشه و اذا ما انزل هرگا نازل میشه سوری، فمنهم من یقور، بعضی از اونها هستن، انهایی که میگوین، ایوکم زادت ہو هذه ایمانا، کدام یک از شما افزود این در او ایمان را ایمانش را اضافه کرد، اللہ می فرمائے، فا اما الَّذِينَ آمنو اما اُن صحابه، اُن کے ایمان آوردن، ایمان با اخلاص آوردن، فزادت هم ایماناً آیات قرآن در اونها می از نظر ایمان و هم یستبشیرون و اونها با نزول آیات خوشحالند اونها چون مجده و خوشخبری حاصل میکنند کنند اونها خوشحالند شاد و مسرورند اما منافقان و اما الذين في قلوبهم مرض اما کسانی که در دلهای های آنها مرض هست در دل های آنها نفاق هست فزادتهم رجسا الى رجسهم این آیات و این سوره جدید می افزاید در آنان رجس یعنی در پلیدی آنها می افزاید پلیدی چه کفر شرک پلیدی شو می افزاید ای یک پلیدی میشه ال رج سهم به پلیدی گذشته. یعنی یک کفر دیگه اضافه میشه. مثلا اول صد آیه نازل شده بود، الان بیست آیه دیگه. اول کافر بیصد آیه بود، الان کافر به و بیست آیه شد. پس پلیدی بر پلیدی، رج بر رج. و ما کافرون هم کافرین. اینها می در حالی که اینها کافر هستن. و بعد الله از زوجال. هم خدا خدا نمیخواد که همه بره به طرف جهنم اما خدا به اجبار مؤمن هم نمی کند خداوند زمینه ایمان فراهم میارد مثلا برای منافقین اینجا بیان میفرمه الله کس در سال یک بار دو بار خدا به مصیبت گرفتاریشو میکنه در سالی که دو بار به چی گرفتار میشن مصیبت مشکل که شاید بعد از اون برگردند ببینن که از طرف خدا این مصیبت آمد معمولا انسان در وقت به بی خدا بیشتر رجوع می کند ولی اینها این قدر دلشون سیاه هست و زنگار گرفته که به سوی خدا بر نمی گردن عزیزان این حال حال ما هم همین هست گاهی خدای تعالی برای ما هم مشکلات میاره هدف از مشکلات چی هست؟ اینکه که ما رجوع به خدا بکنیم مثلا الان مال من سرمایه من پارتی من هر جا به من رسیدگی میکنند مشکل من حل میکند گای خدا تعالی مشکل طوری میاره که نه مال به درد میخورد نه پارتی به درد میخورد هیچ چیزی به درد من نمیخورد فقط و فقط کی میتونه درد من را درمان بکنه؟ خدا خب خدای عزوجل این مصیبت را چرا آورد برای من اونطوری که این آیه میگوید خدا میخواد من به خدا رجوع کنم به سوی خدا رجوع کنم لذا گاهی که مصائب بر ما می آید مشکلات بر ما می آید این مصائب عذاب نیستند اینها تذکرات الهی هستند و چه بسا همین مصائب باعث خیر می شوند چه باسا مسایب باعث خیر می شوند تعریف میکنند بزرگان می که یک یک فردی از یک جوانی از جوانان اصلا پایبند نمازی نبود اصلا به مسجد نمی اصلا نماز نمی خوند بعد از مدتی دیدن که ای ماشاءاللہ صفح اول هست پایبنده از همه جلوتر میاد چه نمازی میخواند؟ چه دعایی می کند؟ کسی بهش گفت که چه خبره؟ چه تغییری آمده؟ قبلا اینسی نواز نمی گفت پدرم مرده. او گفت خب پدرت مرده با نماز چه ربطی داره؟ دیگه مصیبت که بیاد انسان به سوی خدا رجوع میکنه کنه. گفت قبلا دلم جمع بود خاطرم جمع بود که پدرم از نظر دعا مرا خوب پشتیبانی می کرد. او که بود من دیگه کوهی پشت سر خودم داشتم اما از وقتی که او مرده احساس میکنم پشتیبانم را از دست دادم کی من دعا خیر میکنه کی همیشه یارب یارب میگه برای من سفارش میکنه الان دیگه سایه پدرم را از دست دادم الان خودم باید برای خودم فکری بکنم الان ببین بعضی وقتا مصیبت میاد این مصیبت مصیبت تلخی خودش را دارد اما از یک طرف خیر میشه برای انسان یک انسان میبینیم که شب و روز دعا و تضرو میکنه یکی هست بچهش مریض شده شب و روز دعا میکنه اگر این بچه مریض نمیشد شاید اصلا دعا نمی کرد. یا اصلا با این کیفیت دعا نمی الله بهتر میدونی کارهای خودش را لذا با مصیبت هایی که برما مسلمانان میاد شما شک نکنید که اینها خیر هستند پس هر مسیبت این آیه همین انتظار را دارد هر مشکلی می آید مشکل مالی می آید مشکل کاروبار می آید مشکل خانوادگی می آید مشکل مریضی می آید فورا متوجه خدا الله می فرماید اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين آیا آنها نمی بینند که آنها در فتنه گرفتار می شوند در مصائب و مشکلات گرفتار می شوند هر سال یک بار دو بار منافقین نمی بینند هر سالی کی دوبار بار میت ثم لا يتوبون ولهم يذكرون توبه نمی کنند از حرکات شنیشان از حرکات بدشان ولهم یذکرون تذکر نمی گیرند پس ببین فرق من و شما مؤمنین با منافقین این باشه که اگر برای ما مشکل آمد باید از حرکات زشت باز بیایین توبه کنیم به سوی خدا برگردیم و دوباره تکرار نکنیم چه بسا مشکلات را ارز کردم خدا آورده تا من شما رجوع کنیم کنیم به سوی الله و اذا ما انزل سوره نظر بعضهم الى بعض گاهی سوره می که این سوره در واقع زربی به منافقین وارد می کرد سوره میامد که در اون سوره بدبختی وقتیی اونها بیان می شد با ایرادی اونها بیان می شود. لذا نگاه میکردند که زودتر فرار بکنن از بس شرمنده می شدند و اذا ما اونزلت سو هرگاه نازل شد صورت نازل میشه صورت ای نظر بعضهم الى بعض هم بعض نگاه میکنن بعضی به بعض نگاه میکنند اشاره میکنن که بریم از اینجا جایمانیس، هلیارا کم من أحدن؟ آیا کسی شماره بی بنت؟ ثم من صرف و بعدا منصرف می و می می صرف میشه از مجلس بر میخیزند و میرهند. الله تعالی میفرماید این دلیلش یه صرف الله قلوبم. خدا دلها اینها را از ایمان منصرف و منحرف کرده. چرا؟ بانهم آنهم است. چون که اینها قومی هستند که نمیفهمند. درک ندارند، فهم ندارند. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عن الثم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم در پایان سوره ترغیب به اتباع رسول است ببینید ما چند آیه جلوتر خواندیم به رسول الله صلی الله عليه وسلم الله تعالی خطاب فرمود گرچه رسول الله و تمام مؤمنین وليجدوا فيكم غلظه باید کفار در وجود شما چی ببینند غلظت ببینند شدت ببینند این شدت و این غلظت و این تندی در مقابل کفار است اما بین خودمون باید نهایت محبت نهایتا مهربان نهایتا خوش باشیم خوش باش لذا الله تعالی انجا به ما میده که ما پیروی بکنیم از این رسول محبوب این رسول که چقدر ما را دوست دارد چقدر خیرخواه ما هست. اگر ما در مشقت میفتیم برای رسول الله سخت میشه. اگر ما راحت باشیم برای رسول الله راحت نه تنها در این دنیا در قیامت هم رسول الله همیش پریشان امتی اولا تا این دنیا تا روزی که بود غم و هم امت بود آخرین لحظات امت امت بر زبان مبارکش بود هر دعایی که قبول خداوند تعالی می فرمود یک دعا داری که قبول بکن دعا داری که برای قبول میشه فرمود این دعا را گذاشتم در آخرت برای امتم میخوام دعا کنم چقدر نسبت به امت مهربان است. چنین پیامبر رحمتی اللہ به ما داده پیامبر مهربانی اللہ داده اونجا هم بار بار دفاع میکنه. اینا این امت من استند اینا یاران من استند اینا دوستان من استند تا که برش ممکن باشه شفاعت ما می سفارش ما می الله لذا اللہ تعالی اینجا مارا ترغیب میده وقتی وقت چنین پیامبر عزیزی دارید چنان پیامبری دوست داشتنی دارید برای شما هم مناسب نیست که زره از حکم او سرپیچی بکنید سنت او فاصله بگیرید لقد جاءکم رسول من انفسکم همانا پیش شما آمده چنان رسول, رسول تنوین للتعظیم یعنی رسول عظیم الشانی رسول جلیل القدری اما چنان رسولی که من از انفسكم از وجود خود شما است یعنی بشر فرشته نیست جن نیست عزیز علیه ما انتم می بر او سخت میشه اون چیزی که شما را در مشقت واقع کنه اون چیزی که شما در مشقت و رنج بی اندازه بر پیغمبر سخت میشه حریص علیكم بر شما حریص است بر هدایت شما بر ایمان آوردن شما بالمؤمنین رؤوف الرحیم نسبت به بمؤمنان رعفت دارد و مهربان هست خیلی رحفت دارد خیلی مهربانی دارد بسیار و لطف دارد بر شما کافران هم همچنین خیلی حریص است که شما مثل مؤمنان او مؤمن بشید اللہ تعالی دستور میده به بی همه که شما اطباع این رسول را بکنید این پیامبر که پیامبر مهربانی هست پیامبر رحمت است پیامبر محبت است اما بعد خدای تعالی به پیامبرش میگه ای نبی من فانتولوا فا اگر اینها اعراض کردن به تو ایمان نیاوردن تو را پیروی نکردند پس تو خودت را به خدا بسپار با این کلمات خودت را به خدا بسپار این کلمات را حفظ کنید یاد کنید این کلمات کلمات بسیار پر فزیلتی هستند فقول بگو چی بگو حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلتو وهو رب العرش العظیم الله مرا کفایت میکند الله کافی هست در تمام مهمات من در تمام امور من الله مرا کافی است. اون الله که لا اله الا هو هیچ معبودی لایق عبادت نیست بجزء علیه توکل تو فقط و فقط من بر اون الله توکل کردم بر چیزی دیگه توکل نمی کنم و هو رب العرش العظیم و اون رب ارش عظیم است اگر این را شما بخانید همیشه ورد زبان کنید خدا تعالی در مهمات امور شما شما را کفایت میکند یعنی مشکلات شما به صورت خودکار حل میشه اصلا کار شما خود به خود روی غلطک میفته روایتی داریم حضرت اللہ روایت روایت دار ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه روایت میکنه این روایت در سنن داود هست می فرماید که رسول اکرم صلی علیه و وسلم فرمود هرکس این بخاند حسبی الله لا اله الا هو علیه توكلت و هو رب العرش العظیم هرکس کی این ذکر را این ورد را این آیه را این ذکر و وردی که خدا پیامبرش میگه فقل تو بگو تو بخان هرکس این را صبح هفت بار بخاند شب هم هفت بار بخاند اللہ عزوجل اورا کفایت میکنه تمام امورش را آسان میکنه تمام گره کارش خود به خود باز میشه ہر جا به بمبس برسه بمبس مش کنه خیلی نام اللہ و آیات اللہ قدرت داره تاثیر داره لذا ہم صبح هفت بار بخونید ہم شب هفت بار بخونید الله تعالی خود به خود به صورت خودکار امور شما رو پیش میبره مشکلات شما حل میشه این سوره مبارکه توبه بود که موضوع این سوره درباره جهاد بود و معرفی منافقین بود و همچنین مؤمنین و جزا و پاداش هر یکی بیان شد و همچنین بسیار مطالب زیبا مطالب آموزنده در این سوره بود الله تعالی به همه ما توفیق عمل اینا بفرماید